سوره یهود در این سوره داستان همه انبیا ذکر شده قابل توجه هست داستان به این خاطر این سوره نامگزاری شد به نام سوره یهود قبلا روایتی خدمت شما خاندن که رسول الله صلی اللہ علیه وسلم فرمود پنج سوره من پیر کرد پنج سوره به من فشار آورد. این پنج سوره کدام هستند؟ سوره یهود، سوره واقعه، سوره مرسلات، سوره نبع، سوره ایده شمس، تکویر اونها که همیشه بحث قیامت و بحث عذاب و بحث مشکلات مشخصه اما در سوره یهود در بعضی روایتها هست که در سوره هود چی چیزی یا رسول اللہ شما را پیر کرد؟ فرمود فاستقیم کما امرت این جمله استقامت کردن سخت واقعا انسان در یک مقطعی احساساتی میشه حرفی میزنه چیزی میگه اما بعدا بر این استقامت کنه تا آخرین لحظات زندگی چهل سال پنجا سال بر همون بماند این خیلی مشکلی لذا فرمودن که سوره هود مرا پیر کرد. لذا در این سوره داستان انبیا هست. همهش دلایل نقلی هست. مناسبتش با سوره مبارکه ی یونس اینه که در سوره یونس هم موضوع توحید بود. عبادت یک خدا بود اما با دلایل عقلی بیشتر دلایل عقلی بود. آخر یکی دو تا نقلی. اما در سوره هود همش دلایل نقلی هست نقل از انبیا نقل از حضرت نو حضرت هود حضرت صالح حضرت ابراهیم حضرت لود حضرت شعیب حضرت موسی همه انبیا لذا همون مضمون است اما اونجا با دلایل اقلیه اینجا با دلایل نقلیه این ربطش است یک ربط ربط دیگر در پایان سوره مبارکه ی شما چی خان دید اتتب ما یوحا الیک اتبع ما یوحا الیک متبعی وحی باش پیروی وحی باش ما یوحا الیک چیه کتاب او آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر گویا اونجا گفته شد که دنبال ما یوحا الیک باش انجا ما یوحا الیک معرفی شد اون چیه احکمت آیاته ثم فصلت الى آخره پس این دو سوره با هم دیگر رفت دارند و دیگر در سوره مبارکی یونس بود که نزد اللہ عزوجل هیچ شفیع غالب وجود ندارد حال همون مضمون که هیچ شفیع غالب وجود ندارد در سوره مبارکه ایہود این بخانی وقت شفیعی نیست پس فقط در حاجات او را خانید کسی دیگر را نخانید خب این سوره هم سوره مکی هست سوره های مکی همیشه عقایده همیشه ایمانیاته و الله عز و جل سوره را آغاز می فرماید با حروف مقطعات که بیانگر اعجاز هست محنش اینه که ای مخاطبان شما آجزید کلامی مثل این کلام که از برگرفته از حروف مقتعه هست بیارید کتاب احکمت آیاته کتابی هست که آیاتش محکم هست آیاتش محکم هست ببینیم منظور از محکم بودن آیات چیه چند مفهوم بیان کردند همه درسته اولاً اینکه محکم به اون آیاتی گفته میشه که اون آیات واضحا روشنند هیچ خفایی هیچ پوشیدگی در اونها نیست اینجا هم از که مت آیات ثم فصلت فصلی واضح روشن اما متشابه نه متشابه اون آیاتی را میگن چی هستند مغلقند مراد معلوم نیست مراد را الله میدانند ما نمیدونیم بس آیات این کتاب چی هستند محکم هستند عموماً محکم هستند اگر بین هزار جمله یک جمله متشابهی هست اون برای امتحان است. اصل اینه که آیات قرآن همه قابل فهمند همه واضحند همه روشند محکم به این معنا. این معناه اول محکم است معنی دوم دو محکم اینه که آیاتش محکم هستند به این معنی که از تناقض و از تضاد محفوظن با هم دیگر اصلا تزاد و تناقض ندارند و برخلاف حکمت و نفس الامر هم هیچ آیه و مطلبی در اونها نیست این دو مفهوم مفهوم سوم محکم که از ابن عباس منقول شده این مفهوم جالبتر به نظر می رسد و این بیشتر به دل منشیند اون چیه قرآن محکم گفته شده محکم به اون کتابی می گویند که قابل نسخ نباشد قابل نسخ منسوخ نمیشه. برخلاف تورات و انجیل که اون کتابها فرستاده شدند مقتعی بودند موقت بودند یه در یک زمان و یک مقتعی بودند بعدن کتاب بعدی که آمد یعنی قرآن اونا رو منسوخ کرد پس اونها محکم نیستند اما قرآن بعد از قرآن هیچ کتابی نمیاد که قرآن را منسوخ بکند بعد از قرآن دیگه کتابی نازل نمیشه دیگه پیامبری نخواه آمد. که او بعد از اون قابل عمل بشه خدای تعالی آیات قرآن مجید را توری فرستاده احکام را دستورات را توری فرستاده که تا قیامت قابل عمل بشه شما دقت بفرم واقعا یکی از ایجاز قرآن است شما گاهی کتاب می خانید نا نظراتی نظراتی بعضی از کسانی که کتاب نوشتند نظراتشو مثلا 100 سال پیش یک کتابی نوشته شده 100 سال پیش اون نویسنده بزرگوار مطلبی اگر نوشته بر اساس شرایط اون زمان امروز اون نظرش خنده آور است اون نظر را هیچ که توجهی نمی چون که امروز وقتی که دنیا به پیش رفته و دنیا ترقی کرده مشخص میشه که اون نظر اون نظری چی هست درستی نیست در تمام مسائل مثلا در فلکیات در علم پزشکی در بقیه تحقیقات علم و هر چی که اولمای جدید میگن با واقعیت نزدیکتره تا اون چیزی که علماء قدیم میگویند این خیلی کتاب های قدیمی هستند در علم در دانش در ساینس در پزشکی، در فلکیات که بعد از مدتی بعد از 100 سال بعد از دویس سال اون نظرات نظرات چی هستند؟ نظرات قدیمی هستند اون نظرات از کنم که جدید به حساب نمیاند اون نظرات دورشون وقتشون گذاشته در حالی که اون نظرات را کسانی قائم کرده که واقعا عالم بودن در زمان خودشون استاد بودن حرف اول از نظر علمی می زدن. اما علمشون محدود بود جهان وقتی که پیشرفت کرد دیگه اون حرفها برای ما درد نمیخوره. به همین خاطر در برنامه های درسیه دانشگاه ها معاهد دینی حوزه ها هرچی که بپیش میریم چیزهای جدیدی میاد میگه اون فلسفه فلسفه قدیم امروز هیچ اصلا متوجه نمیشه یعنی چی الان فلسفه جدید لازمه الان منطق جدید علوم معقولات الان حیعت جدید علم فلکیات جدید اون قدیمی جدیدن پیشرفت کردیم جدیدن تاغیقات جدیدی آمده که اون نظرات باطل الان لذا رسم دنیا بر این است اما قرآن کتاب الله قربانش بریم هزار پونست سال, سال پیش نه سال نه سد و سال هزار و سال پیش آیاتش نازل شدند، آیاتش فرستاده شدند و به ما زمینی ها اعلام شدند. الان بعد از این همه مدت بعد از 1500 سال وقتی که نگاه میکنیم میبینیم واقعا با شرایت امروز هم خانی دارند. واقعا امروز وقتش هست که به اونها عمل کنیم. هزار سال بعد میبینیم هم، طبق شرایت اون زمان خدای تعالی طوری آیات را نازل فرمود این اعجاز قرآن است هیچ کتاب این طور نیست طوری خداون دستوراتش را داده که امروز هم قابل عمل هست امروز هم احساس می هر آیه قرآن مجید در رابطه با وقایع امروز است درباره خرافات امروزه در مشکلات مردم در امروز است پس این دلیل اعجاز است به همین خاطر قرآن قابل نسخ نیست حکمت احکمت آیاتو آیاتش محکم هستن یعنی قابل نسخ نیستن ثم فصلت فصلت یعنی مطالبش واضح روشن صورت جدا جدا بیان میشن مثل جواهراتی که در یک سلک برشته در آورده میشوند و جدا جدا از هم هستند همچنین قرآن این هست مشتمل بر دلایل توحید احکام موعظ قصص هر یک جدا جدا روشن واضح لذا الله می فرماید ثم فصلت ملد حکیم خبیر اما احکمت آیاته ثم فصلت برای چه مضمونی چه مضمونی روشن است چه مضمون محکم از قابل نسخ نیست اینکه الله تعبدوا الا الله یعنی او حکمت آیاته ثم فصلت بان تعبدوا الا الله خلاصه تمام آیات خلاصه تمام دلائل خلاصه تمام مزامین قران اینکه الله تعبدوا الا الله عبادت نکنید، هیچ هستی را، هیچ ذاتی را، هیچ شخصیتی را، الا الله بجز الله. اننی نیی لكم و بشیر. انتهید بود این رسالت، اعلام رسالت. حمایت من محمد برای شما از جانب اون الله. ثارساننده هستم و مجد دهنده هستم هم انذار می کنم هم خوش خبری می دهم انذار کسانی را که نپذیرند و مجد کسانی را که بپذیرند و ان استغفر ربکم تلقین استغفار اگر در گذشته کوتاهی کردید اگر در گذشته ضعف داشتید و ان استغفر ربکم اینکه ربتان را مغفرت بطلبید از او معذرت خواهی بکنید بخاطر اشتواهات ثم توبو بو الی تلقین توبه سپس بسوی او برگردید بیسوی او مراجع کنید اگر برگشتید و توبه شما قبول شد یومتیع متاعا عن حسنا الی اجل مسمى بشما بهرهگیری زیبا میده در یعنی زندگی زیبایی زندگی خوشگواری بشما این می میفرماید تا مدت معینی چون قرار نیست تا عبد اینجا بمانید بعد شما رو میبری پیش خودش و یؤتکل لذی فضل فضله این نتیجه اخروی است بعد از اون اجل مسمع کشمار شعار جهان اخره منتقل بکنه ويؤتي كل ذي فضل فضلا ميد هات بهر صاحب فضل فضل اورا وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير ان انذرت این ترس است و این تولو اگر شما برگشتید این تولو عن توحید اگر به توحید پشت دادید اگر اعراس کردید سمر تولی چقدر بود فا اخاف اخافو علیکم همانا من می ترسم بس شما عذاب یوم کبیر از عذاب روز بس بزرگ روز بزرگ برای شما خواهد بود روز روز قیامت است الى الله مرجعكم فقط و فقط الله اصباز گشت شما و على كل شيء قدير. ان الله بر هر تیزی قادر است لذا این کتاب محکم است قابل نسخ نیست با این مزامین توحید مضمونی هست که تا قیامت قابل ناسخ نیست تا قیامت دستوری نه که فقط یک الله را عبادت کنید این دستور منسوخ نمیشه الا انهم یثنون الصدورهم لیستخفوا منه الله تعالی در این سوره دو تا مدعا بیان بعداً تمام داستان داستان‌های کمیان بر اساس همین دو مدعا هست مرتب بر اینها میشه اول اینکه هیچ هستی لایق عبادت نیست به جز الله این شمال آن خاندید الله تابوده الا الله این مدعی اول بود الا اینهم یثنون صدورهم این مدعی دوهم بالخصوص خصوصی ما یسررونه و ما یولن علم غیب در مدع اول گفته شد هیچ هستی لایق عبادت نیست به جز الله. در مدادی دوم دو گفته میشه هیچ هستی عالم الغیب نیست به جز الله. کے فرموده علیه انهم یثنونا سدُرهم در واقع در جواب مشرکان مشرکین بیچاره خدای از زوجال در علیا مثل یک انسان قیاس میکردند. علم که نداشتن شناخت که نداشتن میگفتن که ما اگر یه چیزی علنی بگیم آشکارا بگیم در جمع بگیم چند نفر ظاهرش بکنیم خب خدای محمد میشنفد با خبر میشه مطلع میشه اما اگر پشت درهای بسته یا اینکه اگر چادر روی خودمون بندازیم سرمون رو پایین بکنیم از تو سینه ما چه خبر دارد؟ رضا امام رازی نوشت رویه ان طائفته من المشرکین روایت گونه عمده که گروهی از مشرکین قالوا گفتند اذا اغلقنا ابوابنا وقتی که در هامون ببندیم و ارسلنا سطورنا و پرده بکشیم در ببندیم پرده بکشیم و استخشينا ثیابنا و روی خودمون پارچه بندازیم ف توی چادری و سنینا صدورنا و سینه خودمون رو دلابو کنیم هر چی تو سینه هست هر چی تو دل هست هر چی در وجود هست. علا ادعایت محمد فکیفه ی بنا بر ادعایت محمد یا بر مخالفت محمد از کجا می دونی؟ از کجا با خبر میشه اللہ میفرمه من بدونم الا انهم یثنون صدورهم خبردار آگاه باشید همانا آنان دولامی کنند سینہای را لیستخفو مند تا از خدا مخفی کنند از خدا پنهان و پوشیده کنند الا حين یستغشون ثيابهم خبردار زمانی آنها می پوشن لباسشون را لباسی بر خود می اندازن یعلم ما یسرون و ما یعلنون اللہ میداند آنچه که یسرون مخفی میکنه و ما یعلنون آنچه که مخفی میکنه. بعضی های ها ایچیز دیگه گفتند بعضی ها می که بعد از اینکه صحابه جدیدان با خداوند و با صفات خدا آشنا شدند و متوجه شدند که خدا هر را میبیند برای گاهی نیازی قضای حاجتی بنا نسبت دستوی چیزی که می‌رفتند دور می‌رفتند بیابان می‌رفتند خیلی معذب بودند که خدا ما را می‌بیند لذا خیلی خودشون را بر خودشون را تکلفا کسی نبود اینکه خدا نبیند دوربر خودشون را لباسی چیزی خوب میپیچندند خود را دللا میکردند تا مشاهده نشود از طرف خدا الله تعالی میفرمیم شما خدا را نشناختید اما حین استخشو نثیاب هم زمانی که اینها لباس اطراف خودشون میذارند خودشون را با لباس میپوشند زیر لباس هم خدا میبیند. سینا را دولا می کنند، میکنن هم خدا می خودشون را هر چطور جمع بکنن ی علم و ما سرروونه و معیعلونون اینکه مخفی و ظاهر را می بینن به جای خود ان او بذات اون بدادصدور نسبت به راز سینه‌ها چی هست؟ علیم هست لذا؟ نیازی به انتقلفات نیست؟ پس خدای تعالی این مدعی دوم است همون که معبود هست لایق عبادت فقط او هست عالم الغیب هم فقط و فقط او هست بغیر از او مخفیات را و پنهانها را هیچ کسی دیگه نمیداند. و و همچنین و ما من دابت فی الارض الا علالله رزقها هیچ دابه هیچ موجود زنده در زمین نیست مگر بر خداوند هست رزق اون واقعا خداوند رزق همه را مقدر کرده و به همه هرچی که مقدر باشد خدا میده خداوند به دواب وقتی میده به اون دررنده تو جنگل هستن به اونها میده بعضی از دررنده ها هستند که اونها فقط گوشت میخورند خار هستند اونم گوشت شکار شما همینطور گوشت مرغ ماشینی گیری تو نمیاد تا برس گوشت آهو گیر بیاد اونجا خدا برای اونم مقدر کرده همون گوشت آهو بهش میده. بعضی مایی ها میگن تو دریا هستند خوراک ماهی ماییه اما بعضی مایی ها روزی کسانی که تحقیق کردن دنبال کردن میگن روزی 200 کیلو ماهی میخوره یک ماهی دویس کیلو ماهی میخوره 200 کیلو ماهی ما تو سال گیرمون نمیاد تو یک سال اون یک روز میخوره خدا همون جبرش مقدر میکنه حواله میکنه هر یکی خدا تعالی هر چی بخورت چیز نایاب بخورد، چیزه نفیس سخت گران قیمتی بخورد، خدا برش مهیا میکنه خدا وقتی که دواب را رزق میده حیوانات را رزق میده. گشت دابه معنیش هر موجود زنده شامل حال ما هم میشه. رزق میده. به ما انسان ها نمیده. به ما به طریق اولی میده. لذا این اعتقاد را که خدا واقعا رزق میده باید همه ما داشته باشیم. همچنین هرچی که جمعیت امروز دنیا دست پاچه هست نه از امروز دست پاچه از دیر وقتی اینهایی که ایمام به خدا ندارند اینهایی که زواهر را فقط نگاه می کنند یک تفسیر از این تفسیرهای جدید دیدم که یک دانشمندی از دانشمندان غربی در تقریبا چند صد سال پیش پیشمینی کرده بود در سال هزار و حشتاد تقریباً هزار و هفتصد و میلادی میشه سیصد سال پیش. اون زمان پیش بینی کرده بود نوشته تو کتابش هنوز هست گفته که دنیا بعد از سی سال از گروسنگی میمیره. چون جمعیت داره اضافه میشه سی سال بعد همه انسان هم میمیدند ای اینا دانشمندان که به ظاهر نگاه میکنند به خدا ایمان ندارند اینطور گفته بود و ایشون نوشته بود این بزرگوار نوشته بود اینان ست سال بعد یعنی در سال 1789 بود در سال 1889 صد سال بعد یک دانشمند دیگه هم همین نظر داده بود که با توجه به اون چی که در زمین ما داریم از آب و از زخیره و از خوراکی هایی که ما داریم بینی کرده محاسبه کرده بود سی سال بعد همه تمام میشند همه کم کم میمیرند همه از بمیرند سی سال بعد دنیا کم کم به طرف زوال از چی از, از،, از گروستنگی از فقر الان سبحان الله شما نگاه کن دویس سال پیش مردم چی میخورده الان چی میخورند الان چه غذاهایی چه لباس الان جمعیت را ببین که ده برابری اون سی سال پیش شده ده برابری اون زمان شده ده برابر اون زمان هم خدا بیشون رزق داده اون زمان این وسائل که امروز هست وسایل حمل و نقل وسائل بلاخره رفع نیاز انسان ها اون زمان بود نبود خدا هر چی که انسان را جلو میبرد هم روزنی براش پاس میکنند برای رزق و روزیش هم برای مایحتاجش اون اگر الان مثل قدیم وسیله های ما گاو شطور می بود آیا ما میتونستیم مشکلاتمون را حل کنیم میتونستیم که داد و ستت بکنیم میتونستیم این شهر و اون شهر بریم تجارت میتونستیم حمل و نقل بکنیم لذا قربانی رب بریم که امروز اگر یک روزی مثلا شما فرض کنوی کامیونداران اعتصاب میکنند تمام مواد خوراکی تو شهر گیر نمیاد چون نمیاد از شهرهای دیگر را بسته میشه الله تعالی هر زمانی که میاد جلوتر بر اساس نیاز اون زمان بر اساس شرایط اون زمان بندگانش که بیشتر شدن مخلوقاتش که بیشتر شدن امکانات بیشتر خوراکی بیشتر و اتفاقا اینه که از نظر کمیت هم و از نظر کیفیت خیلی نسبت به گذشته پیشرفت میکرد. اگر سفره امروز ما را اگر یک آدم 200 سال پیش بیاد و ببینه فکر میکنه بهشت اینجا. به بهشت اومده این همه غذاهای رنگ برنگ. این جمعیت ما بیشتر شده باز نه اینکه تنها غذا کمیتش بیشتر شده، کیفیتش هم بیشتر شده. سر یک سفره یک نوع غذا اصلا پیدا نمیشه. چند نوع غذا هست؟ لذا قربانی این رب بریم که این هر که میگه همون طور به مرور زمان به گذشته زمان اثبات هم میشه بی خود انسان ها دس پاچه هستن میگن فرزند نیارید که در آینده ما مشکل خواهیم داشت نه آب کفاف میکنه نه این نفت کفاف میکنه نه زمین و مسکن کفاف نمی میکنه لذا در آینده مردم با مشکل مواجه میشن نه چنین چیزی نیست الله عزوجل برای همه میگذراند امروز شما نگاه بکنید کشورهای پر جمعیت اتفاقا مثل کشور که بالاترین جمعیت دنیا را دارد اون کشور از نظر صنعت از نظر تکنولوژی از نظر سرمایه در دنیا حرف اول رو میزره اون باید ف ترین کشور می بود خدا در نشان میده که به ظاهر نگاه نکنید به ظاهر هیچ وقت نگاه نکنید به رب نگاه کنید به اون رب که رب اسباب است لذا فرماد و ما من دابت فی الأرض هیچ موجودی نیستی هیچ موجود زنده در زمین نیست الا الله رزقها مگر بر الله است رزق آن مگر رزق آن بر الله است یعنی تفاضلن واجب نیست در اون جنگل تو اون بیابان ای هست مرغکی هست گنجشی هست جوجهی هست همون جا خدا برش حواله میکنه همون جا برش میفرسته و یعلم مستقرها و الله الله میدان المستقر ان را عردا هر دابهی که باشه و بالخصوص انسان مستقر ان را و مستودع ان را می قبلا این جمله را خاندیم چند تا تفسیر داشت مستقر از نظر لفظی یعنی جایی که جای قرار جایی که تادیر می ماند مستودع جایی که اونجا ودیت و امانت گذاشته میشه مختصر می ماند بعضی گفتم مستقر محل زندگی در دنیا مستودع محل دفن بعد از مرگ، اونجا موقعت می‌مانه بعد دوباره میاد می به طرف زندگیش، اون زندگی جدید. بعضی گفتن که مستقر محل زندگیش در دنیا و آخرت. دنیا کجا زندگی میکنه، کدوم شهر، کدوم کوچه، کدوم خیابان؟ آخرت کجا زندگی میکنه؟ مستودع. شکم معدر است در دنیا و قبر است در آخرت. على ای حال کلون فی کتاب مبین همه اینها در الله محفوظ نوشته شده خب خدای تعالی وقتی که از قدرتش بیان فرمود حال دلائل رو می بیان می فرمود این دلائل رو خاندید خلق زمین و آسمان در مدت شش روز و هوا لذی خلق السموات و الارض الله انزاته که افرید آسمان ها و زمین را فی سه تی ایام در مقدار شش روز و کان عرش او علی الماء و عرش خدا بر آب بود یعنی چی؟ این آیات ها در تفسیر این اقوال مختلفی گفتم ولی اون تفسیری که راجع ترس و بیشتر میگویند بنده خدمت شما عرض میکنم اینه که عرش کنایه از حکومت است حکومت خدای از وجل قبل از پیدایش آسمان ها و زمین بر آب بود یعنی قبل از این فقط دنیا تمامش آب بود یعنی معلوم میشه و از علم هم همینه ثابت میکنه که قبل از هر چیزی آب بوده در این دنیا فقط آب بوده زمین نبوده ولی آب بوده تمام دنیا را آب گرفته و عرش خود در روایتی هست که تمام این سطح زمین حتی بعد از اینکه درست شده بود زیر آب بوده هیچ حجج خشک کی باقی نہ الان الله عالم انسان خیلی جها میره. در همین مناطق خودمون آثار آب هست مردم اصلا بی یادشون نیست نہ از 200 سال و 300 سال و 400 سال, سال پیش اگر کسی بالاخره جوایب دیگه پنجاب بودے اون وقت سینے به سینے منتقل میش میگیم کہ 400 سال پیش اینجا آب بودے ولی کو می بینی که ارتفاع کو مانوان مثال 500 متره همه قلهای کو آثار آب هست همه تا اونجا این زیر آب بوده کی بوده؟ الله بهتر می داند لذا پس وکانا عرشو عرش کنایه از دیالس از حکومت قبل از پیدایش زمین و آسمان حکومت الله چی بوده بر آب بوده. بعدن زمین و آسمان رو پیدا کرد و بعدن شما را پیدا کرد ل لوک کم احن و عملا. شما را پیدا کرد تا شما را بیا از مایت کدوم یکیتون عملش بهتر است وا این قل تا این نک م این اینجا سرزنش است برای کفار برای منکرین قیامت وقتی که دلائل را خدا بیان میکنه باید ایمان بیارن تسلیم بشند اما وقتی که شما می اگر بگوی ای پیامبر که شما مبعوث میشید سنده میشی بعد از موت لا یقول ان کفر و حتما حتما قاهند گفت کسانی که گفت کردند این هذا الا سحر مبین نیست این مگر جادوی آشکاری سحر به معنی جادو چیه ربتی داره خبری بده به معنی جادو نه معنی چکار خارق العاده یعنی سحر اینجا به جادو نیست اون جادوی که ما میفهمیم چون جادو جادوگر که جادو می کند چشم انسان ها رو میبنده چشم بند میکنه به اصطلاح مثلا این شعر حقیقتا تبدیل نمیکنه به اژدهای بیماری ولی جلوی چشم شما این چیز نشون میده که این داره راه می ره پس گویا نوی جادو نوی فریب است نوی چی هست غرور است فریب دادن است بس اینجا سحر به معنی فریب است به معنی اصل اون جادو نیست وقتی بے گفت بشید که به اونها گفته بشه که همه این انسان ها دوباره بعد از مردن زنده میشن لیقول لیقول ان الذين كفروا كفر گفت این هذا الا سحر مبین نیست این مگر فریب آشکار سهرن ای غرورن باطل البطلان تفسیر قرطبی گفته تفسیر کبیر گفته الا سهرمو مبین, مبین ای باطل موبین یه چیزی باطل چون سهر باطل است پس سهرن یا به معناهی باطلن یا به معناهی فریب ولی این آخرن ای عنهم العذابه یلا امت مال ایمان چی انکار است چرا اینها انکار میکنن قیامت را چرا انکار میکنن توحید را منشه انکار اینه خداون میفرم ماما این هر مهلت دادیم عذاب را مؤخر کردیم این تاخیر عذاب مغرورشون کرده اما قبلا خدمت شما عرض کردم اگر خدا عذاب را تاخیر نده عذاب را نقد بده عذاب را تعجیل بکنه به محض اینکه که کسی میگه نقبول ندارم خدا بزنه بکشه این اینکه کسی کفر میکنه خدا نیستش بکنه این اینکه کسی بگه قیامتی نیست خدا عذابی آفتی بر سرش بیاره خب همه کافرها خودشون را جمع میکنه یا نمی کنند میترسن دیگه از ترس همه میگن چشم ما قبول داریم ایمان داریم اینکه قبول داره ایمان داره چشم میگه از ترس این چه ایمانی شد ایمان جبر شد این ایمانه جبر شد دیگه تا میبینه که کسی انکار میکنه، خدا میزنی تو سرش به این خاطر خدا این ایمان را هم نمیخواد ایمانی که از روی ترس باشه ایمانی که از روی جعور باشه خدا ایمانی را میخواد مطلوب الله، ایمانی است که اون ایمان اختیاری باشد اون ایمان با اختیار خودت باشه فمن شعف و ومن شعف الیکفر فقط دلائل را خدا ذکر میکنه خدا دیگه به قول پاکستانی ها دنده را بالا سر نمیکنه و عرض کنم که گرز را بالای سر نگاه نداشته که یا اللہ ایمان بیار پس خدا تعالی به همین دلیل عذاب را مؤخر میکنه مهلت میده کسی قبول میکنه میکنه نمی کنه فعلا باش فعلا چند روزی زنده باش فعلا هرچی چی دلت میخاد بکن هیچ که تو کار نداره همین تاخیر خدا منشئ کفر شده من شه جرأت شده، من شه انکار اونها شده. الله می‌فرماید: ولی این آخرنا عنهم العذاب. اگر مؤخر کنیم از آنان عذاب را یا امت معدوده تا مدت معین و معدودی لیاقه نما یحبس هت من هت من گفت انکارا. کارم میگو ما یحبسو چی چیزی او را حبس کرده چی چیزی جلوی عذاب را گذاشته الله می الا يوم خبردار آگاه باش روزی که اون عذاب می آید لیس مصروفا عنهم از آنها برگش نمیشه بی سمت دیگه صرف نمیشه بی دیگه عذاب برده نمیشه لیس مسروفن عنهم ازنها منصرف نمیشه ازونها برگردانده نمیشه وحاق بهم ما کانوا به یستاهزون فروت می آیت بر آنان نزول میکند بر آنان ان عذابی که عذاب را مسخره می کردند لذا انسان بیچاره حکمت امHAL الهی را نمی داند، حکمت تاخیر اذاب خدا را نمی داند، و انسان مغرور میشه. ولی اذقنا الإنسان من رحمتًا الله میفرماید اگر ما بیششانیم انسان را اذاب خدمت رحمتی، رحمتی منزول سحتی، آفیتی، مالی، خسابی، خساب یعنی بحاری سرسبزیش عدابی وَلَئِنْ اَذَقْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهَ سِفَسْ اُن سپس گِرِمَزْ اُنْ انسان اِنَّهُ لَيَأُوسٌ كَفُور ان همانا این انسان مأیوس میشه نا امید میشه کفور ناسفاس میشه گرچه بازی گفتن لَيَأُوس لَيَأُوس مِنَ الْأَسْنَامِ ولی مطلقاً به معنای یک ناامید شدن است انسان خصلتش اینه و همچین اگر بهش باز نعمتی بدیم بیش عطای بدیم بی مغرور میشه ولا ان اذقناه نعمه آباد اضراء اگر بچشانیم به نعمتی بعد از آسیبی که مسحت او او رسیده بعد از مشکلی که به او رسیده بعد از مشکلات بعد از فقر گرس نگی اگر نعمتی بیش بدیم بی لا یقولان ذهب سی آتو عني حتما حتما میگوید تمام سیئات و تمام سختی از من رفت این لفرح فخور همانا این انسان غرور میکند و فخر فروشی میکند فرح کل فرح این فی القرآن بمعنی البطر از ابن عباس بود فرح خوشحالی و شادمانی کردن جرم و عیب نیست غرور ای است فرح به من غرور است مغرور میشه ته دل فخور فرغ، فرح و فخور اینه که فرح، غروری را میگن که ته قلبه و غرور، فرح و خوشحالی را میگن که بازها با جواریه. توری راه میره گردنش را بالا میگیره سینهش را میده جلو. انسان ها را چنان خطاب میکنه با گوشه چشم متقبرانه نگاه میکنه که گویی کی هست. گوی این فخور است، این که غرورش را به ظاهر به اعضا به جواره یا پشت ماشین مثلا پشت فرمان نشسته چنان باد کرده و ورم کرده که میگه از این بزرگتری تو این دنیا وجود نداره این چی هست فخور است، فخر فروچیه و فراهونه که تو دلش میگه همه کی چی نیستم منم فقط ببینید این آیه را که ما خواندیم مفهوم مخالفش را نگاه کنی خدا اون چیز را دوست داره اینجا خداوند گلایه کرد از انسان زجر و سرزنش کرد انسان را عطاب بیان کرد که انسان اگر خدا بهش رحمتی بده بعد از رحمت خدا اون رحمت و نعمت را ازش بگیره ناامید میشه و ناسپاس میشه پس مفهوم مخالفش اینه که اگر خدا از ما نعمتی را گرفت صحت را گرفت آفیت را گرفت سلامتی را گرفت اولا نامید نا نشیم همیشه امیدوار بگیم رب میده و میگیره گرفته دوباره میده نامید نا هم نشیم ناسپاس هم نشیم هر حالی هست در همو حال شاکر باشیم شکر گزار باشیم این از این گلائه موجود اگر برعکسیم بودیم ما چی میشیم ما مرضی من الله میشیم خدا از ما خوشنود میشه و دیگه اینکه خدا اگر نعمتی داد فرح و فخور نشیم در همون نعمت توازو توازعیمون فروتنیمون و ابدیت و بندگیمون بیشتر باشد کسی که خدا بهش نعمت داده بهش سرمایه و ثروت داده صحت و آفیت داده مال و اولاد دارده همه امکانات داده انتظار الله اینه که ایوادتی او هم بیشتر باشد. تا و بندگی هم او بیشتر باشد. نه که غرور بکوره و سرش را بالا بگیرد. پس به اکس این عمل کنیم میشیم مورد پسند دو رزای الله عزوجل. لذا الله میفرماید انسان اینگونه هست الا الذين صبروا و عمل الصالحات. اهل ایمان، اهل استقامت. اهل عمل صالح استثناثن اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَگر که سبر و عمل صالح انجام دادن انها این چنین نیستن الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَالَتَي النِّعْمَةِ وَالْمِحْنَةِ در هر دو حالت مثل همند. اگر برای انہا نعمتی باشد اگر برای انہا مصیبتی باشد فرقی نمی کنے عبادتش یک شکر و سپاس گزاریش یک حال حس هیچ تفاوتی در حال انہا دنیا بیعت برے سلامتی بیعت برے ارتباط انہا با خدا هیچ فرقی نمی کند لذا الله می فرمات اولائیک لهم مغفرت و کبیر اینها برایش مغفرت است بنده میبینه الله میبینه بنده را که بنده را من نعمت دادم شب و روز سجده منو میکنه نعمت رازش ازش گرفتم بعضم تو سجدشی تفاوتی نمی من بهش سلامتی دادم همه شکر میکنه سلامتی رازش ازش گرفتم بازم شکر میکنه بس اینکه در هر دو حالت نعمت و محنت برابر هست الله می این انسان مغفوره بلاخره دنیاش می و عجر و کبیر براش اجر و پاداشه بسیار بزرگی هست به این خاطر استقامت خیلی سخته استقامت یعنی چه؟ یعنی در همه حال همه احوال تلخ و شیرین بر ما می آید ما ارتباطمون با رب اصلا رنگ و ضعیف و متاثر نشه فلعل لك تاركم بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان جعل علل بمعنى ترجي نیست شاید امید هست نه به نیست اینجا عکس ترجی هست به تبعیده تبعید لعلک معناش بدور از انتظار بدور از توقع هست که شما ترک کنی ببینید چون که قبلا من نکته را درباره درباره معجزات عرض کردم مشرکین همیشه مشرکین زمانه نا برای قدرت فوق الاسماء فوق اسباب و فوق ما فوق الاضی پیامبران از معجزات استدلال میگیرند ما ها بار دست جار میزنیم عرض میکنیم که معجزات در دست پیغمبران نیستند از معجزه استدلال گرفتم پوچ و باطل را خداوند عزوجل ظاهر میفرماید به دست پیغمبر فقط و فقط چی هست ظاهر میشه کلیدی اصل معجزه به دست الله است لذا اگر از معجزه شما از معجزه به یک چیز خارقلاده و فوقلاده میرسید این قدرت قدرت اون پیغمبر نیست این قدرت قدرت خداست حتی پیغمبر سراحت میگه و ابره ال اکمه وال ابرس و اوحی الموت به الله لا بیز هر کاری میکنم می کنم به اذن الله چند روز پیش یکی کامنتی گذاشته بود در رابطه با یک موضوعی یکی از بزرگان گفته بود که خداوند عزوجل غیر از خدا هیچ کسی قدرتی نداره که بتونه انسانها را شفا بده یکی نوشته بود پس پیراهن یوسف چی که چشمان یعقوب را شفادات اگر پیراهن یوسف اون معجزه هست اون دست یوسف نبود از او استدلال بگیر بر قدرت خدا استدلال بگیر ببین چه خدایی هست با یک پیراهنی چشم نابینا را بینا می نه اینکه یوسف در اختیار یوسف نیست مال یوسف نیست اگر مال یوسف بود این چهل سال پدرش زار زار گریه نمی کرد تا این چهل سال کاری می کرد اینجا ببینید واقعا اگر به این آیه تدبر بکنیم میفهمید که پیغمبر حتی سردار پیغمبران اینجا بحث رسول الله است کوچکتری نقشی ندارد در معجزه مشرکین بهش میگن چند تا خواسته شما خواندید و هم میخوانید سوره فرقان چند تا هستند اونها میگن که هفت تا خواسته بودند از این آیاتی که به بده بدهید یکی از اونها این بود که خوب حداقل تو یک سرمایه خزانه انباری از طلا داشته باش ما ببینی واقعا تو آدم ناداری بودی الان یک خود دارا شدی معلوم میشه که خدای پشت سرت هست یا یعنی اینکه یک فرشته بیاد در کنار تو باشه ما ببینی فرشته هست تو رو تایید میکنه در همه این خواستها الله چی فرمود قل انما ال عند الله بگو که این معجزات را ظاهر بکنم دست من نیست در اختیار من نیست مال من نیست اینا مال خداست اینا کار خداست من یک بشری هستم انسان هستم خب از این آیه معلوم میشه قبلا من خدمت شما کردم که رسول الله بنوی تمایل داشتن چون بیش از حد حریس بودند بر ایمان مشرکان بر ایمان سرداران و سنادید قریش رسول الله خیلی علاقمند بودن بودند خیلی مشتاق بودند که یه چیزه که نشون داده بشه تا بحانهشون گرفته بشه الله هر خواسته که اونها داشتن خواستهشون را نشون ندار چون سنت الله است بعد از خواسته مطلوبه اگر ظاهر شده ایمان نیاورد بعد از اون دیگه عذابه بعد از اون دیگه استیصاله خب اینجا خداوند میفرماید که تو بعید از انتظارت، بعید از توقع است، فلعلك تارکم بعض ما یوحا ایلیک، بعید از توقع است که شما ترک کنی، بازی آن چیزی که وحی می شبیتو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و بعید است توقع است که وضائقم به صدرک که سینی تو تنگ باشی، دلت گرفته از چی؟ ان یاگولو لولا انزل عليه كنزن، اين كه میگویند اونها چرا با رو خزانه ای نازل نمیشه؟ او جا معه ملک چرا با او فرشتن نمیاد؟ از این دلت گرفته دلت میخواد یک چیزه کی باش نه، این به دست خدا خدا بهتر میداند. انما انت نذير تفغت بیم دهنده هستی ترساننده هستی نذیر هستی والله على كل شيء وکیل بر هر چیز مختار الله است بغیر از الله کسی نیست تو مختار نیستی اختیاری تو نداری لذا الله تعالی می فرماید که شما به اونها جواب بده که دست من نیست که من بیارم و دلت را هم تنگ نکن برخودت فشار نیار پرویشون نکن ام یقولون افترا بلکه آنها میگن این ان را از خود افترا کرده الله میفرمه قلفتو تو بعشر بی صور بیاورید ده تا سور این موجزه موجزه کوچیکی هست؟ دیروز ارز کردم دیروز اون صورت یک سوره بیارید چقدر اونها تلاش کردند نتونستند مگر دشمنان نمیخوان جواب قرآن را بدند ازار سال گذشته کم دانشمن داشتند کم از کنم محقق داشتند کم ملا و آخون داشتند کفار از اون زمان تا به امروز احل کتاب نصارا غیر اینها تا به امروز چرا کسی نیامد بگه که من مي كن من كره ام يقولون افتراء این میگویند یا می که افتراء گفته قل فأتو به عشر مثلی، مثلهی بی بیاورید دهتا سوریم مثل این قرآن مفتر که ساخته شده باشند ساخته و پرداخته بشر باشند نتنها خودتان ودعو من استطعتم من دون الله فریاد بزنید بخانید هر کسی را که می توانید بغیر از الله، این کنتم صادقی اگر راست میگید همه خدایانتون را همه شرکایتون را جمع کنید همه بیارد تا سوره بیارید اگر دهتا نمیتونید باز یک سوره بیارید اللہ میفرمه فَإِن لَمِيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اگر اینها اجابت نکردند اگر اینها جواب ندادند نتونستند اون وقت شما مؤمنین بدونید فَإِن لَمِيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَ ای فقل به آنان بگو بدانید اینجا فقل چی مقدره یعنی وقتی نتوانا معارضه بکنند نتوانا نظیر قرآن پیش بکنند پس آنان بگو یقین کنی که این قرآن ساخته و پرداخته من محمد نیست این تصنیف من نیست بلکه الله عزوجل و جل با علم فرموده الله می میفرماد فاعلمو انم اونزل بعلم الله بدانید که نازل شده این قرآن بعلم الله یعنی با وحی الله الله وحی فرموده و همچنین شما مشرکان بدان چون گفته شد که خدایانی تو رحم بگوید با شما کمک کنند هم نمیتونند پس شما مشرکان هم بدانید که و الله ایلاه ایلاه ای فعلمو بین بی یقین برسید بین بی باور بررسید، هیچ معبود لایق عبادت نیست اللہ مگر او فهل انتم مسلمون این استفام طلبی است، تسلیم نمیشید ایمان نمی آورید یعنی بی آورید دیگه یقین کنید که هم خدایان شما خدا نیستند معبود الله هست هم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرستا دے اللہ ثابت شد گی این کتاب از طرف اللہ پس ایمان بیاورید ہم به توحید ایمان بیاورید ہم به رسالت ایمان بیاورید بیا بیا من کان یرید الاخرہ وزینتها نوفی الیہم نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخصون اولئك الذين ليس لهم في الاخره, ليس لهم في الاخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا وباطل ما كانوا يعملون در دلایلی خاندیم، دلایلی دال بر توهید و رسالت. الله تعالی هم اثبات فرمودن که رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرستاده الله هست. چونکه اگر قبول ندارید مثل قرآن ده تصور بیارید و دیگه اینکه خدايان رحم بخانید. وقتی که نہ خدایان شما میتوانند نہ شما میتوانید دو چیز ثابت میشن یک اینکه انما انزل بعلم الله ان تصنيف و تالیف پیغمبر نیست بعلم الله نازل شده الله فرستاده دوم اینکه خدایان شما هم نتونن سنگاری بکنن و الله اله الا حال الله تعالی طلبی دن از اونها که تسلیم بشید دیگه بیشتر از این زد نکنید فهل انتم مسلمون تسلیم نمیشید شما بازم تسلیم میشید یا نه اگر تسلیم نمیشوند معلوم میشه یک دلیلی دارد اون دلیلش چیه؟ دلیلش حب دنیاست. دلیلش غرور و فریب کالای دنیاست. لذا در ادامه خدای عز زاجر بیان می یعنی عطاب و سرزنش همرا با تخویف اخروی اللہ می من کانی یرید الحیات دنیا و زینتها هر کسی تصمیم دارد اراده دارد زندگی دنیا را که در دنیا خوش بگذراند و زینت دنیا تجملات دنیا را تشریفات دنیا را زیبایی های دنیا را هاولای مثل همین مخاطبین قرآن که نه ایمان به توحید میارن نه ایمان به رسالت نوفی الیهم اعمالهم ما صورت کمال میدیم بسوئی انها جزای اعمالشان را فيها در همین دنیا یعنی هر عملی میکنند کنند پاداش اعمالشون را در دنیا میگیرن دیروز روز خدمت شما بحثی را مطرح کردم که کفار نتیجه اعمال خوبشون را در دنیا ممکن خواهند بگیرند حتی دعای می دعایشون در دنیا اجابت میشه. پس خداون می پس اینجا خداوند می که نوفی الیهم اعمالهم ای جزا و اعمالهم صورت کمال می دیم فیها در همین دنیا فیها در همین دنیا جزای اعمالشون را ما کامل بهشون میدیم. و فی لا در این دنیا کم نمیشه از اونها بخص کم بود را میگویند یعنی هیچ از اونها کم نمیشه اعمالشون کامل بهشون میرسه خدمتی کرده برگ را اختراک کرده هواپیما را درست کرده نمیدونم کمکی به انسانها کرده به یتیمها به بی بینواها هم دردی کرده پول تقسیم کرده گرست نگان را شکمشون رسیر کرده فی لا يبخصون. یعنی چیزی از اعمالشون و جزای اعمالشون نمیشه. کم نمیشه به اونها داده دا میشه دا دا اما آخرتی برایش نیست دیگه انتظار داشته نباشه این نیکی ها به درد بخوره به درد فردائی کسی میخورد که ایمان داشته باشه هر کاری بکنه هر چی کرده مثل الله ابن جدعان که ام المؤمنین عاشر رضی اللہ عنہ در او از رسول اللہ پرسید چون در جاہلیت مورد بود خیلی آدم دست و دل بازی بود صد ست, ست تا شطر می کشت و به مردم می رسول اللہ, رسول اللہ را پرسید یا رسول اللہ آیا به او نف میده کارایش فرمود نه مفهوم حدیث همین چون ایمان نداشت یک روز نگفت رب بغفر لی خطیعتی چون اعتقاد نداشت، باور نداشت در دنیا جزای خودش را میگیره در دنیا یک آغای مسیحی، تبشیری پول خرج میکنه خدا دیگه بیش میده کارها وفق مرادش پیش میره پس این مسئله هم حل شد که چرا اینها کفار وزشون در دنیا خوبه چون اول و آخر بینها در دنیا میرسد اما الله میفرمید أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار این افراد این گروه کسانی هستن نیست برای آنان چیزی دیگر در آخرت مگر آتش هست و حبط ما طماس نعو ودر و در قیامت برباد میشه تباه میشه آنچه که انجام دادند در دنیا و باطل ما كانوا يعملون و آنچه که عمل کردن باطل میشه یعنی زائم میشه تمام اعمالشان زایه میشه برای آخرتشون چیزی باقی نمیمانه چون ایمان به آخرت بر... کسی برای آخرتش چیزی میمانه که ایمان به آخرت باشته باشه. اف من کان علا بینت من ربه اینجا خدای عز و جل دلیل دیگری بر صداقت و بر حقانیت رسول الله بیان میفرگویا این دلیل دیگری بر رسالت است. قبلا دلیل رسالت رشمخان دید که قرآن است ده تا سوره مثلش بیارید و هم دلیل بر توحید خدایانتون کو کبیریت حال دلیل دیگری بر قرآن گرچه درباره مستاق این فرد که من کان علی بینت من ربه و يتلوه شاهد من اختلاف ولی قول صحیح قول درستر قول محقق همینی که من کان علی بینه من ربه خود رسول الله است کی هست خود رسول الله الله می فرماید اف من کان علی بینه توج کن ای رب فهمی زمائر را اف من کان علی بینه من ربه آیا اون انسانی که مثل محمد صلی الله علیه و سلم اون انسانی که باشد بر بینه از جانب ربش یعنی با مدرک است بینا مراچی دلیل عقلی بینویسی و هو دلیل العقلی تفسیر ما گفته آیا اون انسانی که باشد بر بینا از جانب ربش دلیل و مدرک از جانب پروردگار این دلیل عقلی دارد ان انسان نگاه بکنت از نظر عقل واغن احوال رسول الله را قبل از اسلام قبل از بیستات اخلاق صداقت، امانت درستکاری کوچکترین حرکتی خلاف ادب صادر نشد یه روزی کسی ایشون را با سخن بیجا نشنید ندید و نه تنها دلیل اقلی دلیل اقلی چون دیگه زیاده این که اخبار از گذشته میگه از آینده میگه از غیب میگه در حالی که یک خط بلد نیست بنویسی و ما كنت تاخذته بيمينك تو با دست راست با دست چیزی نمینوشتی در گذشته قبل از بیست اذا لرو المبتلون او وقتی علی باطل شک میکرد میگفت این خو همون تعدیرو سواد داشت همین چیز داشت او لابد بود کتاب خودش نوشته از دلایل اقلی برای حقانیت رسول الله زیاد است کل زندگیش، فقد لبستو فی کم من قبلی، افلا تعقلون یک عمر میان شما بودم. بررسی کنید زندگی من را. کجا ایبی کجا ایرادی، کجا یک خلاف گفتنی، دروغ گفتنی هست، کجا یک حرکتی بیجای که ماه امروز نسبت جنور به می من میدهید. لذا الله میفرماید، افمن کان علی بینت من ربی. آیا اون شخصیتی اون انسانی که بر بینه و بر دلیل عقلی باشه از جانب ربش تنها دلیل عقلی نیست دلیل نقلی هم داره و یتلوه شاہد یتلوه یعنی یتبعه یلحقه او اورا دنبال می کند یعنی او را تایید می کند شاہد من ہو ای شاهد من الله این شاہدی که از جانب خدا پیغمبر را دنبال می کند و تایید میکنه چیه بنیسی پایی و شاہدی که از اللہ کیه قرآن هست من ہو یعنی من اللہ ومن قبله و بعد این قرآن کتابی نیست که مسبوق به سابق نباشد قبل از این کتابی مثل این آمد نباشد نا نمونه قبل از این هم داریم ومن قبل از کتاب موسیٰ امام و رحمه قبل از این هم کتاب موسیٰ هست که اون کتاب موسیٰ هم چی بود هم امام بود یعنی رحنما بود و هم رحمت بود، امام بود، علما یعنی راهنمای بود کسی میخواد بدونه علم داشته باشه راه راه، هدایت راه، اورا راهنمای میکرد، و کسی بهش عمل میکرد رحمت، عملن، پس یتلوه یعنی یتلوه، یالحقه، یتبعه، و مراد شاهد قرآن و زمیر من هو من الله، بس اون انسانی یعنی اون محمد که دلیل داره و اورا قرآن هم تعیید میکنه و هم قرآن قبل از قرآن کتاب موسیٰ بود که هم مثل همین قرآن بر پیغمبری از پیغمبران نازل شد خب این کسی که چنین هست ایبقا موزع شبه جواب افمن مقدره آیا یک انسانی که با چنین دلائل و مداری کی میاد جای شبه درباره او هست نخیر خیر هیچ محلی از شبه نیست لذا الله می فرماید اولائک یؤمنون به انها یعنی صحابه مسلمانان مؤمنان اینها ایمان می آورن به قرآن اما هر کسی که غیر از این عمل کرد و من یکفر به من الاحزاب فنار موعده هر کسی از بقی احزاب از بقی گروها ببینید یک بحثی قبلا من خدمت شما عرض کردم مسئله که امروز در دنیا مطرح است که وحدت ادیان وحدت ادیان معنیش اینه که همه انسان‌ها یک زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشند همه در مسیر خدا هستند یهودی به همون یهودییت خودش عمل کنه نصرانی نصرانیت خودش عمل کنه اون زرتشتی به زرتشتیت خودش عمل کنه مسلمان به مسلمانیت خودش عمل کنه در کنار هم مسالمت‌آمیز زندگی کنند مسالمت‌آمیز زندگی کنند با این ما بحثی نداریم زندگی کنند اما ناجی نیستند وحدت ادیان باطل ناجی نیستند تا زمانی که به رسول الله ایمان آوردند باشند لذا الله می ومن و من یکفر به من الاحزاب احزاب تمام گروها یهودی مسیحی زرتشتی بهائی نمیدونم صابی غیر صابی همه وَمَنْ من بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ هَرْكَسِ بِإِنْ كُفْرْ كُنَتْ بِقُرْآنِ وَرَسُولُ اللَّهِ اَزْ أَحْزَابِ اَسْتَمَامِ قُرُوهَا تَمَامِ مَزَاهِبُ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ مَوْعِدَشْ آتَشَسْ فَلَا تَكُفِ في مِلْيَةٍ من. تو هرگز ای مخاطب نباش در شک از قرآن هیچ وقت درباره قرآن شک داشته نباش به دلیلی اینکه انه الحق من ربك همانا این حق است و یک واغیت است از جانب ربت ولكن لیکن اکثر الناس لا يؤمنون اما اکثر مردم ایمان نمی آورند اکثر مردم دنیا را نگاه کن قبول نندارند ملاک حقانیت اکثریت نیست اكثر يما نادرا اكثر دمار سيري باطل hẳn ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم حال خداون بعضهم إن زجر تخويف بود فالنار معيده بود بعضهم زجر تخويف براي کساني كه بر خدا افترا ميگويند ببینيد افترا گفتن بر خدا و دروغ گفتن همه‌نا دروغها رو شامل میشه یکی هست مدعی نبوت مثل مسیلمه کذاب میگه خدا منو مبعوث کرده اینم دروغه یکی دیگه میگه که این خدایان را که ما عبادت میکنیم خدا گفته اینا مقربان و خاصان من هستند اینها را عبادت کنید اینم دروغ میگه بر خدا یکی میگه این فرشتگان دختران خدا هستند خدا دوست داردشون خدا گفته اینها را عبادت کنید اینم دروغه هر دروغی دروغ مشرک باشه دروغ مدی نبوت باشه دروغ یهودی باشه که میگه که نحن ابنا الله و احباءه الله می فرماید ومن أظلم من ممن الله کذبا چیکسی ظالم تر چیکسی ستمگر از اون کسی افترا گوید بر الله دروغ اولائک یوردون علی ربهم انها ارز میشوند در روز قیامت بر در محضر رب و یقول هؤلاء الذين کذبوا علی ربهم عنوان جرم چیه جرم واقعا سنگینه یکی جرم کرده چه گناهی کرده فلان گناه را کرده با خودش این قابل بخششه اما گواهانی فرشتگانی که می بر علیه اینها گواهی اونجا چه گواهی میدهند عنوان جرم و یقول الاشهاد اشهاد می گویند ها اولائی الذین کذبو علی ربهم اینها کسانی هستن که دروغ گفتن بر ربشان الا لعنت الله على الظالمين این دروسط ادخال الهی است هنوز داستان ادامه داره اما دروسط الله می فرماید خبردار آگاه باش لعنت الله على الظالمین بچنین ظالمین و برچنین مشرکینی که بر خدا دروغ میگوین لعنت خدا و نفرین خدا باد یعنی دوری از رحمت الله خب اینا کیا هستن؟ الذين يسدون عن سبيل الله کسانی هستن این اوصاف ظالمین کسانی هستند که باز میدارن از راه الله از توحید از اسلام از دین خدا و عوجا حوجا و با شبهات خودشان می طلبند در اون راه خدا کجیرا کجیرا انحراف را شک و تردید را تمام دشمنان امروز ببینید از طریق شبکای مختلف هی hey, اشکال ایراد می کنند هی hey, شک و شبه وارد می کنند ای hey, دروغ می بافت اینا همیش مشمول این آیه هستند این آیه هستند فقط این آیه اون اهل کتابی که در صدر شبهات می افکندن نیستند و هم بالآخرتی هم کافرون اس سبب اصلی اینه اینا خو آخرت ایمان ندارن قیامت. ایمان و باور ندارند به این خاطر اینقدر جری هستند اینقدر شب روز توتعه و برنامه بر علیه کتاب خدا و نبی خدا دارند ولی اینها هر چقدر زیاد باشند خدا را آجز نمیکنند خدا را ناتوان نمیکنند خدا اینها را به اشد مجازات گرفتان میکنند خدا را آجز نمیکنند یعنی, یعنی نمیتونند در برم مخفی بشند جایی که خدا دسترسی رسیبیشون نباشه. نباشی اولئیک لم یکون معجزین فی الارض اینها نیست آجز کنندگان رب یعنی قدرتی ندارند در زمین خب اینها مگر حامی پشتیبان ندارند خدایانی آلیهی که برای اونا گسفنج کشتن شطر کشتن نظر و نیاز دادن انها را صدا زدن فریاد زدن الله می فرمد ما کان لهم من دون اللہ من اولیا برای اینها بغیر از هیچ حامیانی نیست من اولیا ولی بمعنی چیه؟ حامی مالک من دون اللہ من ولی ولا نصیر هیچ حامیانی نیست یضاعف لهم العذاب دو برابر میشه عذاب یا چند برابر میشه چرا؟ به دریل و ازلال هم خودشون گمراه بودن هم با این شبه افکنی خودشان با این فرافکنی خودشان دیگران را هم گمراه کردند در دل دیگران هم شبهات القا کردند شب و روز نشستن اشکال و ایراد گرفتند بسیاری از افراد جاهل را هم منحرف کردند یضاعف لهم العذاب ما کانو یستطیعون السمع و ما کانو یبسرون اینها خودشون قابل هدایت نیستن نمیتوانند گوش کنند چون را خدا از اینها گرفته سمن ما کانوی استتیون است نمی نمیتوانند که گوش کنند احکام خدا و دستورات خدا را و ما کانوی نمی نمیتوانند حق را ببینند آومیون اینها کورند الله تعالی این قدرت را و این صلاحیت دید را از اینها گرفته انها در هر دو دار در هر دو دنیا در خساره ابدی و سرمدی هستند اولئک الذین خسروا انفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون اینا کسانی هستند که در خساره واقع کردند خودشون را و ناپدید شد از آنان ضل عنهم گم شد ناپدید شد آن چیزی که افترا میگفتند چه افترا می گفتند خدا یعنی را شریک خدا قرار داده بودند حالا اونها گم شدند ناپدید شدند از نصرتشون از کمکشون اونها بیاریشون نیامدند اینها هم هیچ کاری نتونستند بکنند لا جرم لا جرم یعنی قطعا یقینا لا محال انهم في الاخرت هم الاخسرون اینها در آخرت از زیانکار ترین افراد هستند از پرخسار ترین؟ انسان ها امینا هستند که هم گمراه شدند در مسیر شرک و کفر قرار گرفتند و هم دیگران را گمراه کردند تبلیغات کردند و دیگران را هم دنبال خودشون بردند اما در مقابل این انسان های ضال و مضل که هم خودشون گمراه بودند و هم دیگران را گمراه کردند در مقابل این ها ما کیر داریم اهل ایمان را داریم اهل تقوا را داریم احل بحشت را داریم الله تعالی احل ایمان را ذکر می فرماید و بعد پاداش اخروی اونها را ذکر می کند بعد از این که پاداش اخروی اونها را ذکر می کند بعد از اون یک مقایسه می کند بین کافر و مسلمان بین مشرک و موحد الله می ان الذين الَّذِينَ آمَنُوا الصالحات. بدون شک کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و اخبتو الى ربهم و بسوی ربشان از خودشون توازع دادند اخبات یعنی فروتنی توازع دادند اینجا خدای تعالی سه صفت بیان کرده برای اهل ایمان اول اعتقاد آمنو عقیده درست دوم عمل و عمل الصالحات عملشون درست سوم چی اخلاق تكبر و اخبتو یعنی متواضعند تکبر نمی شما اونجا مشرکان را خاندی تکبر دارند لذا الله می فرماید بدون شک کسانی که ایمان آوردند، عمل صالح انجام دادند، ثوابو از خودشون نشان دادند، به سوی رب اصحاب اولاً ایک أصحاب الجنة، اینها بهیشتی هستند، هم فیها خالدون اینها همیشه در اون بهشت به صورت مخلد میمانند، به صورت دائم و مؤبد میمانند. وظیل مقایسه این، این گروه با گروه اول مثل الفريقین. مثال این دو گروه مثال این دو جماعات کال اعما والاسمه والبصیر مثل اعما واسمه مثال مشرکه اعما يعني یعنی نابی الاصم الاسم ناشنواست ومثال موحد مثال موحد والبصير والسمیع بی ناس شنواست اونکی اونی که میشنود آیا برابر است با اونی که نمیبیند نمیشنود هرگز براغبر نیست هل یستویانی مثلا آیا این دو صفت این دو مثال با هم برابر استند نه نیستند افلا تذکرون آیا شما پند نمیگیرید چرا نوز پند نمیگیرید چرا متوجه نیستید متوجه بشید پند بگیرید ها هرگز با هم برابر نیستن پس شما برای خودتون تکلیفتون را تعیین کنید کدوم مسیر را باید بگیرید ولقد <تصفح> ارسلنا نوحا الى قومه خدمت شما قبلا عرض کردم که در این سوره بیشتر دلایل نقلی هست به روایت از انبیا به نقل از انبیا که انبیا تمام جد و جهدشون را در همین راستا انجام دادن در راستای توحید اثبات وحدانیت خدا اینکه همه اعمالمون را همه عباداتمون را همه قرنشا و دعاها را برای خدا انجام بدیم تمام انواع عبادت ها برای خدا انجام بدیم برای غیر خدا انجام ندیم پس ببینید کسانی که حاصل این داستانها چیه؟ حاصل و خلاصش اینه این ای که انبیا دعوتشون مثل دعوت محمد صلی الله علیه و همونطور که محمد رسول است، اونها هم رسول بودند. و کسانی که از اونها پیروی کردند مثل اصحاب رسول الله، کسانی که حمایت کردند مثل یاران رسول الله، اونها موفق شدند، اونها نجات یافتند. کسانی که انکار کردند، ابا کردند مثل ابو جهل، مثل اطباء، مثل شیبا. اونها حلاک شدند مثل اینها این هم شدند دیروز خاندیم اینها تو بدر حلاک شدند تمامی کسانی که رسول الله نام گرفت یا الله اینها رب نابود بگردان ابن مسعود میگه قسم به خدا اینها رب تو اون قلیب بدر دیدم که کشته بودند جنازه هایشون روی هم انباشته بود لذا این چی هست این در واقع دلیل نقلی هست فاعتبرو یا اولی الابسار کسی که عاقل است کسی که فهمیده است باید درس بگیرد لذا اولین داستان از نو علیه صلی اللہ و سلام پیغمبری که بیشترین مجاهدتارا بیشترین زحمتارا کشید فلبس فیهم الف سنت الا خمسین عاما هزار سال منهای پنجا پنجای تا کم کن مدت کمی نیست لذا این پیامبر چه تحمل کرد چه سختی های را برداشت کرد الله می فرماید ولقد ارسلنا نوحا الى قومه همانا ما فرستادیم نوح را به سوی قومش بسوی اما فرق نو با رسول الله رسول الله الى کافت الناس است نو فقط بسوی قومش است و لقد ارسلنا نوحا الى قومه اما نما فرستاد نوح را به قومش و قوم نو چی گفت تخویف اني لكم نذير مبين اي قوم من من برای شما یک نذير و ترساننده آشکاري هستم آشکارا از عذاب الله مي ترسانم با چه مضموني آمدي منشور تبلیغ تو است مضمون تبلیغی تو چی هست الله تعبدو الا الله با این مضمون با این پیام که عبادت نکنید هیچ هستی رب جز الله انسان تعجب میکنه از این انسان هایی که خودشون را مسلمان هم میدونند و باز هم غیر خدا را عبادت همه انبیا همه فریاد را زده الله تعبدوا الا الله چرا اینها به در غیر الله میرن چرا از غیر الله میخوان چرا از بندگان خدا میخوان بندگان خدا خودشون بنده بودند اونها را الله عزوجل اگر بجای رسیدند بر لطف الله پس ما هم همون الله بچسبیم الله تعبدو الا الله اینکه شما پرستش نکنید عبادت نکنید هیچ هستی را به جز الله اینی اخافو علیکم قبلا بی صورت اجمال گفت اینی لکم نظیرون مبين این تخویف اجمالی بود این تخویف تبسیلی هست اینی اخافو علیکم عذاب یومن علیم همانا من نوح می ترسم بر شما از عذاب روز روزی درد روزی که درد میاد سخت اون روز می ترسم نکنید اما درباریان چی گفتن ملا چی گفتن سرداران چی گفتن مستکبران چی گفتند در هر زمان ایده مثل همه است فقال الملأ الملأ الذين كفروا من قومه گفتم ملأ اشراف درباریان اونها که کف کردن از قوم گفتن حماقت اونها را ببین ما نراک الا بشرا مثلنا انسان که بظاهر نگاه کنت همین نه ما تورا نمی بینی مگر بشری مثل خودمو می و ما نرا کا تبعک هم اراذلنا باد الرای اشکال دوم اینه که ما نمی تو را دنبال کنند تورا پیروی کنند مگر اراذل ما اراذل به اعتبار چی بود به اعتبار عمل نبود به اعتبار کسب و کار بود اراذلنا یعنی به اعتبار کسب و کار آدم های قشر پایین جامعه نه اینکه اونایی که ارازل امروز یک اصطلاح خاصی هست ارازل اوباش کسانی که فساد می کنند در دنیا گناه می کنند معصیت می کنند کسانی که ارز کنم اوباشی می کنند اون هم منظورشون نبود و اونا پسترین ما به اعتبار عرض کنم که کسب و کار مثلا چوپان هست کارگر هست کفاش هست نمیدونم لباس های مردم رو میدوزد خدمت مردم میکند و مشورت می ای اینها دنبال تو هستند اشراف نیستند ها نیستند سرمایه‌دارها نیستند همیشه اکثرا الا ماشاءالله اکثرا متبعین انبیا اینها بودند لذا میگوین وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الذين هم أَرَاضِلُنَا مگر کسانی که ارازل وانسان های قشر زیفی ما هستن بادی الرعی يعني ظاهر الرعی انها نظری انچنانی ندارند رعی نظرشون نظری بادی هست یعنی ظاهر هست اونها اگر فکری داشتن اگر درکی داشتن اقلی داشتن پول, پول دار می شودا برای خودشون چیزی جمع می زرنگی به خرج می دادن غافل از اینکه همه چیز تقسیم رزق به دست با زرنگی نیست خیلی ها را مامی بین ماشاء اللہ زرنگ هستند علم دارند دانش دار اصلا رشتش اقتصاده رشته مدیریت بازرگانیه ولی شب نداره خیلی ها هستند که می بینیم خط نوشت بلد نیست ولی اینقدر داره که کامپیوتر هم نمیتونه حساب بکنه پس اینها حماقت این قوم این بود که فکر می‌کردند هر کسی که پول داشت اون عقل داشت اون از عقل و خرد خودش بین جرثیله نه اون تقسیم الله به هر کمی ده الله می فرماید و ما نرى لكم علینا من فضل ما نمیبینیم برای شما ای نوح بر خودمون هیچ نو فضلی هیچ نو برتری بل نظن نکن کاذبین بلکه ما شما را میپنداریم شما دروغ گویید از عزوالله به پیغمبر این نسبت را دادن اما پیغمبر چی میگه؟ پاسخ پیغمبر ببین احساساتی نمیشه نمیگه این هیچ وقت یک دعوتگر نباید احساسی برخورد بکنه بعضی هستن به گمان خودشون دعوتگر هستن تو همین شبکه های اسلامی یهو رفت فش میدم به مردم کسی زنگ زده بد گفته خب بد گفته به پیانورانم بد گفته نمیدونم شما کافرید شما مشرکیش نه با منطق با مدرک او را تفهیم کن هرچی بد میگه خودش را سبک نکنه. لذا انسان نباید احساسی برخورد کنه نباید انسان پرخاشگر باشه بلخصوص دعوتگر این قدر تحملش بالا باشه این قدر سیصدرش بالا باشه که اگه تو گوشی ددند هم ناسحانه خیرخانه راه را نشون بیره لذا اینا به نوح میگن که بلنظن نکم کاذبین، نگفت که شما مشرک شدید کافر شدید مستقیم به جهنم میرید لا. قال يا قوم أرأيتم أي قوم من بمن خبر بده أرأيتم من أخبروني إن كنت على بينة من ربي أجر من بربين باشم بردليل مدرك باشم أس جانب ربم وآتاني رحمة وأجر رب من بمن رحمتي بده بمن نبوتي بده من عنده از جانب خودش فعمیت عليكم اما این مخفی بمانه بر شما بر شما پوشیده بمانه شما متوجهش نشید من میتونم به اجبار شما رو مسلمان کنم نه من فقط دلائل میگم شما دلائل من توجه کنید شما فورا, فورا, فورا انکار نکنید فورا منو نگید دروگو شما اول ببینید مطالبی که من میگم آیا این مطالب خلاف عقل است خلاف واقعیت است لذا میگوید فعمیت علیکم مخفی بشه بشیب، پنهان بشه بر شما انولزمكموها آیا من ملزم کنم شما را بیان یعنی بلعیبار هیچ وقت دین دین اجباری نبوده من میتونم شر ملزم بکنم بیان و انتم لها کاری در حالی که شما اون را نمیپسندید توحید را لا اله الا الله را من نمیتونم من فقط دلایل را برای شما میگم بعد از اون اختیار مال خودتون و هم این بدونید اقام ای من برای تمان نیامدم از طریق نبوت بخوام نان بخورم بخوام از شما پاداش بگیرم گاهی یک دعوتگر یک داعی در مسیرش دوچار و مشکل میشه که میخواد از همین طریق ارتزاق بکند از, از همین طریق بخورد بهتر این است که برای معاشش از طریق دیگه باشد خودش کار کند خودش زحمت بکشه خودش بالاخره فعالیت بکند فعالیت معیشتی اقتصادی بکند از این طریق از مردم تمع داشته نباشد یک ریالی تمع داشته نباشد چون اگر تمع داشته باشد اون وقت دعوتش تأثیر آنچنانی نخواهد داشت ما بعضی بلاد اینجا تو ایران نیست جاہ دیگه ما ما شاءاللہ مبلغینی داریم خیلی خوب صحبت میکنن دلایل را خوب انوان میکنن ولی برای هر تبلیغی ده هزار روپیه بیست هزار روپیه پنجا هزار روپیه میگیرند خب این دیگه تاثیر نخواهد داشت پیغمبر اینجا چی میگه ویا قوم لا اسألکم علیه مالا ای قوم من من سؤال نمی کنم بر این تبلیغ از شما مالی ان اجری الا علی الله نیست اجر من نس پاداش من مگر بر الله است من از الله ولی شما حرف منو گوش کنید در رابطه با این فقیر فقرا شما میگید که را من ترد بکنم وما انا بطاردن لذین آمنو من ترد کنند نیستم من دور کنند نیستم کسانی را که ایمان آوردند اون حسابشون با خدا شما میگید که این ها نمی فهمن بادی الرائی رای هستند. هم ملاقات ربهم همانا این ملاقات کنند دی شان هستن معامله این کار اینها با خدا بستگی داره ولیکن نی اراکم قوما تجهلون اما ای قوم من شمار قوم جاهل می بینم نادان هستی نمی فهمید خیر خواهیتون را تشخیص نمیدهید. دهید وا. در ادامه دلایل ببین پیغمبر واقعا غنچه کلمات حکمتی میگوید و یا قوم من انصرنی من الله انترد تهم، ای قوم من، ای فامیل من کسی مرا یاری میکند از عذاب خدا من الله ای من عذاب الله انترد تهم اگر اونها من ترد کردم، اگر اونها را از خود زدم، افلا تذکرون چرا شما تذکر نمیگیری آیه پن نمیگیرید؟ اینان همین خواسته را از رسول الله داشتن نه گفتم ما هر وقتی که میایم پیش شما اون سرداران قریش ما که میایم پیش شما بلال نشسته خبیب نشسته قباب نشسته عمار نشسته فقرا نشستان اینا تا دیروز برده ها و غلام های ما بودند ما چطور در یک حلقه با اینها بشینیم ما که میایم اینا نباید باشند اینا, باشن. اینا رو بیرون کن الله عز و جل اکس العمل ولا وَلَا تَطْرُدِ اللَّفِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي انا که صبح و شام اللہ را فریاد می زنانت اللہ اللہ از اطرافت ما علیکم من حسابهم من شئی وما من حسابك علیهم من شئی حساب تو بر اونها نیست حساب اونها بر تو نیست اونها حسابشون با منی الله. اگر انکار را کردی فتحت رو دهم من الظالمین سبحان الله. الله چقدر فقرا را دوست دارد فغراءی که امامین باشند فغراءی که با ایمان باشند الله خیلی دوستشون دارد حتی به پیغمبرش تذکر میده مبادا بس نوح علیہ السلام همین را میگه اگر من اینا را ترد کردم قطعا برای من از طرف خدا مصیبتی میاد من ینسرونی من الله ایم ترد اگر ترد کردم کی مرا یاری می کند بس ببینید عزیزاً معیاره عزت یک انسان سرمایه و پول نیست ایمان هست ایمان تقوی خدا ترسیه هر کسی که دید که ایمان داره هر کسی دیدید که با خدا هست مسجدی هست دوستش بدارید اکرامش کنید کفشش را بگیرید روی سرتون بذارید چه یک ریال هم ندارد این عزت داره این پیش خدا عزیز است بگواهی انبیا در قرآن این پیش خدا عزیز است لذا اصل اینه فتتردهم فتکون من الظالمین اینجا هم میگه که من ینصرونی من الله انتردتهم افلا تذکرون و بعد و بعد ولا أَقُولُ لکم اندی خزائن اللَّهِ اونها هم مثل این از رسول اللہ مطالباتی داشتند از نوح مطالباتی داشتند چرا سرمایه نداری چرا بما از غیب نمیگی چرا تن غزامی خوری زن و بچه داری لذا همينها را جواب داد حضرت نو علیه السلام عیناً همین اعتراضات را بر رسول الله هم داشتند ولا اقول لكم عندي خزائن الله من نمي پیش من خزائن الهی هستند نه من یه پیغمبري خدا هستم خزائن در دست خدای خدا ولا اعلم الغيب و من هم علم غیب ندارن که به شما خبر در بدم درباره شما درباره آینده شما ولا اقول انی ملک و من هم نمیگویم که من فرشته هستم از فرشتگان که نخورم ننوشم زن و چه داشته نباشم نیاز داشته نباشم نه بشرم ولا اقول للذین تزدرى اعینکم و نمیگویم نسبت به اون کسانی که اونها را چشمان شما حقیر برش مرده از نظر چشم شما اونها حقیر است همین فقراء نمیگویم لم یعطیهم الله خیر خدا هیچ خیری به اونها نمیده نه خدا بهتر میدونه الله آلم بما فی انفسهم شما میگیم هم ارازل اونها قشر پایین است خدا بهتر میدونه از درون اون بعضی میگم بادی الرائع بادی رد دو تا تفسیر داشت بعضی میگم بادی الرائع اینه که از نظر فکری فکری ندارند ظاهر و رای هستند بعضی میگن بادی به معنی ظاهر به اینکه ایمانشون ظاهری است یعنی اینا با تو نیستند اینجا نوح میگه الله عالم بما في انفسه از درونشون خدا بهتر میدونه انی اذا ل من الظالمین لذا اگر منی را از دور برم پراکنده کردم بیرون کردم به خاطر شما من از ظالمین خواهم بود اونجا به رسول الله، الله تعالی چی فرمود فتات رده هم فتکونه من از لذا من این کار را هرگز نمیکنم. کنم بلاخره اناد قوم قوم وقتی که دید که نو این افراد قشر پایین را از خود ترد نمی کند البته تنها بحانهشون نبودی نب یک اینم یک ای بود لذا گفتن خب پس ما و شما نتیجه اینات خواهیم گرفت ما از دلایل شما قانه نمیشیم شما از حرف ما لذا همون عذابی که ما را میترسونی بیار ما منتظرش هستیم قوم وقتی که اینقدر جری باشد بعد از اینکه که هم از نظر دلایل عاجز شدن دیگه گفتن نوح بیشتر از این بحث نکن با ما بیشتر دلایل نمیار نمیخواهیم جوابم نداشتم قالو یا نوح قد جادلتنا گفتن ای نوح تو با ما جدال کردی تو با ما درگیر شدی فااکثر جدالنا زیاد جدال ہم کردی درباره موضوع توحید فتنا بما تعیدنا بیا بیاور آنچی کی وادمی کنی با ما ان کنتم من الصادقین اگر صادقین استی اگر راست میگی بیار هر ولی را و ببین سبحان الله پیغمبر خدا هزار سال زحمت کشیده ولی عذاب و کلید ازاب بده نیست است امده سیال است زحمت میکشه جایگاهش بالا میره اما به جای خداایی نمیرسه اشکال بسیاری از جاهلان همینه که دوستان خدا را میبرم به جای خدا قرار میدم میگن اینا به ما فرضن میدم به ما مشکل ما را حل میکنن نه نوه پیغمبر با اون جایگاه با هزار سال زحمت هنوز میگه که من من متصرف عذاب و مختار عذاب نیستم عذاب به دست من نیست قال انما یاتیکم به الله ان شاء جزئی نیست که می آورد اون عذاب را الله می آورد اون هم ان شاء اگر خدا بخواد اگر مشیتش باشه من نمیدونم وما انتم انتوم به معجزین هرگاه ازاب را بیاورد و ما انتوم شما نیستید آجسک کنندگانی الله و بیارید دیگه شما جلوش را نمی تری بگیرید. ولا ينفعكم نصيّه إن أردت أن أنصح لكم أيقام نصيحت من خير خايم من بشما هیچ نفعی نمی‌رساند اگر من اراده کنم خیر خواهی باشم برای شما ان کان الله يريد ان يغويكم اگر الله بخواهد شما را, گم را کند الله بخواهد شما را بیراه کند من هر کاری بکنم من نمیتونم چون مختار کل الله است نمانی پیغمبر هو ربكم این علت است او هست رب شما او هست تربیت کننده شما، او هست نگهدارنده شما، و ایله‌یی ترجعون فقط و فقط بسیاری او برگردانده میشود بعد از بعث بعد از زنده شدن هم سوی پروردگار برگردانده میشوید حال الله عزّ و جلّ به پیغمبرش میگه، ام یقولون ابترا آیا اینها میگویند که این حرفار از خود دروس کرده؟ قل این بگو اگر من افترا گفتم من از خود درست کردم این وحی را این رسالت را این قرآن را یا اجرامی جرم من بر من هست شما چرا نگرانی اما وانا بری ام ما تجرمون من هم از جرم شما از شرک شما از کفر شما بیزارم منتظر فیصل خدا میشیم على ای حالن نوح علیه سلام و سلام تبلیغ را ادامه داد فعالیت را ادامه داد ادامه داد ادامه داد تا اینکه این مدت مدید سپری شد این مدت طولانی گذشت آخر خدا بهش گفت که ای پیانبر من ای نوح همینی که هست هست بیشتر از این کسی ایمان نمیاره و اوحیه الی نوحین وحشد بسوی نو انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن هرگز ایمان نمی آورد از قومت مگر همین هایی که ایمان آوردند لذا هر چی میگوین ناسزا میگوین بد و بیرا میگوین معیوس نباش فلا تبت اسب مکان و فعلون، معیوس نباش به اون چی که یعنی از این به بعد کفر میکنند استهزا میکنند تمسخور میکنند معیوس نباش برو کارت را بکن این مقدم چینی عذاب برو کشتی را بساز برو زیر نظر ما با حمایت ما این صنعت را این حرف را شروع کن وصنع الفلك بی اعیونینا کشتی را بساز زیر نظر ما می در تفاصیل نوشته که فرشتگان را الله تعالی مامور کرده بود فرشتگان نور را راننمایی می کردند او را همکاری هم میکردن که به این شکل بساز به این شکل درست کن و کشتی درست کرد کشتی درست کرد کشتی میگن سه طبقه ای بود الله اعلم سه طبق این کشتی را نوسلامات و سلام درست کرد در یک قسمت کشتی ا کنم که حیوانات بودند خزندگان بودند و در یک قسمت دیگر قسمت پایینی. البته این ها حرفای تفسیره این هم برگرفته از کتاب های کتاب هست لا نصدق و لا نکذب در قسمت بالاترش حیوانات بودند در رندگان بودند و بودند در قسمت بالاترش انسانها بودند بلاخره این را نوح علیه سلات و بعض چیزای دیگری هم نوشتن تو تفسیرا که اونها را من یاد نمی کنم چون زیاد معلوم نیست صحت و عدم صحت اینها بیمار چی توسیه کرد اینکه این که بمار باقرب گفت که از اون طبع اصلیت یه وقتی اون را کنار بذار نمیدونم دونم نیش نزن فلان یا چیزای در درباره حیوانات قرآن همین اندازه گفته ما به همون اندازه که قرآن میگه ما هم بسنده میکنیم الله میفرمايت ولا تخاطبني في الذين ظلموا ومر سفارشنا نکن خطاب نکن درباره کسانی که ظلم کردند شرک کردند انهم مغرقون همانا اونها غرق میشوند در آینده اونا هم غرق میشوند نو علی سلام متوجه نبی منظورش منظور الله چه کسی هست و یسنع الفلک ای کانه یسنع الفلک نو داشت کشی را می مردم همیشه رد می شدند شنیده بودند که نو داره میگه که که سیلی غرار است بیاد توفانی بیاد همه مسخره میکردند، کردند قحقه می با خودشون می خندیدند می غلطیدند از بس که می خندیدند کسی که باور داشته نباشه خدا اینطور گمراهش میکنه. وَيَسْنَعُ الْفُلْكَ کِشْتی را داشت روش می کرد وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَقٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُ مِن هرگا می گزشت بر اون مرور می کرد بر اون ملئی از قومش یعنی اشرافزادگان از قومش رئیس رؤساء از قومش سخیر منه او را مزخر می کردند او را استحضا می بارش می قال ان اِن تَسْخَر نو در جواب گفت اگر شما مسخره میکنید ما را امروز فانا نسخر منکم فرد ای که ما شما را مسخره میکنیم کما تسخرون همان گونی که شما مسخره میکنید همان گونی که شما تمسخر میکنید بالاخره روزی ما هم می آید فسوف تعلمون ان قریب میدانید بعد از یک حین، بعد از یک زمان بعد از مدتی شما میدانید دانید من یعطیه عذاب یخزی چه کسی پیش او عذاب می که او را رسوامی کنه و یحل علیه عذاب مقیم و چه کسی بر او می آید عذاب همیشه کی و عذاب دائمی عذاب دائمی که از این دنیا از عذاب این دنیا منتقل می به عذاب برزخ و قبر و از عذاب برزخ و قبر منتقل می به عذاب جهنم این عذاب داهمی پیش کی می آید اللہ می فرماید حتی اذا جاء امرنا حتی وقتی که امر ما آمد یعنی وقتی عذاب آمد وفارت تنور تنور فوران زد تنور منظور از تنور چیه؟ همین تنوری که توش نان میپزند بیشتر مفسره میگه همین تنور مراد است این یکی از علائم عذاب بود ببین از هر جا امکان در یک چشمه فواره بزند تو کو تو جنگل تو بیابان اما تنور اینقدر احتمال ضعیفه چون اونجا آتش روشن شده حتی نمیش و نمیبینید هیچ نمی هم اونجا وجود نداره اون جایی که اصلا احتمال از آب نیست از اونجا آب فوار میزنه می بیرون لذا علامتی که برای قوم نوح گفته شده بود همینه تنور فوار میزنه اون که فوار میزنه بعد بارا شروع میشه رضا الله می فرمد وفار تنور و از تنور فوران میزند اون وقت که اون شروع کرد به ارز کنم که فوران و بیرون کردن آب دیگه کم کم شروع میشه شما شروع کنید سوار شدن را قل نحمل فيها من کل زوجین اثنين ما گفتیم حمل کن با خودت از هر, از هر نوعی زوجین جفت اثنین یعنی دوتا نرماده از هر نوعی از حیوانات از درندگان از خزندگان از چرندگان از همه و, و همچین اهلت را هم سوار کن کسانی که ایمان آوردن بی تو الا من سبق عليه القول مگر کسانی که از اهل در باره انها پیشی گرفت قول عذاب یعنی قبلا خدا فیصله کرده این باید عذاب بشه اشاره به اون فرزندش است. و همچین و من آمنه و من آمنه اتفسبر و اهلکا یعنی سوار کن اهلت را و من آمن عرب کسی که ایمان آورد. در تفاصیل نوشته الله عالم کسانی که ایمان آوردن از قومنو بین هفتات تا هشتات نفر بودن بعضی میگن هفتات تا زن بودند، هفتات تا مرد یا هشتات تا همین اندازه را گفتن و ما آمن معه الا قلیل الله میفرماید با او ایمان نی آورد مگر اندکی هشتات مرد و هشتات زن یا هفتات تا اللہ تعالی دستور داد بنا الله, الله اللہ سوار شو وقال ارکبو فیھا بسم اللہ مجریھا ومرساھا و که کہ سوار شی در آن بنا الله اللہ اللہ جاری کن هست بسم اللہ مجریھا بنا می اللہ جاری شدن آن هست این مصدر میمی هست و بنام الله توقف اون هست یعنی هر وقتی خدا بگه جاری میشه حرکت میکنه هر وقتی الله بگه توقف میکنه ان ربی لغفور الرحیم همانا رب من بخشاینده و مهربان است خیلی می بخشد و مهربانی میکند لذا الله می فرماید و هی تجری بهم فی موج آغاز شد او داشت جاری میشد در موج مثل موج که مثل کوه بودند یه هم نو فرزندش را دید ببینید اکثر مفسرین گفتن نو علی سلات و سلام فرزندش را خبر نداشت که مؤمن نیست این منافق بود این همه وقت پدرش را گول میزد، فریب میداد، با به ظاهر با پدر بود لذا نو تعجب کرد که این طالع کجا بوده بیا سوار شو اون گفت نه من سوار نمیشم، مقدرش علاقت بود گفت میرم سری کوب تا اونجا که آب نمی حَمم <تصفح> مسخره میکردم پدرش را اون من با شما سوار نمیشم و نادان نوح ابنه نه صداذت فرزندش را و كان في معزل ای بود ای بود صداذت یا بنیر کم معنا ای فرزند من سوار شو با ما و لا تكن مع الكافرین با کافران همراهی نکن با اونها با اونها نباش در عقیده در فکر با اونا نباش فرزند چی گفت قال ساو الی جبلی یعصمنی من الماء گفت من انقریب بالا میرم روی کوهی به که او مرا حفاظت میکنه از غرق الان انسان تصور میکنه که اگه سیل بیاد ما بریم سری کو هیچ که فکر نمیکنه اونقدر آب قال لا عاصم اليوم من امر الله الا امر رحيم نوال سلام السلام فرمود که نیس حفاظت کننده از عذاب الله از امر الله الا من رحم مگر کسی که الله بر کند رحم کند وحال بينهما الموج الله می فرماید حائل شد بین این بين بین پدر و فرزند موج حائل شد فکان من المغرقین از غرق شوندهگان شد غرق شد و قیل یا ارض بلعی خلاص این مرحله تمام شد قوم هلاك شد نابود شد دستور خدا صادر شد که ای زمین الان آبت را بمک آبت را تَهف و داخل فرو ببر و ای آسمان تو هم بس متوقف شو و قیل یا ارض بلعی گفته شد ای زمین ابلعی بلعی ماءک آبت را آب اطراف رو ببر و یا سماء و اقلعی ای آسمان باز بیا اقلعی ای عن بیشتر آب نریز و غیظ الماء کم کم آب کم شد و قضی الامر اون امری الله فیصل کرده بود اون امر فیصل شد و استوت حلال جودی و این کشتی بر جودی مستوی شد بر جودی استاد بر جودی کوه جودی هست بر کوه جودی الان این کوه جودی کجا الله اللہ و عالم گرچه مفسران گفتن که این کوه هست در موسیل عراق و بعضی گفتن این کوه در شام هست بعضی میگن در ترکیه هست البته در بائبل هست در انجیل هست که نوح بر کوه که در منطقه آرارات بود. کوه آرارات رشت کوه آرارات لابد اگر بخوایم تطبیق بدیم اون کوه آرارات اما از اون کوه اسم یک کوه جودی بود بر اون استاد اونجا الله تعالی فرمود که وستوت على الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین اونجا گفته شد حلاکت دوری از رحمت یعنی حلاکت و نابودی برای قوم ظالم قوم مشرک اینها اینا از رحمت خدا دور بوده که خدا را نفرمانی کردند اما برای نو هم تعجب بود همیشه این نکته را کردم ارز کردم از این نکته واقعا توحید به وجه ابلغ ثابت میشه که مختار عامه امور فقط و فقط اللہ است حتی انبیاء انبیاءی که برای اعلاء کلمت اللہ برای احیای دین خدا خیلی زحمت کشیدند، اونا هم نیست اونا نام اختیاری ندارند انسان میبیند بزرگترین انبیاء را حکمتش را هم نمیدوند بزرگترین انبیاء بہترین پیانبران خدا که برای دین خدا هر نو فداکاری دادند اما خیلی از افراد درجه یکیشون ایمان نیاوردن باوجود دکیم پیغمبران چقدر دوست داشتن اینا ایمان بیارند فرزند دنو پدر ابراهیم اموی محمد صلی اللہ علیه وسلم اونم اموی که تمام زندگی از او حمایت کرد از بچگی از هشت سالگی تا اینکه ازدواجش داد تا اینکه پیغمبر شد در مقابل تمام مردم استاد گفت کسی حق نداره به برادر زاده من تعرض مکنه ابو طالب اینقدر حمایت کرد رسول الله هم چقدر او را دوست داشت هم پدر رسول الله بود هم مادر رسول الله بود هم برادر و خواهر رسول الله و همه آره کار همو بود هیچ کسی را دیگه نداشت از همو بچگی بزرگیش کرده بود از همون بچه که چنان دوستش داشت هر کاروانی میره با خودش می برد بچه های خودش را اونقدر نگهداری نمی کرد که رسول الله را می کرد چه محبتی با رسول الله داشت ما همگای تاجو می کنیم حکمت کار خدا را ولی انسان نمی دونه همینقدر به ذهن میرسه الله می, می خواهد نشوم بده هرچی من بخوام همو میشه حتی انبیاء گاهی چیزی تمایول شخصی هست ابراهیم چقدر برای پدر خون جگر میخوره بعد میگه پدر من میرم ولی برای دعا میکنم و ما کان استغفار ابراهیم لأبیه الا عن موعدت وعدها ایا بالاخره ابراهیم خیلی دوست داشت نو خیلی خاص رسول الله خیلی ولی خدای عز و جل نخص. معلوم میشه که مختاری کل الله است. همه ی دانندگی هم الله است. امور را متصرف هم الله است. نو نواله سلام تهجیب کرده خدایا این چی شد؟ چرا فرزند دل بندم غرق شد؟ و نادا نوح ربه هو نداک نوح ربش را رب شراف فقال ربي قفت، اي رب من ان ابني من اهل فرزند من از اهل من است و ان وعدك الحق و أهل وعدتهم حق است تو فرمود و اهلك خدا چه فرمود اهلك اهلت را سور کن حق است و احكم الحاكمين من بشتر نمیدانم فقط اعتراف میکنم بہترین داور بہترین فیصل في کنم دتو جواب رباني قال يا نوح انه ليس من اهلك الله فرمود اي نوح اين اهل تونس اهل تو اون است که مثل تو باشد يعني یعنی مؤمن باشد در درون این ایمان نیست انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح من میدانم چون عالم الغیب من هم بیا علم غیب نداشتند انبیا به ظاهر نگاه میکردند من میدانم تو نمیدانی انه عمل غیر صالح همانا عمل این عمل صالحی نیست غیر صالح فلا تسالنی ما ليس لك به علم انو از من نخا آن چیزی که نسبت به اون علم نداری نمی لذا من رب ترا میکنم کنم ترا نصیحت می کنم اینی اعیدوکا ان تکون من الجاهلین من ترا معظمی کنم که از جاہلان نباشی لذا قانع شو تسلیم شو فورا تسلیم شد پیغمبر است تربیت یافته خود الله است او را خود خدا تربیت کرده همه انبیاء مربیشون معلمشون اللہ عزوجل هست هیچ پیغمبری به هیچ مکتبی نرفته درس نخونده دانش نیا مخته. اللہ تعالی مستقیمن اونها را درس داده و دانش آموخته لذا پیغمبر وقتی که همین که خدا تذکر میده فورا توبه میکنه رجوع میکنه قال رب انی اعوذ بک بار اله من فنا می برمتو ان اسالک ما لیس لی به علم ان کما سوال کنم در آینده آن چیزی که من نسبت به اون علم ندارم چیزی که نمیدونم دیگه هیچی نمیگم هیچ اظهار نظر نمی کنم و همین که گفتم همین که سفارش کردم اشتباه کردم منو ببخش معذرت میخوام به تعبیر ما این میشه و ایلا تغفر لی و اگر مرا نبخشی و اگر بر من رحم نکنی اکم من الخاسرین من از زیانکارا میشم و آغا میکنم نابود میشم مرا ببخش من اشتباه کردم الله تعالی دستور داد پس اینو الان برو سلامتی روی زمین و بعد از اون ادامه بدید زندگی عادی خودتون رو همراه با عبادت خدا قیل یا نوح گفته شد اینو نو اهبت به سلام مننا فرود بیا اپین بیا با سلامتی از جانب ما و برکاتی نالیک و همچنین برکاتی بر تو و علاوہ امامین مم و هم بر گروهایی که با تو باشند یعنی تمام جماعت هایی که مؤمن باشند بر همه سلام خدا باد از سوی خدا سلامتی باد و امامون سنو و در آینده هم جماعت های دیگری خواهند آمد که ما به آنها هم انقریب متا میدیم بحر زندگی میدیم استفاده کردن میدیم اما انهایی که تمرد بکنن سرکشی بکنن مثل همین قوم تو ثم یمسهم مننا عذاب علیم سپس به انها ما می چشانیم می رسانیم عذاب دردناک از جانب خودمون هر کسی که از نعمت خدا سوء استفاده کند بعد از اینکه داستان نوح به پایان رسید داستان حود شروع میشه، داستان صالح شروع میشه، اونا ادامه داره اما در وسط یک جمله معترضه که این جمله معترضه دلالت میکند بر صداقت رسول الله او این هست که ببینی ای محمد صلی اللہ علیه وسلم این اخبار گزشتگان را چند هزار سال پیش بوده۔ با این جزئیات با این گفتگوی دو نفره بین پدر و پسر پدر چی گفت پسر چی گفت بعد نو به خدا چی گفت اینا رو تو از کجا خبر داری تو که به مکتب نرفتی تو که تاریخ نخواندی، تو که کتابی باز نکردی پس این همه جزئیات را دقیق درست صحیح می این دلیل است که وحی خدا بر تو می تو با عالم واحد سرکارداری با عالم بالا سرکارداری یعنی این از دلائل نبوت تو هست تو پیغمبر خدا هستی تلک من انباء الغیب انها از اخبار غیب هستند نوحیها ایک الیک ما واحميكم ان ربي ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا ان هر ائمه طالب را نت اي محمد صلى الله عليه وسلم ونقومته امته اصحابته دلیل هستند که تو پیغمبری واقعند، اثبات شد پیغمبر. باوجود که اثبات شد، ابو جال و ابو لحیمان نیاوردند، عتبه و شیبا و میه و والی دیمان آوردن پیغمبر. خیلی ناراحت می شد. الله می‌فرماید فصبر صبر کن، شکی باباش تحمل کن. بلکه عاقبت و انجام نیک مال شماست. ان العاقبت للمتقین عاقبت یعنی العاقبت المحموده تفسیر جلاله گفته. عاقبت زیبا عاقبت خوب انجام نیک مال اهل تقویس مال کسانی که یتقون الشرک والکفر والمعاصی منعی که شرک و کفر همه معاصی دوری می کنند دونه عاقبت مال اونها شما سب کنید انجام که کار و بنفع شماس بخیر شماست الله تعالی شما فتح و زفر انعیت می فرماید.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 يُرسل السَّمَاءَ عليكم مِدراراً ويزدكم ويزدكم قُوَّةً إلى قُوَّتِكم، ولا تَتَوَلُوا مُجْرِمينَ. <تصفيق> قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيْنَتِهِ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ و ما نحن ب تاركي عن قولك و ما نحن لك بمؤمنين در ادامه دلائل نقلی از انبیاء گذشته و از پیامبران سابق بعد از اینکه دلیل نقلی از سیدنا نوح علیه صلاة و السلام و تبلیغ نوح قوم شرخان دیم این دلیل نقلی از پیانبر الله حضرت هود علیه صلاة و السلام حضرت هود مبعوض شد بسوی قوم خودش قوم عاد گرچه این داستان حضرت هود و قوم عاد را قبلا هم خاندیم در سوره اعراف هم گذشت و در سوره های گذشته هم به صورت اجمال گذشته این قوم تقریبا 2000 سال قبل از میلاد میلاد سیدن عیسی علیه سلات و دو سال قبل از میلاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام این قوم بوده و این قوم از نسل سامیین هست عرب سامیین و اینها را میگن عرب باعده یعنی از اون عرب که حلاق شدند اینها اصالتاً عرب بودند و باشندگان شمال حضرموتی یمن بودند در رگستانی به نام احقاف اونجا زندگی میکردند. این قوم بطپرست بود و مثل خیلی دیگر از بطپرست ها سنگ پرست و چوب پرست بودند و قومی بود که الله تعالی توانایی های ظاهری زیادی به اینها داده بود بسیار قوی نیرومند قرآن مجید چندین جا از قوت انها و از نیرو و قدرت جسمی انها تعریف می کند اللہ تعالی پیانبر از حضرت حود را بسوی انها برگوزید و اون پیامبر انها را بسوی توحید سوی یک تاپرستی عتی رابطه از غیر الله از نظر عبادت دعوت ذات چنانچی می فرماید و الى اخاهم هودا بسوی عاد برادرشون هود را ما فرستادیم دعوت هود هم همین بود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ای قوم فقط الله را عبادت کنید چون برای شما غیر از الله الاله دیگری که يستحق العباده مستحق عبادت باشد ارزش عبادت را داشته باشد وجود ندارد ان انتم الا مفترون شما با این خرافاتی که دارید نیستی شما مگر افترا کننده یعنی در عقیده شرکیه چی شما دارید از خود افترا کردید از خود درست کردید خدا تعالی چین چیزی نگفته و خدا تعالی این, مب... این نازل نکرده و بعد دفع شبه هم می کند این پیامبر که یه وقتی شما فکر نکنید من این دعوت را که عنوان کردم از شما منفعت مد نظر دارم منفعت مادی یا بخوام که پادشاه بش شما بشم رئیس شما بشم از این طریق برای خودم من ارتزاق بکنم این را قبلا هم گفتم معلوم میشه که کسانی که در مسیر دعوت هستند، در مسیر خیرخواهی مردم هستند. لذا نباید از این طریق ارتضاق بکنند، از همین طریق دعوت و از طریق تبلیغ دین بخواهند که کسب بکنند و درآمد داشته باشند. سرعتاً پیامبران را خداوند دستور میده که شما اعلام کنید که من در مقابل آنچه که شما را فرامیخانم خیرخواهی میکنم. هیچ منفعت مادی را در نظر ندارم لذا لا یاقو می لا اسالکم علیه بر این تبلیغ هیچ اجری از شما نمیخواهم این اجری الا علی الذی فطرنی اجری من و پاداش من نیست مگر بر اون ذاتی که مرا خلق کرده و مرا فرستاده بر او هست افلا تعقلون شما آیا عقل ندارید درک ندارید فهم ندارید که من به چه هدف پیش شما آمدم؟ لذا شما یعنی درک کنید و هدف را تشخیص بدید اگر من هیچ منفعتی وقتی که ندارم و شما را تبلیغ میکنم قطعا من یه چیزی میدونم و میخوام که نجاتتون بدم و چه اصولی را در نظر داشتند حضرت هود علیه و السلام اصل اول اینه که اونها را تلقین میکنه به استغفار تابحال هرچی که شما شرک کردید غیر الله را پرستیدید و خداوند از را ناراضی کردید از این استغفار کنید و یا قوم استغفروا ربکم ای قوم از ربتون مغفرت بطلبید، از ربتون بخشش بطلبید. یعنی استغفروا ربکم من الشرک بخاطر همون شرکی که شما کردید از خداوند اززا مغفرت بطلبید. ثم توبو این اصل دوم هست سپس به سوی خدای تعالی رجوع کنید برگردید یعنی از خدای از و شما اینجا تلقین توبه می کند از خدا معذرت خواهی بکنید و رجوع کنید معنیش اینه که دیگه اون کارها را نکنید عبادت خدا را فقط انجام بدید قبلا هم ارز کردم که است برای استغفار تنها استغفر الله گفتن و بعد زبان ورد کردن کفایت نمیکنه بلکه توبه در کار هست اینکه خداوند بعد از اون رحمت های خودش را متوجه بندهش میکنه در صورتی که بنده توبه صادقانه و رجوع صادقانه داشته باشه نه اینکه تسبیح بگیرد و روزی صد بار استغفار بخواند هزار بار استغفار بخواند ولی در درونش گناه باشد عشق گناه باشد و از کنم علاقه به گناه باشد و عملا دست از گناه نکشد دست از اشتباهات خودش نکشد فقط استغفار بکند این کفایت نمی کنه فمتوب ایلی سپس بسوی خدای تعالی شما رجوع کنید فایده این چی خواهد بود یرسیل السما علیکم مدرارا اللہ تعالی می فرستد آسمان را بر شما مدرارا یعنی پیا پید خیلی باران میاد پشت سری هم خدا آب میده باران میده و چنین این توبه فائده این خواهد بود که ویزید کم قوتا الى قوتی کم خداوند در شما می افضاد از نظر قوت قوتی که قبلا دارید و نیرویی که از قبل دارید خدای تعالی دیگه در نیروی شما می افزاید و لا مجرمین شما از عقیده ایمان توحید مجرم خارج نشید مجرم پشت ندید و اعراض نکنید به صورت جرم اما قوم ببین چی گفتن قالو یهود و ما جئتنا ببینت گفتن ایهود تو برای ما هیچ دلیلی نیاوردید پر انبیاء هیچی که بدون دلیل و بدون مدرک صحبت نکردند، از نظر کلام و از نظر نطق انبیاء چنان دلائل داشتند، چنان استدلال داشتند که قوم جواب نداشته اما اون چیزی که اونها میخواهند اون مجز که مد نظر اونها هست میخواهند. قالوا یاودوماج تنها به بیانات ایهود برای ما هیچ بیانی یعنی دلیلی که بر نبوت تو باشد دلیلی که ما را غانی کند وجود ندارد و ما نحن بتاریکی الهتنا عن قولك و ما نیستیم ترک کنن دیه خدایانمون یعنی به سبب قولت عن عن سببیاست یعنی به سبب قول تو که تمیم ما ترک نمیکنیم و ما نحن لکه به مؤمنین ما نیستیم نسبت به تو ایمان بیاریم و که بی به تو ایمان بیاریم با باور کنیم حرف تو را نمی کنیم. ان نقولو الا تراک بعض الهتنا بسو. او هدلی صلاۃ و سلام گفت که شما عقل دارید، خرد دارید ببین من نه پول میگم نه میخوام. دارم شما را راهنمایی می کنم بفهمید دیگه. اینا میگن که در جوابش گفتن ان نقول الا تراک بعض الهتنا بسو. ما نمیگویم مگر بعضی از خدایان یعنی ما از آلیه ما به شما سو رسنده سو یعنی آفات، یعنی مصیبت یعنی جنون اعتراک یعنی اصابکا یعنی یکی از این خدایان یعنی ما سبب شده که به شما ضربه زده ضربه سوی ای زده که در روان شما اختلال ایجاد کرده شما را دیوانه کرده منظور اینه در روان شما اختلال ایجاد کرده و شما را دیوانه کرده شما را جنون در وجود شما آورده به این خاطر شما این حرفار داری میگیید الا اعتراک اعتراک ای, ای, ای اصابکا اصابه که بعض آلیهتنا بسو یعنی بجنون و خبل تفسیر مدارک میگه که بعضی از خدایان ما به تو رسندند جنون رساندند دیوانیت کردند قال انی اشهد الله وقتی که قوم چنان زد و اناد کردند پیانبر خدا خدا را گواه گرفت ان اشهد الله واشهد من خدا را گواه می گیرم و شما قوم هم گواه باشید که ان بریئ من ما از اون چیزی که شما با خدا شریک می گیرید و شریک سازید من بیزارم من بری هستم یعنی من قبولشان ندارم مم ما تشركون من دونه اون که شما شریک میگیری غیر از خدا لذا شما که منو تحدید میکنید فکیدونی دونی جمیعا همگی بر علیه من تدبیر کنید در بر علیه من اتعه کنید جمیعا یعنی آبد و معبود خدایان و بندگانشون همه سملا سم تنظرون منو مهلت ندید چون اونا میگفتند آلیه زدن و آلیه هم میزنند. گفت که شما عابد و معبود خدا و بنده اون خدایتون یعنی خدای باطل منظور است اله باطل منو مهلت ندید هر کار میکنید کیدی مکری توتی دری بکنید اینی توکلتو علی الله ربی و ربکم همانا من توکل کردم بر الله ان اللهی که رب من و رب شماست چرا؟ چونکه ما من دابت الا هوا آخذم بناصیتها هیچ موجود زنده ای نیست هیچ داب بی نیست مگر اللہ گرفت پیشانیش را یعنی خیر و شرش به دست خداست آخذم بناصیتها یسرفوها کیف یشا ویم نواها اما یشا موحای پیشانیش به دست خداست یعنی خدا هر کاری میکند. ان ربی على صراط مستقیم همان رب من بر صراط مستقیم است هر بنده ای را که به سمت خودش بکشد موهای پیشانی سیرت می کشد بر صراط مستقیم فانت فا ولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت بهی الیکم اگر شما برگشتید شما پشت دادید من آخرین اتمامی حجت هم میکنم، فقط ابلغت تو هم من رساندم بشما به إليكم من فرص فرص شما، ما اورسلت بهی ایلیکم، آنچه که من فرستاده شدم به آن بسیار شما. وی استخلف ربی قوم غیرکم، و رب من خلیفه و جانشین میگردد ن غیر از شماره. یعنی خداوند کسانی غیر از را یار جانشین میگردن شمار را نابود می‌کند ولا تضرونه شیئا با شرک خودتان با کفر خودتان به خدا ضرر نمی‌رسانید هیچ چیزی ان ربی علی کل شیء حفیظ چون رب من هر چیزی را تحت نظر دارد حفیظ محافظ و نگهبان است بر هر چی هر چیزی تحت نظر پروردگار است خب بالاخره حضرت حود علیه صلات والسلام السلام وقتی که تبلیغ کرد و تبلیغ سود بی نداد حضرت حود علیه صلات و وقت عذاب را از عذاب انها را بیم داد و وقت عذاب فرا رسید وقت عذاب فرا رسید اللہ تعالی می فرماید جا ما امرنا نجینا حودا وقتی که امر ما آمد عمر کدوم امر امر عذاب ما نجات دادیم حود را والذين امنوا معه که ایمان آوردند همراه باهود به رحمت این سبب حقیقی نجاتشون هست رحمت ما شامل حالشون شد به به سبب رحمتی از جانب ما و نجات دادیم آنها از عذاب غلیظ و را نجات دادیم از عذاب سخت عذاب سخت را شما قبلا خاندید که خدا تعالی توفانی را بر اونها مسلط کرد بعدی را چنان بعدی که یک ساعت و دو ساعت نوزید یک شب و دو شب نوزید بلکه این بعد بر اونها وزید سمانیت ایام سبع علیال و ثمانیت ایام حصومه. هفت شب و هشت روز پیاپی چنان بعدی بود که اینها قدشون ارز کردم به اندازه نخل خورما بود خیلی قد بلند بودند این بعد وقتی که میوزید اینها را بر می میبرد به آسمان و میزد به زمین وقتی که شما بعد شدید باشد میبینید این تیر برگه ها را که اونقدر بزرگ هستند چطور مندازد این نخلهای خورمارا چطور مندازد طوفان خیلی شدید باشد اینها را مندازد اینها را این قوم را و احاد و افراد این قوم را مثل همون نخل خورما مثل تنه درخت خورما که قرآن همین گفته که انهم اعجاز و نخل منقعر که اعجاز و نخل خاویا این نخلی که از بیخ و بند برکنده باشد اینها را خدا برمی داشت با این طوفان می برد به آسمان می زد به زمین اینها لهمی شدند و آخر بغیر از اینکه جسدهای اونها انباشته باشند یه چیزی نبود عذاب غلیز این بود و الله تعالی می فرما و تلک عاد جحدو بی ربهم این هست قوم عاد و این هست عاد که انکار کردند آیات ربشان را احکام و دلائل که از سوی پروردگار بود و رسله رسلهو و تمام رسولش را، پیامبرانش را نافرمانی کردن، عسیان کردن، و اتبعو امر کل جب، جبار عنید، اینا پیروی کردن، دنبال کردن، امر هر سرکش معاند را، هر انسان سرکش و اهل عناد، یعنی کسی که اهل عناد بود در مقابل پیامبر، سرکشی می کرد در مقابل پیامبر و خدا، و بسوی شرک دعوت میداد سرکشی همین بود الله تعالی می فرماید که امر او را فرمان بردند امر پیانبرنا فرمانی کردند و اتبعو فی دنیا الدنیا لعنتا و یوم القیامة تنها عذاب به این بسند نشد به این اکتفا نشد بلکه انها دنبال شدند یعنی خداوند من انها را تعقیب کرد با عذاب دنبال شدن در همین دنیا هم لعنت لعنت یعنی دوری از رحمت هیچ رحمتی شامل حال آنها نشد هیچ ترحمی از سوی پروردگار برای آنها نشد و تنها در این دنیا هم نسو يوم القیامه هم هم چینی هستند در روز قیامت هنها از رحمت خدا بی دور خواهند بود از رحمت خدا که بی دور باشه دیگه بختی ابدی هست همیشگی هست الا ان عادا کفروا ربهم آگاه باشید مردم عاد کفر کردن به بر ربشان به توحید ربونها کفر کردن على بعد لعاد قوم هود و نتیجه این کفر و نتیجه این فاصله و دوری چی بود دوری از رحمت خدا على بعد لعاد خبر دار دوری برای عاد کدوم عاد؟ چون دوتا عاد داریم یعنی قوم هود چون عاد اولا اینها هستند همین قوم عاد عاد علی السلام هستند آد ثانیه قوم سمود هستند که الان آ داستانش شروع میشه عادن الاولا ارمذات ارم ذات العماد اینها هستند لذا از رحمت خدا هم در دنیا محروم شدند به سبب شرک شرک چقدر نهوست داره چقدر بدبختی داره و هم در آخرت محروم خواهند ماند بله، این واقعی قوم عاد بود که الله عزوجل اونها را نابود کرد بعد از این واقعی قوم سمود را به همون ترتیب تاریخیشون الله تعالی اینجا هم بیان فرموده. اونها را ما این داستان را قبلا خواندیم اینجا بیشتر به بی ترجمه بسنده میکنیم، اما در اینجا نسبت به آیات دیگر تفصیل بیشتری در رابطه با عذابشون وجود داره که در ترجمه مشخص میشه این قوم قوم سمود هست قوم سمود هم همونطور که عرض کردم قوم عاد از عرب سامیین بودند قوم سمود هم از عرب سامیین هستن اصالت این هم عرب هستن عربی اصل هستن و عرب بائده یعنی حالکه از اون عرب هایی که نسلشون از بین رفت حالات شدن اینها هستند هستن اصلش اینه که وقتی که قوم آد را خدا کرد شما خاندی نجینا هودا والذین آمنوا معه ما حود را نجات دادیم اینها در شمال حضرموت زندگی میکردند. حضرموتی یمن در اون ریگستان در احقاف بعدن از اونجا حضرت حود علیه سلاط با منبقایی اینها آمدند آمدند در منطقه دیگه سکنا گزیدند اختیار کردن زندگی را منطقه که حجر گفته میشه حجر گرچه معناش به معنی من هست به معنی حفاظ هست شاید اینها در کوههای زندگی میکردند که این کوها به ظاهر اینها را از هر مصیبتی حفاظت میکرد یعنی نه اونجا خطر زلزله بود نه خطر سیل بود نه خطر از بین رفتن خانهایشون چون اینها در دل کوه برای خودشون خانه درست کرده بودند اینها قوم عاد هستند اما عاد سانیا. این قوم سمود همین بقایای قوم عاد هستند که نجات یافتند بعد آمدند در جای دیگه به عبادت خدا مشغول شدند به توحید با پیغمبرشون پیغمبر بالاخره وفات کرد و نسلی که نسل پیغمبر بود مؤمنین بودند اون هم وفات کردند نسل‌های بعدی که آمدند الله بهتر میدوند که چقدر طول کشید چقدر طول کشید چون درباره تاریخ اینها کسی نمیداند که اینها در چه تاریخی بودند فقط میگویند که خیلی قبل از سیدنا ابراهیم علیه و والسلام بودند اینها قبل از اینکه ابراهیم از عراق تشریف بیاره به شام اینها خیلی قبل از اون بودند و اینها در منطقه که در منطقه حجر گفته میشه این حجر را میگویند که بین شام و بین حجاز بین شام و بین حجاز بین کنم بلاد اصلی عرب در اون منطقه بودن اینها و اینجا بالاخره زندگی کردن تا اینکه کم کم شرک دوباره در اینها آمد این نکته من خدمت شما ارز کنم که این نکته را علما از همین آیات برداشت کردن نکته جالبی هست ای هست که برای من و شما واقعا قابل توجه هست اون نکته اینه که ببینید بعد از اینکه که توفان نوح علیه السلام آمد هرچی که کفر و شرک و اهل کفر و اهل شرک بودن همه به وسیله طوفان نابود شدن بعد از اون آیا مشرکی باقی مند باقی نماند آیا کافری هیچ کافری نماند همه کفر و اهل کفر حلاق شدن نابود شدن اما چی شد که دیری نگذشت دوباره شرک آمد این شرک از کجا آمد این محل تعمق است محل تدبر است و بعد از که دوباره حضرت حود تبلیغ کرد و نپذیرفتن دوباره خدا حلاک کرد آورد نابودی آورد اینا از بین رفتند حلاک شدند و اهل توحید و اهل ایمانی که با حضرت حود باقی مندند آمدند در هجر زندگی کردند را اختیار کردند خب این هم سالهای گذشت الان معلوم نیست چند سال گذشت ست سال دویس سال ، سال دوباره شرکت از کجا آمد در میان همین قوم شرک آمد در میان همین قوم کفر آمد علت اصلی اینه که وقتی که پیامبران وفات کردند، حضرت نوح وفات کرد، بعد از اون در میان قوم مبالغی نبود. مثل امت ما نیست که بالاخره بقیه جانشینان و بقیه اولمای این نهضت را ادامه بدند، تبلیغ بکنند، امر به معروف بکنند، نهی از منکر بکنند. امر به معروف و نهی از منکر نبود. دوباره که فساد آمد دوباره که شرک آمد خود بخود از ترک به معروف و نایز منکر میاد بعد از اون مثلا کسی را شیطان فریب میده تو خواب تو بیداری خلاصه یک خرافی را شروع میکنه کار خلافی را شروع میکنه خب کسی نیست که بگه نکنیم بعد بعد اون کم کم ترویج میده رونق میده ادامه میده تا کم کم بلاخره دو نفر و سی نفر و دو خانواده سو اینطور دوباره شرک همه قوم را میگیره پس خود خود شرک که آمد کفر آمد دلیل چی؟ به دلیل ترک امر به معروف و نعیز من کرد حالا شما یک جامعه داشته باش اصلا یک شهری داشته باش که این شهر شما این آبادی شما صد در صد اهل ایمان و اهل سلاح باشند همه نماز می خونند، همه خدا را عبادت می کنند، همه طاعت و بندگی دارند این قوم و این شهر به این حال نمی ماند اگر امر به معروف و نهی از منکر نباشد اگر امر به معروف و نهی از منکر باشد بلاخره صلاح صلاح می ماند اگر نباشد زود فساد و را می گیرد پس علت اصلیه این که شرک دوباره زود برمی میگشت، کفر دوباره زود برمی میگشت، این بود که کسی نبود امرو به معروف نیازمون کر بکنه از دوباره برمیگشت گشت تا که خداوند دوباره پیامبری را مبعوض میکردند. پس این علت بود حالا هر قومی را ما می میگیم اینا بقایای همون قومی گذاشته بودند خب یعنی چی بقایای اونها اونها که مؤمن بودند چرا این مشرک بودند دلیلش اینه نسلهای بعدی آمدند شیطان در اونها نفوذ کرد در اونها اثر کرد از جای دیگه کسی کسینای در میان خودشون شرک را دوباره شروع کرد. لذا الله می فرماید و ال سمود اخاهم صالحا بسوی السمود برادرشان صالح را ما فرستادیم. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ای قوم فقط الله را عبادت کنید به دلیل اینکه ما من اله غیرو برای شما هیچ معبودی به از الله نیست. دلیلش چیه ترغیب هو انشأکم من الارض الله آن ذاتی هست شمارا از همین زمین آفرید ایجاد کرد از زمین و استعمرکم فيها و شمارا در همین زمین آباد کرد شمارا, شمارا حیات و آبادی در همین زمین داد فستق فروهو پس اورا به خاطر این همه شرکو نفرمانی از او استغفار بطلبید سمت طوبو ایهی سپس برگردید از کردم هر جا فقط استغفار خانن کفایت نمیکنه توبه در کار است رجوع ایلا الله به این معنا که دوباره اون کار را ما نکنیم اگر ما میخوایم که استغفار ما استغفاری باشد که یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم بی و بنین که این استغفار ما برای ما چه پیامتی داشته باشد برکات زمینی و آسمانی خیر از سوی پروردگار داشته باشد سمتوب و علیج شرطه باید از همه معاصی و جنایتها دست بکشی اینجا الله می میفرمید ثم بو الی این نوبی قریب و مجیب همانا رب من هم نزدیک هست به هر بندی قریب هست برای طائب و اجابت کننده هست ببین این ربی قریب و مجیب می توانی بگیم با این جمله با این جمله این ربی قریب و مجیب تمام استدلالات اهل خرافات در گذشته و در حال همه از بین میره چون اهل خرافات میگویند که ما کجا و خدا کجا خداوند در یک جایگاه بسیار عالی و متعالی است و ما بنده پر از تقصیر گنا گناه هستیم لذا ما هنوز به اون جایگاه نرسیم که ما خدا را صدا بزنیم ما از خدا معذرت خواهی بکنیم اصلاً خدا به طرف ما توجه میکنه مثل همین پادشاهان که یک انسانی وقتی در سطح پایین باشد این انسان پایین هرگز نمیتونه با رئیس جمهور با اون پادشاه مستقیم ارتباط برقرار بکنه این اگر مشکلی دارد با یک مسئول سطح پایین با یک اداره با یک کارمند با یک رئیس اداره اون رئیس اداره پیش مدیرش مدیرش پیش وزیرش وزیر پیش اون پادشاه رئیس جمهور در کابینه مطرح بکنه لذا چند واسطه میخواد تمام به پادشاه برسیم اینا همین میگن این مثال میذکر می، ذکر میکنن عوام هم این مثال می پسندن راست کجا خدا, خدا و کجا دهن پر گناه ما اما اللہ می فرما ان ربی قریب و مجیب شما مستقیم معذرت خواهی بکنید مستقیم توبه بکنید لازم به واسطه نیست لازم به این وسیله و وسیله نیست رب من نزدیک شماست و اجابت کننده هست. بالاخره وقتی که صالح این را می گفت این یعنی ترک تمام غیر الله این یعنی نفع شرک انها به صالح علیہ سلام گفتند ای صالح ما این توقع از تو نداشتیم که تو بیائی مقدسات مارا توحیم بکنی خدا ما یعنی مارا قالو یا صالح قد کنت فینا مرجوون قبل هذا ای صالح همانا تو در میان ما مرجوف بودی یعنی مرد امید بودی تو امیدوار بودیم که در آینده تو یک شخصیتی میشی. معلوم میشه که انبیا قبل از نبوت خودشون با وقارترین انسان ها هستند با شخصیت ترین انسان ها هستند قبل از نبوت هم معصومند چنان شخصیتی داشت که اینها میگه ما امید به تو داشتیم که آینده خیلی خوبی خواهی داشت در آینده سردار میشی در آینده در رأس همه قرار میگیری چنان با وقار بودی چنان با شخصیت بودی قبل قبل از این دعوتت الان تو از چی داری ما من میکنی متوجه هستی تو داری دست به سوی خدایان ما بلند کردی اتنهانا ان نعبد ما یعبدو آبا او نا تو آمدی ما باز میداری از اینکه ما عبادت کنیم اون چی که خدایان ما عبادت میکردند و وَإِنَّنَا لَفِي مما مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيب همانا ما در شک هستیم از اون چی که تمارا فرامی خانی بسوی او مریب هم به معنی شک هست اما وقتی که اونجا شک آمد اینجا به معنی سرگردان انسان که خیلی مشکوک باشه اخیره هیچ نمیدونه این راه برم اون راه برم ما سرگردان می تو چی داری میگی اما معزی صالح علیہ السلام قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينات من ربي اي قوم من بمن خبر بدهيد اگر من باشم بربيني بردل بردليل واضحي چنام بيني واضحي كي از جانب رب من باشد و علا و از مبینه و اون آیه و اتانی منه رحمتا و رب الزانب خودش به من رحمت بده به من نبوت بده ای قوم اگر وضیعت من این باشه فمن ینصرونی من الله، انعصیتو چه کسی مرا یاری میکند از عذاب خدا اگر من او را نافرمانی کنم شما میگی من با شما همه و هم زبان باشم یعنی نافرمان خدا باشم خب خدا که عذاب بیاره کی منو را نزاد میده کی منو یاری میکنه فما تزیدوننی غیر تخصیر ای قوم من شما در من ن. نمی افزاید اضافه نمی کنید غیر از خساره یعنی با این مشوره که می که من دست بکشم از دعوتم دست بکشم از توحید غیر از که من می خواهید دوچار خسار را زیان کنید چیکار می خواهید بکنید اونها دلیل خواستن دلیل هم آورد دلیل چی بود همون که از کوه و از دل کوه شطوری را که آبستن هم بود بیرو ناورد بیائید شما موجزه می خواهد اینم موجزه و یا قوم ها ناق الله ای قوم من این ناقه الهی هست که شطوری که از جانبه اللہ لکم آیتا برای شما یک آیه و نشانی هست اونا شطور خواستا شطور نشانی بود اما شطور باعث مزاحمت اونها بود باعث مزاحمت مواشی اونها بود اونها حیواناتشون از شطور بد جور وحشت داشتند در هر مرتی که شطور میرفت اونها نمیچریدند در هر آبسری که شطور میرفت اونها رم میکردند وحشت میکردند فرار میکردند لذا حضرت صالح گفت خب اینه بذارید که بچرت بخورد آب استفاده بکند ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله بگزار در زمین خدا بخورد ولا تمسوها و دست نزنيد ان را ببد يعني ان را از بین نبرید اگر این کار را کردید اندی به شعائر الله تعرض کردن اون وقت وقت نابودی شماست عذاب, شماست. عذاب قریب شما را میگیرد عذابی که قریب دور نخواهد بود بلاخره اینها کارشون را کردند شطور را از بین بردند نابودش کردند خدای تعالی هم گفت الان که این کار را کردی تا سی روز عذابتون میاد تا روز آلما اینا اینقدر بدبخت بودن که همینه باور نکردند تا سی روز این گفتند که پس صالح داره ما رو میکنه اونها در اینجا نیست در آیات دیگه هست که گفتم بعد از اینکه شطور را کشتند گفتم الان خودت صالح را میکشیم چند نفر لاتو او باش رو کردند نو نفر قرآن میگه و کانه فیلم تسعه رحت یفسدون فی الارض ولا یصلحون اهل فساد بودند اهل صلاح و اصلاح نبودند انها را جمع کردند اینها با همدیگه احمد سوگند نام امضا کردند سوگند خوردند نه نفر از نه تیره و قبیله قالوا تقاسموا بالله به همدیگه بامدیگه قسم میخوریم که لنقولن قالو تقاسمو بالله لنبیتنه و اهله ما به وقت شب به حمله می کنیم شبیخون می زنیم و اهرش سم لنقولن لولیه بعدا بغیه فامیلش اگر قومش ناراحت شد چرا ساله را, سال را کشتید قسم میخوریم که ما شهیدنا محلک اهلی ما خبر نداریم از حلاکتش لذا میکشیم و بعد این کار میکنیم گفتند که این میخواد ما را تهدید میکنه ما را از, از بین ببری قبل از اون خودش را بکشیم این سوگند را یاد کردند و داشتند آماده می شدند که به حضرت صالح حمله بکنند خدا عذاب را آورد دیگه این شب سوم بود لذا الله می فرماید فعقروها اور از پای در نابود کردن شطر را فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ایام اعلام عذاب سین صالح علیه و سلام الصلات گفت پس تمتعو بهره بگیرید زندگی کنید در خانهایتون سه روز سه بیشتر نیست ذلک وعد غیر مکذوب وعدی هست وعده دروغی نیست راست واقیت واقعیت بعد از 3 خلاص عذاب آمد فلما جاء امرنا نجينا صالحا زمانی که امر ما آمد امر عذاب ما نجا دادم صالحرا والذين آمنوا معه برحمه منا انني كي ايمان آورده بودم با صالح اما الا تسليب برحمه منا رحمتي الزاني بما شامل حال انها شود ومن خزي يوم اذ وازر سويه وبدبختي اون روز ما اونها نجات دادم ان ربك هو القوي العزيز بدون شک رب تو قوی هست هم قوی هست و هم غالب هست اما بغیر چطور عذاب داد خدا وَأَخَذَ الذين ظلموا الصَّيْحَةَ فاصبحوا في ديارهم جَاثِمِينَ اینجا صیحه هست در جای دیگه رجفه و زلزله هست ارس کردم قبلا خدمت شما هر دوتا به بمعنی فریاد این فریاد میگه نعره جبرائیل بود. جبرائیل فقط یک سدای برآورد که این سدای همه اونها را سکته داد وحشت جگرهاشون پاری شد. و آخراللذین ظلم الصیحه آنهايی که ظلم کرده بودن آنها را صیحه و نعره جبرائیل گرفت فاصبحوا في دیارهم دیاریم جاثمین. اونها بعضی میگن صحیحه بعضی میگویند که از آسمان برق آمد خب بعید نیست که همه آمدند یعنی از یک طرف صدایی بود و همراه با صدا همرا با همین برقی هم آمد فاسبهو فی دیاری هم جاسیمین در خانه هایشون به دهان و به زانو افتادند جاسیمین اصل سرنگون شدرم میگن کسی که به سر و به سینه دهان افتاده باشد که آللم یغنو گویا آنها نبودند در این زمین، یعنی گویا اصلاً آنها اهل زمین نبودند، سکونت نداشتند، نفعی از زندگی در این زمین نبودند. Alla ان نثمود کفر ربهم آجاه باش بخاطب همان سمود و قوم سمود کف کردن نسبت به ربشان Alla بعدا لثمود آگاه باش که دوری هست برای قوم سمود از رحمت خدا پس اینگونه خدا تعالی هلاك کرد و نابود کرد اونهایی که عبا کردند از عبادت خدا از توحید از یکتاپرستی این منیسوم بود این داستان سوم بود که دلیلی برای اثبات حقیقت و راه حقیقت است حیانبری هست حقیقت و دعوت میده به یک تا پرستی و توحید و در مقابلش قومی هستن نافرمان ناسپاس هست. اونها قبول نمی کنن به عذاب گرفتار می شوند در هر سه قصه همین بود چارمین داستان داستان چاروم مربوط به ابراهیم علیه صلات و السلام و برادر زادهش لوت است. قبلا هم ما خواندیم استحضار دارید که ابراهیم علیه الصلا و سلام بعد از اینکه از عراق هجرت کرد به شام آمد مسکنش شام بود فلسطین بود اینجا همسر خودش ساره را گذاشت و همسر دیگر حاجر را برد در مکه مکرمه با فرزندش اسماعیل لذا این دو مرکز توحید و دو مرکز دین اینها را حضرت ابراهیم اداره می کرد بیت المقدس و بیت الله اون بیت الله را اول رفت بنا کرد بعد از اون بیت المقدس را بنا کرد و اینجا کی بود برا درزادش لوت با او همراه بود لوط را الله عزوجل به عنوان پیامبر بعد از اینکه حامی و صدیق ابراهیم بود به عنوان پیامبر برای منطقه نزدیک از همین منطقه فلسطین در همین شام منطقه به نام عموره و به نام سدوم شهر بعضی میگن اینا دو تا شهر بودند عمورا هم آمده سدوم هم آمده بعضی میگن یک منطقه بود بالاخره به شهر عمورا و شهر سدوم فرستاد که اونجا برو تبلیغ کنه اون کناره اردن هست و رود اردن هست اونجا رفت و مردم را موعظه کرد مردم را تبلیغ کرد و اینجا ابراهیم علیه السلام بود اون قوم علاوه از شرک خصلت بدی داشت فساد اخلاقی داشت و هم جنس بازی و هم داشت. بسوی جنس گرایی داشت گرایشش به سوی جنس و حضرت لوط علیه السلام خیلی تفهیم کرد خیلی خیرخواهی کرد اما گوش نکردن لذا در این داستان داستان پنجم اینه که فرشتگان به شکل فرشته می آیند پیش حضرت ابراهیم و بعد پیش حضرت لوت چند تا فرشته بودن بعضی میگن سه نفر بودند حضرت جبرائیل بود اسرافیل بود و میکائیل بود بعضی میگویند که نه تا بودند نه تا فرشته بودند خلاصه اول آمد مهمان ابراهیم شدند مهمان ابراهیم که شدند ابراهیم نشناخت ابراهیم هم پیامبر خداست پیانبران صفاتشون و خسلتشون با عامه مردم فرق داره پیان مهمان نوازند دست و دل بازند ابراهیم علیہ السلام درنگ نکرد فوراً رفت تنها گوسالی که داشت تنها حیوان اهلی که داشت اورا را که هم خوب چاغ و چله بود اون را کرد کباب کرد بهترین پذیرهایی این سیرت انبیاء است که اولاً از مهمان با بهترین پذیرایی پذیرایی کن و بعد مهمان کی میاد سوال نکن سوال نکن که چیزی میلداری چیزی میخوری نهار خوردی یا بدون نهار آمدی این سوال کردن دلیل بخل انسانه میلداری چیزی بیارم چای میفرماید بیارم غذا بیارم او خودش میگه نه نه یار لذا ابراهیم آلے و السلام سخاوت نشان داده دست دا خودش این موارد اخلاقی را و نکات اخلاقی را هم از آیه بگیرید که باب مهمان باید چگونه برخورد بشه و هم چی اعتقادی را که همیشه اینجا یادآوری میکنم هم بگیرید. اون اینه که از این جریان معلوم میشه نه فرشتگان علم غیب داشتن نه ابراهیم علم غیب داشت یعنی نه پیامبران و نه فرشتگان وقتی این دو گروه نداره علم غیب دیگه کی میتونه داشته باشه چرا چون به شکل انسان آمدند جبرائیل فرشته هر روز با پیامبر خدا سر, سر و کار داشت ارتباط داشت با ابراهیم اما امروز که بالباس مبدل آمده به شکل انسان های دیگه آمده ابراهیم نمیشناسد نمیشن اصده هیچی که وحشت هم دارن اینه آمدند من قصد جالی منه چرا غذا نمیخورند پس پیامبر خدا علم غیب ندارد فرشتگان هم علم غیب ندارند که پیغمبر رفت بیرون چرا رفت بیرون که حداقل بگن بگند خودت را زحمت نده ما فرشتیم ما غذا نمیخوریم رضا ابراهیم هم درنگ نکرد که اول به فکر خوراک اول به فکر پذیرایی مهمانی کیمیات قبل از اینکه از او احوالش را بپرسی قبل لازم برایش خدمتی بکن قبل از برایش خدمتی پذیرایی چیز داشته باش لذا همه این موارد از آیه مستفاد هستند الله می فرماید ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى آمدن رسول ما معلوم میشه که جنب بودن سه تا حد عقل هست نه تا حد اکثر است و لقد جاءت ابراهیم ابراهيم بالبشره پیش ابراهیم با بشرا با مجد آمدن مجدی حامل خوش خبری بودند قالوا سلاما سلاما ای سلمنا سلاما خب سلام گفتند امید ایجاد کرد خودی هستند ابتدا قال السلامون ابراهیم گفت سلام یعنی علیکم سلام یا سلام تو سلامن اون مالیونا میشه سلامون یعنی سلامون علیکم فمالبث ان جاء بعجل حنيذ نماند اینکه آمد با گوساله پخته شده آماده شده فلما راى ايديهم زمانی که دید که دستایشون را لا تصیلو علیه بسوی اون غذا نمی رسد و غذا مل نمی کنن نکرهم از اونها ان را, را نپسندید ناگوار شد همین که غذا نمی خورن و اوجس منهم خیفه و در دل احساس کرد از اونها خوف اونها دیدن که ابراهیم علیه صلی اللہ وسلم مستربه پریشانه راحته در آیه دیگه هست که قوم منکرون شما ناشنایی دارد. هدف شما چیه؟ غذا هم نمی خورید قالو لا تخف گفتن نترس از اینجا معلوم میشه که انبیا بر اساس اون فطرت انسانی ترسان بر اون میامد چون بشر هستند و بشر خواست خاص خودش را دارت لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط ما فرستاده شدیم بسوی قوم لوط فرستاده شدیم ما ماموریت دیگه داریم ما اینجا برای یک ماموریت مختصر آمدیم از آیات معلوم میشه از سیاق آیات که همسر ابراهیم هم پریشان بود کی هستند ناگهان آمدن تابحال اینا اصلا ندیدیم او هم از پشت دیوار از پشت درگوش میکرد که اینها چی میخواند می بگند اما بعد از اینکه متوجه شد که فرشته هستن اهل بیت نبوت با فرشته و رفت و آمد فرشته اونس داشت از قبل عادت داشت لذا او هم آمد مختی متوجه شد که نگفتم ما فرشته ایم وامراته قائمه همسر او ایستاده بود فضحکت خندید البته مفسرین منجا اینجا تقدیم و تاخیر است اول خندید فبشرنا پس ما بشارت دادیم به ساق بعد از خندید نه اول این هست که او ایستاده بود او هم آمد خوش آمد گفت فبشرناها بساق ما اورغ بشارت دادیم خدا به تو فرزندی میده فضحکت سرورم به سبب تلک البشاره پس این که خندید به سبب اون بشارت بود نه این که بشارت بعدا آمد فقط دم الضحک و معناه تاخیر اینجا ذکر را مقدم کرده اما معنا موخر است خلاصه همسرش حضرت ساره آمد فبشرناها ها به اصحاق مورم مجده اصحاق دادیم فضحکت خندید از خوشحالی و من وراء اسحاق یعقوب بعد از اون دیگه ناس لدامه داشت پشت سر اسحاق یعقوب خواهد بود اما هم خوشحال شد هم کیفیت را پرسید قالت یا ویلتا, ویلتا اظهار تعجب از تعجب خود ای عجیبه ای ای یا ویلا تا آقای دو آیا من به دنیا می آورم بچرا و انا عجوز و من پیر زن استم و هاذا بعلی شیخا این شوهر من هم پیر مرد است. این هاذا لشی عجیب این چیز چیز عجیب هست. اما اونها چی گفتن؟ قالوا اتعجبينا من امر الله الرحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت قلت اي تعجب كردي از امر خدا دستور خدا است فوق العاده است الله وبركاته الله بر شما البيت يعني يا اهل البيت يا أهل البيت چطور باید ترجمه بکنیم؟ ای دختران و نوها و پسرموی ابراهیم همیم اهل بیت به بی همین معنی نمیشه. اهل بیت چه تی اونها به تبع اهل بیت هستند دختر و پسرم اهل بیت هست. اما اهل بیت اصلی کیه؟ همسره. اگه بعدن اهل بیتی درست میشه به همسره. اصل اهل بیت همسران هستند اینجا کیه؟ اینجا فقط ساره هست کسی دیگه نیست به ساره گفته میشه اهل بیت معلوم میشه که اهل بیت همسر انسانه و بعد در آیه سوره مبارکه احضاب انشاءاللہ ما میخانیم اونجا وقتی که همسران رسول الله خطاب شدند از یا ایوه نبی، قل از زوجک این کنتن تریدن الحیات الدنیا و زینتها ختاب میکنه سیق های ختاب نزدیک بیست بار ختاب میکنه. و في بيوت كنا وقرنا في بيوت كنا ولا تبرجن تبرج جهليت الأولى وأقمن الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا هم السياق هاي مع الناس آخر ميجي إنما يريد الله ليذهب لي عنكم الرجس أهل البيت آية تثير معروفة أي آل البيت خدام يخادك شمارا پاک بكونت از آلائش از آلودگی به این خاطر شوار خدا دستور بینه ای اهل بیت یعنی چی؟ یعنی ای ازواج نبی اونا میگن نه، اینجا منظور اهل بیت همسران پیامبر نیستند علی فاطمه حسن حسین هستند به چه دلیر؟ اینجا ببینید سیغه چی آمده؟ يريد الله لیده به انکم سیغه چی زمیر زمیره جمع مذکره انکم رس اهل البیت و کم اگر زنان بودن یتحیر کن نمی شد انکن نمی شد ما میگیم اخی کلمه اهل بیت چی هست کلمه اهل بیت جمع مذکره به اعتبار کلمه اهل بیت آمده جمع مذکر نظیرش دلیلش اینه اینجا سارا چند نفره یک نفره اما به اعتبار اهل بیت چی گفته رحمت الله و برکاته علیکم و رحمت الله و برکاته علیکم نگفته خوی یک نفر بود اما چون اهل بیت لفظان جمع به اعتبار احل بیت کم آمده پس اگر اونجا زمیر زمیر جمع مذکر اعتبار چی هست واژه اهل بیت هست اینان همین کلمه را موسیٰ صلی سلام علیہ بکار برد قال لأهلهم کثو ام کثو چرا نگفت ام کثی همسرش یک نفر بود اما کلمه ام کثو آمد اینجا مکس کن اینجا بمان سیغه جمع مخاطب آور چون لأهلی به اعتبار لفظ اهل اهل جمع مذکر هست لذا ما چندین نظیر داریم تو قرآن مجید دلائل داریم که کلمه اهل جمع است. اگر سیغه جمع می آید سیغه مزکر براش میآید به اعتبار اهل هست نه به اعتبار مخاطبی مخاطبین همه زننابان لذا اینجا هم همینه اتعجبین اولم ب سااره میگن من امر الله، رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت ای عليكم یا اهل البیت اینجا چون بعدا به همون یک ساره گفته شد اهل بیت باعتبار اهل بیت دیگه گفت نگفتا علیکی عليك گفتا علیکم اهل بیت انه حمید مجید همانا انزات ذات ستود شده است و مجید است داره مجد و عظمت است فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْرَوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى زمانی که از ابراهیم وحشت و خوف رفت و مجد آمد الان ابراهیم ای بحث می کرد در قوم لوط پیامبر چقدر ملاتفت داره چقدر لطف در وجودش هست چقدر خیرخواهی هست یجادلونا ای یجادل رسولنا با رسول ما بحث کرد در بر قاملود می گفت نمیشه یک یک دیگه بدید نمیشه عذاب را مؤخر کنید پیامبران گرچه گاهی انتظار عذاب میکشیدن اما هم همین عذاب اونها را هم آزار میداد که چرا این قوم بدون ایمان از این دنیا بره لذا با ما بحث میکرد یعنی با رسول ما با فرستادگان ما به خاطر تاخیر عذاب اما اینکه بحث میکرد جدل میکرد دلیلش چی بود ان ابراهیم لحلیم اوواهم منیب اما انا ابراهیم حلیم بود بردبار بود اوواهم نر دل بود منیبون به سوی الله انابت الرجوع داش رجوع کنند به الله بود این قد گفت و گفت اینکه خداوند او وای کرد یا ابراهیم و اعرض عن هذا ای ابراهیم عظیم بحث ایراز کن دیگه فیصل قطعی اللہ شده بیشتر در این رابط چیزی نگو انه قد جا امر ربک همانا امر رب آمده فیصله شده و انهم آتیهم عذاب غیر مردود همانا پیش انها می عذابی اون عذاب رد نمیشه. اون عذاب رو برگشت نداره اون عذاب باید بیاید. الله می ولما جاءت رسلنا رُسُلُنَا لُوتا زمانی کے پیانبران ما وفر استادگان ما پیش لوت آمدن سی ابهم نگران شد بسبب انها چون انها چند پسر بچه بودن نوجوان بودن زیبارو بودن لوت میدونیس فساد قومش را این از این معلوم میشه که این پیغمبر هم غیب نمیداند اینم نمیدان اینا فرشتگان خدا هستند نمیدونه که فرشته نجات هستند که خوشحال بشه غمگین میشه سی ابهیم به سبب آنها غمگین شد نرهد شد و ضاق بهم خدا میدونه اون ساعت این پیغمبر چه حالی داشته که قرآن از درون اون تعبیر میکنه و تعریف میکنه تنگ شد به سبب اونها در یعنی در دل دلش تنگ شد دلش گرفت بعض وقتا بعضی وقتها بعضی می میگه امروز دلم گرفته دل انسان میگره میخواد یه جای بره تنها فریاد بزنه گریه بکنه لطفا لسلام صلوات و سلام چنان مهمان آمده دلش گرفته که اگر اگر بی این مهمانا الان بیان خبر بشن روز بکنم من چیکار بکنم غافل از این که این همسرش که منافق است این همسرش رفته بود خبر داده بود و قال هذا يوم عصيب گفت این روز روز سختی است که من باید از مهمانانم محافظت بکنم اینها الان که خونه من آمده ننگ و ناموسن وجاءه قومه يهرعون اليه امدن بسوي او قومش در که كه ميدويدن بسوي او و من قبل كانوا يعملون السيئات قبل زين انها عمل السيء و عمل زشت انجام جاء ميدادن عمل اللواط ان جاء ميدادن اينها در زدند گفتم لوط ما چيني خبري چني ديم گفت اي قوم قومی قوم بدبخت شما چرا به این سمت و سو تمایل دارید به طرف دختران من دختران من منظور همسرانشون بودند چون یک پیامبر پدر روحانی امت خودش هست ملت خودش هست همین دختران من که خدا برای شما حلال قرار داده برید جانی ازتون را براورده بکنید منظور دختران خود لوت نیستند گرچه بعضی همین احتمال را نوشتند چون که ن لؤتله سلام تبقى الروايات الصحيح اول و آخر دو تا دختر داشت همون دو تا دخترش ایمان آوردند مادرشون که ایمان نه آورد همون دوتا دخترش را بردشت از این شهر رفت پس به قوم گفت قال يا قوم ها غل البناتي ای, ای قوم اینها این دختران من همین دختران من که در عقد شما هستند هن آدخر لكم اونها پاکیزترم بر شما فاتقو الله از الله بترزید از الله پرواد داشته باشید ولا تخزونی في ضیفي و مرد درباره مهمانانم رسوانه کنید مر شرم سار مهمانی من است. من کن رجل الرشید آیا یک مرد رشید در میان شما نیست؟ یک مرد رشید یعنی مرد خوب، مرد فهیم مردی که درست بفهمه درست تشخیص بده للحق و چنان رشیدی که خودش هم فهم، فهمیده باشه حق را بفهمد و شما را هم بسوی حق بخاند علیس هم رشید اونا گفتن تو می دونی ما چنان مرضی داریم که ما بسمت سمت تو هیچ تمایلی نداریم. اینهاي که به این, این مريزي جنسی گرفتار هستند، اینا هیچ تمایلی به جنس مخالف ندارند. هیچ تمایلی به زن ندارند. تمایلشون به مردها هست. گفتند که تمی قال لقد علمت ما لنا في بناتك من حق من حقني من حاجه ما به اون دختران تو هیچ نیازی نداریم یعنی اون همسارانی من تمایلی نیست اونجا ما نمیتونیم نیازمون من را براورده بکنیم و اینکا لتعلم ما نورید تو میدونی ما چه میخوایم دیر راهی من را باز کن ما را نکن لاخره اینجا پیامبر خدا حضرت لوت تنها بود از نظر پشتیبانی پشتیبانی نداشت قومی نداشت اینجا هم غریبه بود قال لو ان لی قوةً کاش برای من در مقابل شما قدرت بود که من لحتم میکردم او آوی الى رکن شدید یا کاش من پناه میبردم به رکن شدید به قبیله غوی محکم کاش قبیله غوی داشتم که از اونها و از ظرفیت اونها بر علی شما کار میگرفتم و میگفتم که با شما بجنگند شما را دفت کند ولی قبیله هم اینجا ندارم خودم هم تنها هستم اما به تنهای مبارزه کرد و نگذاشت نگذاشت فرشتگان دیدند که لوت علیه السلام داره جر رو بحث میکنه و اونها حیف اشار میارند لوت جلویشون رو میگیره اونها اول میدن لوت اونها را اول میده بالاخره دست به گریبانی هم دیگه هستند اینا اینجا گفتن لوت تو نگران نباش ما فرستادگان رب هستیم ما آمدیم عذاب بدیم بذار بیاند اینجا بود که لوط علیه سلام تغوییت شد لوط علیه سلام پشتش گرم شد گفت برین شو اینها هم حجوم آوردند چنان حجوم آوردند که گفتند بلا نسبت و بلا تشمیح گویا گروسنگانی هستند بسوی ظرف غذا میرند چطور حجوم میاره همطور حجوم آوردن به طرف فرشتگان حجوم که آوردن الله تعالی میفرماید که شما قبلا خاندید که ما دید رازشون گرفتیم چشمشون را ما نابینا کردیم اینا که داشتم به طرف فرشتگان می آمدند در وسط را در همین مسیر یه دیدن که تمام دنیا سیاه شد چه خبره او گفت من نمی بینم دومی گفت منم نمی بینم سومی گفت. همه می نگفت همه دیگه کور شدند دیلشون را از دست دادند بعد فرشتگان گفتند که حالا اونا پریشان شدند گفتند که ایلوت بردارس وقت سحر دخترانت را که به تو ایمان آوردن بردار از شهر برو که وقت سحر اون عذاب همگانی هست اینا که همینجا سرگردان و پریشان و چشمشون را از دست دادن لذا اللہ می فرماید قالو یا لوتو انا رسول ربک گفتن ایلوت ما فرستادگان رب تو لن یسلو ایلیک هرگز بی تو یعنی بمهمانان تو فاسر بی, بی من اللیل برب اهلت بت ثكئ السب يعني نيمه شب طائفه من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك پشت سر نگاه نکند هیچ کسی برید شما پشت تون را نگاه نکنید برید الا امراتك این الا امراتك استثناء از اسر باهلكاست كتمام شرارت از اون اهل تو هست اون را نبر اون بغیرا ببر انهو مصيبها ما أصابهم همانا بی اوهمی رساد آنچک بی قوم رسيد از عذاب ان موعدهم الصبح همانا موعد انها وعده ازاب صبحانس أليس الصبح بقريب. لوت اجل داری مگر صبح نزدیک نیست نزدیکه بردار برو دیگه فلما جا امرنا زمانی کے امر ما امر عذاب آمد جعلنا علياها اصرافها قرار دادیم ما بالای این روز تار پایین و پایینش رب بالا یعنی سر نگونش کردیم چاپه اش گردیم و امترنا عليهم حجاره من سجیل و بر برانها سنگهای از سنگل سنگ ازلی سنگ و خالص هم نبودند سنگل بودند که منضو ته به ته بودند یعنی فشورده بودند مسوومه عند ربك نشانی شده بودند نزد ربت و ما هي من الظالمين ببعید اون قوم یعنی از ظالمین از ظالمین منظور مشرکین مکه هست از مشرکین مکه دور نیست از مشرکین مکه فاصله زیادی نداره ببینید در مسیر شام می شد همین روستاهای های صدوم و اموره این دو شهر صدوم و اموره کجا واقع میشه؟ در مسیر بین مکه و شام هر وقتی که عرب ها برای تجارت به شام می رفتن سر را واقع می شد در همون شهراء اصلی شما می خانید در سوره حجر و انهما لب امام مبین در همین شهراء اصلی واضح هست کجا هست الان؟ اونجا از کردم یک دریاچه سیایی هست دریاچه میت بهش میگم بحر میت میگویند بحر میت آب متعفن سیایی هست خیلی هم امق داره و انسان اونجا نمیتونه زیاد بیسته از بس که تعفن بو داره این اینان همون جایی هست که خداوند زمین را سرنگون کرد و زد هنوز آثار هنوز اون بحر میت و اون بحر اسود وجود دارد لذا الله فرم می فرماید در مسیر هستند اینها می همیشه ببینن تماشا بکنند زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به تبوک رفتن که تبوک هم همون جانب شام هست وقتی که اونجا رفتن در مسیر بود از اونجا صحابه را گفتن زود رد بشید که اینجا محل عذاب است اینجا رحمتی نیست حالا ای حال ان الله تعالی را به این صورت عذاب داد گرفتار کرد و لوتر را و دخترانش را نجات داد و الی مدین اخاهم شعیب این داستان پنجم هست دلیل نقلی پنجم است همه این انبیا خلاصین دلیل این همه این انبیا دعوت توحید را آوردند قوم انکار کردند و لبیک نگفتند به دعوت انبیا عذاب آمد شما مخاطبین مکه هم اگر مثل اونها باشین برای شما هم عذاب میت خدا پروائی ندارد اینجا داستان مدین هست که برای مدین حضرت شعیب فرستاده شد قبلا خلاصه هم در رابطه با مدین ارز کردم که خود مدین برادر حضرت اسماعیل و اسحاق است. فرزند ابراهیم هست اما از شکم همسر سوم ابراهیم که خطورا بهش میگفتند این مدین ابتدا با برادر خودش اسماعیل برادر بزرگ اسماعیل بود با برادر خودش اسماعیل در مکه زندگی میکرد این ابراهیم تحویل اسماعیل داده بود یا خودش آمده بود اینجا زندگی میکرد و بعد اینها وقتی که نسلشون اولادشون زیاد شد فرزندان مدین از اینجا کوچ کردند در مکه چیزی نبود در کنار امو اسماعیل چیزی نبود. لذا اینا کوچ کردن رفتم به طرف همون مسیر شام رفتم بین از کنم که سینا و بین حجاز یک منطقه بود منطقه نسبتاً آباد بود اونجا سکنا گذیدن برای خودشون یک روستایی که بعدن تبدیل به شهری شد خود همینها درست کردند و اسم اون روستای خودشون را به نام جدیس گذاشتند به نام مدین گذاشتند. لذا اون شهر را مدین میگویند پس مدین هم فرزند ابراهیم است و بعدن از همون نسلی که اونجا رفتند آباد شدند و زندگی کردند از همون نسل همبرشون حضرت شعيب هم متولد شد. بس گویا حضرت شعيب و حضرت موسی و حضرت محمد صلی الله عليه و وسلم همه فرزندان سه تا برادر هستند. رسول الله فرزند برادر بزرگ اسماعیل هست، نوه‌ی اسماعیل هست، از نسل اسماعیل هست، موسی علیه الصلاۃ از نسل اسحاق هست. و شعیب علیه صلی اللہ از نسل مدین است اینا از نظر نسبی اموزاده میشن دیگه لذا اللہ میفرماید و ایلا مدین اخاهم شعیبا بسوی مدین برادرشان شعیب داستانش رو شما قبلا خاندید که کهل و وزن و چه بدبختی های داشتن قال يا قوم الله گفتند ای قوم فقط الله را عبادت کنید ما لکم من اله غیر این علت است چونکه برای شما هیچ معبودی بجز الله نیست وَلَا تَنْقُسُ الْمِكْيَالَ و چینین از نظر عملی فساد نکنید کلا بردار نباشید وَلَا تَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ کم نکنید در کیلو در وزن انی اراکم بخير این ترغیب است اگه شما این کار کردی بلش ما خیر می بینم. اینی را کم من می بینم شما را هم را به خیر و اینی اخافو عليكم وان انترهی بس. اما اگر مرتکب شدید و اینی اخافو عليكم عذاب یوم موحید من میترسم بس شما از عذاب روزی که اون روز شما رایعات میکنند و یا قوم آفرمیکیال و المیزان. ای قوم من شما کامل کنید کیل و زراب به ادال کامل کنید و لا تبخسون ناسا هم نکنید در اشیاء مردم کم نکنید در جنس مردم و لا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ و شما نگردید در زمین فساد کنند با فساد نگردید هرچی که خدا برای شما فایده داد همون بهتره برای شما فایده مشروع از این فایده نامشروع بقیت الله خیر لکم بقیت الله یعنی ما یبقیه الله اونی که خدا برای شما میگگذارد بعد ایفاء الحقوق بالقست. بعد از اینکه حقوق مردم را به انصاف میدید هر چی برای شما منفعت ماند او بهتر است برای شما. ببین مراد از بقیت الله چیزی دیگه و کسی دیگه نیست. مراد از بقیت الله چیه؟ این منفعت سیاق و سبقی ع دیگه می بینید. الله خیر لکم اون اونچه که از طرف الله باقی می ماند بهتر است برای شما. این کنتم مؤمنین اگر شما مؤمن هستید و ما انا علیکم بحفیظ من بر شما حفیظ نیستم حضرت شعیب علیه الصلاۃ و السلام پیغمبر خدا بود چند تا ویژگی داشت هر پیغمبری در خدای تعالی یک ویژگی داده یکی از خصوصیات حضرت شعیب نماز خواندن بود اینکه نماز می‌خوند چنان نماز میخواند هم با کسرت و هم کیفیت چنان با لذت با لطف با حضور قلب و چنان زیاد نماز میخواند که نماز شایب معروف شده بود معلوم میشه که انبیا در وصف عبادت خیلی قوی بودند و همچنین شایب علیه سلاط و سلام یه پیغمبری بود بسیار فسی بلیغ از نظر سخنرانی و خطابت توانا حتی در کتاب ها و در تفسیر ها به شعیب علیه صلی و علیه لقب دادند دادن خطیب انبیا بهش میگند چی میگن؟ خطیب انبیا. بسیار خطابت پر تأثیری داشت بسیار سخنرانی بلیغی داشت وقتی که اشون خطابت سخنرانی میکرد مردم متحول میشدند بالاخره اونها به شعیب گفتن که این کی چند رکعت نماز می این باعث شده که ما باز بداری نمی گزاری ما عبادت کنیم انهایی را که پدران ما عبادت میکردند، و میخوای خواهی ما را که ما در اموال خودمون هر تصرفی میکنیم، هر کاری میکنیم، بکنیم ما این کار رو نمی کنیم. ما مال مال ماست اختیار مال ماست بعضی وقتا که به مردم درباره نوع معاملات و داد و ستتشون می گوییم و میگویند گویند خیرخان می گویند که شما تو مسائل بازار ما دخالت نکنید باید دخالت کرد این نکته رو هم برای شما اهل علم بگم که همون طور که انبیا تنها برای عبادت مردم برنامه نداشتند امبیا رهبر و رحنما بودند در همه شعون شؤون نه تنها در بعد عبادی بعضی امروز میگن علما تو مسجد بشینن با بقیه کارها کار داشته نباشند تو مسجد بشینن فقط درباره آخرت و دین به مردم بگن هر کی قبول کرد کرد نکرد نکرد چیکار دارن با کارای سیاست چیکار دارن با حکومت اینا که مال نخیر نه اینا اگر جانشین پیامبران هستند و اگر العلماء و رثت الانبیاء هست هر کاری که انبیاء کردند انبیاء در همه زمینه ها دخالت کردند امین انبیاء در بعد اولا اقاید و ایمان مردم را راهنمایی کردند ببینید شرک نکنید ببینید احدی را با خدا شریک نسازید فقط یک خدا را عبادت کنید پس این وظیفه اصلی و اولی علما است که در بعد عقاید ایمان عبادت و وظیفه دوم در رابطه با بقیه مسائل هر مسئله ای که ضعف داشتند اگر مشکل مشکل اخلاقی هست فساد گرفتار گرفتار فساد اخلاقی بی حجابی، بی بندوباری وظیفه هم بیاست همونطور که حضرت لوت بعد از توحید چیکار کرد در زمینه اخلاق اونها را رانمایی کرد اونا گفتن تو چیکار داری با کار ما گفت نه شما داری به بیره میری شما داری فساد میکنید امروز هم بعضی میگن چیکار دارم به پوشش ما ما هرچی میپوشیم ما آزاد هستیم نه ما وظیفه داریم ما مامور خدایی هستیم خدای عزوجل دستور داده که به بندگان من راهنمایی کنید به سمت فساد نرند به سمت فحشا نرند به سمت بی نرند. این فساد و فحشات تبعاتی برای زمین و اهل زمین دارد خدا که ناراضی بشه خدا اون وقت همه را از بین میبرد لذت در زمینه فساد اخلاقی هم جانشینان علما مسئولیت دارند باید مبارزه بکنند در زمین بازار هم باید دخالت بکنند نگذارم مردم هر معامله ای که دلش میخواد این معامله تبعاتی در معامله ربوی میکنه میگه چیکار در با معامله ما بلی کار داریم اگر شما معامله ربوی بکنید و هر کاری که دلتون بخواد عذاب خدا میاد عذاب خدا که بیاد باران قهد میشه زلزله میاد سائقه میاد مشکلاتی دیگه میاد و اون وقت این عذاب دیگه نمیشناسه شناسه مرتکب و غیر مرتکب را تر و خوشک را همه را از بین میبره لذا خیرخواهی اهل زمین اینه که در همه با همه منکرات مبارزه بکنیم اگر مردم در مسائل سیاسی اجتماعی حقوق خودشون مشکل دارند هم وارثان انبیا وظیفه دارند با ارباب حکومت با بزرگ مردان حکومت صحبت کنند و در رابطه با حقوق مردم صحبت کنند موسی علیه سلات و السلام مگر نیامد نگفت که ای فرعون، ان ارسل مئی بنی اسرائیل بنی اسرائیل را آزاد کن مگر بنی اسرائیل برده تو هستن که تو اینها را به بردگی گرفتی مفت ازشون کار میگیری اینا برزاده هستن اینا اصالتا احرارند آزادند نجیبند چرا اینها را به بردگی گرفتی؟ من آمدم که بنی اسرائیل را از این بردگی و از این بندگی تو نجات بدم پس طالب حقوق اجتماعیشون شد یا نشد طالب آزادیشون شد یا نشد لذا علماء وظیفه دارن در رابطه با آزادی مردم و حقوق مردم که مردم باید آزاد باشن هم فعالیت بکنند پس در هر زمینه ای انبیاء کار کردن ببینید اینجا شایب علیه سلام داره مردم را راهنمایی میکنه مثل مردم همین زمان ما اون زمان فر هم مردم بهش گفتن تو همون نمازت را بخون تو با کار ما کاری داشته نباش اصلاتو کا تمر کا آیا ناز تو تو امر میکنه ا نطور ما معی و ابا که ما راحت کنیم ترک کنیم اون چیزی که پدران ما ایبادت میکردند، آو انفعل ان فی اموالنا ما نشآ، یعنی که ما انجام بدیم در مال خودمون هرچی میخوایم، ما دوست داریم هر کاری میکنیم با مالمو، به چه ارتباطی داره؟ اما شعب گفت نه، به من ربط داره. اینکل انت الحليم میگه این جمله جمله استهزائیه هست. تو آدم بردباری هست رشید یعنی خوبی. ما نمیخوایم خوب بشیم، ما رب بزار در کار ما دخالت نکن. قاله یا قوم ارائیتوم، در صورت تبلیغ پیامبر و تبلیغ وارث پیامبر تأثیری دارد که هیچ تماهی در مردم داشته نباشد. اما هر کسی نان بنا نام دین بخورد. از جیب همو مردم بخوره زیاد نمیتونه با اون مردم رو راست باشه حرف حق بزنه. لذا اینجا پیامبر خدا علنی میگه من از شما هیچ چی نمیخم. قال یا قوم ارائیتم ارائیتم این كنت على بینت من ربی ای قوم به من بگوید ارائیتم اخبرونی به من بگوید این على بینت من ربی اگر من بر بینهی باشم بر دلیل و مدرک باشم از جانب ربم و رزقنی منه رزقن حسنا و به من خدا عطا بکند از جانب خود عطای زیبا منظور از عطا چیه بینیسی نبوت نه نیست غذا نیست رزقنی منه رزقن منظور حکمت نبوت خدا به من نبوت داده به من حکمت داده به من عقل و دانایی داده و ما اوید و ان اخالف ال انها من منم دوست ندارم با شما مخالف باشم در گیر بشم باشما ال انهاکو من ان به اون چیزی که من شما را باز میدارم در این مسئله که من مانع شما هستم نمیخوام مخالف شما بشم میخوام شما حرفی خیرخار بول کنید این اوید و ال اصلاح هم من اراده ندارم مگر اراده اصلاح دارم تا جایی که بتوانم و ما توفیقی الا بالله رفع عجب میکنه هرچی اگر میگویم خودم هنری ندارم رب من هست توفیقم بر الله است و ما توفیقی الا بالله داعی در عین حالی که دعوت میده خودش را از همه کمتر و کچکتر بالخصوص در مقابل لطف پروردگار دانم. علیه توکلتو فقط و فقط بر او من توکل کردم در همه مهمات امور و الیه اونی فقط به او رجوع میکنم لذا من از او حرف شنوی دارم از او فرما میبرم پیام او را دارم به شما میرسانم ای قوم من هدفم درگیری با شما نیست و یا قوم از همین جمالون میشه که چقدر این پیامبر تدبیر و حکمت را در نظر بیگیره همونطور که ارز کردم واقعا خطیب و بیاست استدلالاتش استدلالات منطقی هست اگر قوم بدبخت ایناد نداشتند ایمان می آوردند می با همین جملات قانه می و یا قوم لا من نکم شقاقی ای قوم من شما را تحریک نکند مخالفت با من اینکه با من مخالفت با من حسادت دارید از نظر قومی رقابت دارید چون تیره تیره بودند این باعث نشه که بر شما عذاب بیاد یعنی خاطر مخالفت من زد کنید و عمل نکنید ای یصیبکم مثل ما اصاب به بشما برسد مثل آنچه که رسید بقوم نو یا قوم هود یا قوم صالح نا مثل اونها نباشه و ما قوم لوط منکم ببعید قوم لوط هم از شما دور نیست ببینید همین زودی برای اونها عذاب آمد در زمان ابراهیم آمد دیگه شعیب از نوادگان ابراهیم هست واستغفروا ربکم از ربتان معذرت خواهی بکنید مغفرت بطلبید ثمه توبو بعد از این که بخشش خواستید رجوع کنید به سوی خدا بعد از اون خوب عمل کنید خدا را راضی کنید ان ربی رحیم و دود همانا رب من هم مهربان است هم ودود ودود به معنای این که بندگانش را دوست دارد محبت کننده است ودود یعنی چه محبت کننده است هر کسی که به سمت خدا میره خدا با او محبت میکند قالو یا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول گفت ای شعيب بسیاری از صحبت های که تو می کنی ما نمیفهمیم وَإِنَّا لَنَرَا كَفِينَا ضَعِيفَ ما تو را در میان خودمون آدم زعیفی میبینیم تو در جایگاه نیستی که بیای ما را من نسیت بکنی و اگر همین تو نبود تو با ما نبود تو را از بین میبردیم وَلَوْلَا رَحْتُوْكَ لَرَجَمْنَا اگر خیشاوندیت نبود تو را سنگسار میکردیم وما انت علی نبی عزیز الان با این سخن هایی که به ما میگویی با این راهنمایی که ما میکونی کنی برای ما گرامی نیستی برای ما عزیز نیستی احترام پیش ما نداری اما جواب شعیبی قال یا قوم ارهتی اعز عليكم من الله ای قوم من آیا نسبت من قوم قومداری من فامیلی من معززتر است با ارزشت تر است بر شما از الله شما داری الله را ناراضی میکنید خبر دارید میفهمید چیکار دارید میکنید وتخثمو وراءکم ظهریه شما اون الله را گرفتی پشت سرتون ظهری یعنی بهش پشت دادید خدا چی پشت دادید این ربی بما تعملون محیط رب من به اونچه که شما عمل میکنید احاطه کننده هست بلکه هرچی استدلال آورد قوم زد کرد گفت نه امکان نداره ما برگردیم. لذا آخرین سخن شعیب و یا قوم عملو على مکانتی کوم قوم به جایگاه خودتون عمل کنید. اینی عامل منم به جای خودم عمل میکنم. منم با خدایم ارتباط را مستحکم تر میکنم شما که مسیر شرک را نمیزارید مسیر فریب, فریب دادن مردم و کلاهبرداری را نزارید ننظراریدید کار کنید. سوف علممون دیری نخواهد گذشت ان قریب میدانید من یاتیه عذاب و یوقضی چه کسی پیش اومید عذاب کو را رسوا می کند کالب و من هو کارد با چه کسی دروغ است؟ شما من نسبت به دروغ میدید. می بینید که خدا شما را عذاب میده رسوایتون میکنه من هم خلاف نگفتم وارتقب انی معكم رقيب منتظر باشید من هم با شما منتظرم الله ولم ولما جاء امرنا نجینا شعيبا وقتی که امر ما آمد امر عذاب آمد ما نجات دادیم شعیب را و آمنوا معه کسانی که ایمان آوردن هم با او منها بسبب رحمت لطف پروردگار رحمت خداش عمل حال شو شد و اخذت الذین ظلم و گرفت آنها را که ظلم کردن ستم کردن بر خودشون صیحة صیحة همون صدای جبرائیل همون جیخ و فریاد جبرائیل فاصبحوا في دیارهم جاثمین در خانه های افتادند سرنگون افتادند کالم یغنوا فیها یعنی چنان چراغ زندگیشون خاموش شد و این شهر یک باره یک لحظه چنان ساکت و خاموش شد شد شهر مردگان کالم یغنوا فیها گویا اینها در این زمین نماندند قبلا خندم غنم بالمکان یعنی در مکانی در محلی سکونت کردن گویا در این زمین اونا نماندند سکونتی اصلا نکردند الا بعدا لمدیان الله میفرماید آگاه باشید خبردار دوری برای مدین قوم مدین و اهل مدین دوری از رحمت خدا کما بعدت ثمود همان گونه که قوم سمود که قبل از مدین بودن از خدا و رحمت خدا دور شدند و عذاب گرفتار شدند اینها هم به عذاب گرفتار شدند و خدا آنها را از رحمت خودش دور کرد ولقد ارسلنا موسی بایاتنا وسلطانا مبینا الى فرعون وملئه فتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید این دلیل نقلیه ششم هست یا هفتم اگر داستان ابراهیم و لوط را دو تا جداگانه بکنیم هفتم میشه که الله تعالی دربارۀ موسی و امت دعوت موسی که فرعونها بودند می فرماید ولقد ارسلنا موسی بایاتنا وسلطان مبین همانا ما موسی را همراه با معجزات خودمون فرستادیم و همراه با سلطان مبین موعظه واضح موعظه روشن الی فرعون وملئه بسوی فرعون و فرعون بسوی فرعون و کسانی که جز درباریان بودند جز مشاوران بودند اشراف بودند اما حماقت فرعونی ها را ببین که بجای اینکه از پیامبر خدا تبعیت بکنند از نبی خدا تبعیت بکنند فتبعو امر فرعون آنم پیروی کردند از امر فرعون در حالی که وما امر فرعون برشید امر فرعون خوب نبود رشید یعنی صحیح درست بر مسیر خطا بود بر مسیر ثواب و خوب نبود لذا به همین دلیل هست که فرعون یقد ومقومه یوم القیامه پیشا پیش خمش حرکت میکند در روز قیامت پیشوای قوم خودش خواهد بود در روز قیامت فاوردهم النار وارد آتش میکنند آنها را ونهارا بجحنم يبرد ميرصانت وبئس الورد المورود بسیار ورد بدی هست ورد یعنی محل دخول محل ورود المورود اون محلی که واردین اونجا وارد میشوند جایی که کسی وارد بشه این کس وارد هست اونجا میشه مورود و بسیاری معتقدن که ورد مراد اون محلی که برداشت آب هست اون را میگم ورد آب سر به اسلامی میگویند شاید دیده جای غناتی چیزی هست آب از زیر زمین از چاه به چاه منتقل میشه شما نمیتونید آب برداشت بکنید چون آب زیر زمین هست اما از اون مرکزی محلی که آب بیرون میاد و از زنها و مردها میرند اونجا آب میدارن، اونجا میگم ورد. یعنی این جایی که فرعون اونار وارد میکنه که جهنم باشد این جای بسیار بدی هست این مورود, مورود بسیار بدی هست که اونها وارد می شونن جا و اتبعو فی هاده لعنتا و در این دنیا لعنت هم دنبال اونها شد تعقیب شدن با لعنت یعنی لعنت خدا نفرین خدا دوری از رحمت پشت سرشان و یوم و در روز قیامت هم ها در روز قیامت انها هم ملعون و مورد خشم و خدا و بئس الرفض المرفود بسیار این عطای بدی هست رفت این عامره میگه عطای میگه المرفود این عطای داده شده این عطای هدیه شده یعنی همین مسیر کفر مسیر زد و اناد که فرعون به اونها عطا کرد این عطا بدی بود بلاخره معنیش اینه که فرعون رهنمای قومش شد پیشوای قومش شد قوم بجای این که از پیشوای حقیقی تبعیت کنه از سیدنا موسیٰ علیه سلاط و سلام تبعیت کنه اس فرعون تبعیت کرد نتیجه چی شد در این دنیا هم غرق شدند نابود و هلاک شدند در روز قیامت هم یک دو قومه و یوم القیامه پیشا پیش قومش حرکت میکنه اونها رو به جهنم میبره اون محلی که محل ورود بسیار بدی هست به اونها عطای میده اکی عطای بسیار بدی هست نتیجه نتیجه اینه که هر کسی که از انبیا و نمایندگان خدا گوش نکند حرف شنوی نکند و دنبال روی دنیا و اهل دنیا و اهل مادیات باشد این zarar میکنه دنیا و آخرت خودش را خراب میکنه بعد از این الله تعالی جمله بیان از این داستان های هفت گانه که از هفت تا بودند و ملت‌ها و امت‌های آنها بودند خداوند تعالات به صورت جمله معترضه این داستان‌ها را دلیلی برای صداقت و حقانیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و از اینها نبوت را اثبات می‌فرما. به چه صورت؟ ببینید ذالک من انباءِ القرآن نقصه علیک ای محمد صلی علیه و وسلم اخبار شهرها و اخبار قرارا ما برای تو تعریف میکنیم این که شما از اخبار این شهرها دارید بیان میکنید تعریف میکنید دقیق هم بیان میکنید این دلیل اینه که ما بستو وحی میکنیم دلیل این هست که ما به سوی شما این اخبار را میفرستیم. پس دلیل اینه که تو نبی خدا هستی تو پیانبر خدا هستی چرا؟ چون که کسی که به مکتب نرفته کسی که سواد نداشته کسی که قلم به دست نگرفته کسی که تاریخ نخانده کسی که از احوال گذشتگان هیچ اطلاعی نداشته ندارد اون انسان حالا بعد از نبوت وقتی که همه را از درباره همه تعریف می کند از نوح گرفته تا قوم آت قوم سمود قوم لود قوم شعیب قوم موسی ابراهیم از همه با جزئیات تعریف می کند مکالمات را رد و بدل را پیغمبر چی گفت قوم چی جواب داد قوم چی گفت پیغمبر چی جواب داد همه جزیات را بیان میکنه خب از کجا اینها را آورده به غیر از اینکه با عالم وحیه در ارتباط داره بغیر از اینکه با خدا و با فرشته در ارتباط هست دلیل دیگه نتون تونه داشته باشه پس همه این داستان ها علاوه از اینکه موعظه بودند علاوه از اینکه درس عبرت برای توحید بودند که هر کسی توحید را قبول نکند انجامش نتیجهش عاقبتش همین خواهد بود علاوه از اون درس های توحیدی درس اخلاقی همه اینها دلائل نبوتند این داستانها دلایل چی هستند؟ نبو فاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا الله مفرمات ذلك من انباء القرى إن از اخبار قريها ها وشهر نقصه عليك كما تعريف میکنين براي شما اين شهر و اين روستاها منها قائم بعضي قائم هستن وحسيد وبازيها حسيد هستن يعني بعضي از اشارها نوز مثل مصر مصر شاركية فرعون و بعضیها حسید حسید یعنی درو شده از ریشت زده شده مثل صدوم یا شهر امورا عمو که مال قوم لوت بود قوم عاد اینا آثارشون از بین رفت بس بعضی هنوز قائمان بعضی از بین رفتن وما ظلمناهم ما انها ما ظلم نکردیم بر آنان ولیکن ظلموا انفسهم اما انها ظلم کردن بر خودشان ببین اگر قبل از ارسال رسول اونها رو خدا هلاك میکرد ظلم بود کسی به اونها نگفت کسی راهنماییشون نکرد بیچاره نفهمیدن نابود شدن ولی خدا این کار نکرد خدا تعالی ارسال کرد پیامبران را ارسال کرد اونها تفهیم کردند اونها تشریح کردند بعد از ارسال رسول اونها نابود شدند لذا الله می فرماید وما ظلمناهم ما بر آنان ظلم نکردیم ولكن ظلموا انفسهم اما آنان بر خود ظلم کردند و اینجا که باید درس بگیرند همگان از این داستانها این هست که خدایانی که اینها همیشه دم از اون خدایان میزدند همیشه بنام اونها افتخار میکردند همیشه به نام اونها صدقه و خیرات میکشتند اون خدایان نتوانستند کاری برایشون بکنند فما اغنت عنهم الهتهم یعنی انها را مستغنی نکرد فائده نبخشید دفن نکرد از انها آلهی انها آلها و معبودان انها التي يدعون من دون الله ان آلهه يكى سدامي زدن يدعون اي آن ان آلهه يكى انهارا سدامي زدن بغير الله انها دفنك دم من شيء اي شيء لما جاء امر ربك زماني كه امر رب و فيصلي رب آمد زماني كه وقت عذاب آمد ان خدایان هیچ کاری نتونستن برایشون بکنند همیشه مشرکین میگن هاولای شفاعون عند الله خب اعتقاد به قیامت که ندارند منظورشون اینه که اگر در دنیا برای ما مسیبتی بیاد همین خدایان جلوی خدا را میگیرند شفاعت غالب میکنند نمیزارند حالا خداون میفرمد چرا نتونستند جلوگیری بکنند فما اغنت عنهم آلهتون این آله هیچ نفعی به اونها ندادند وما زادوهم غیر تطبیب برعکس نف ندادن ضرر شدن بر اونا چرا؟ چون همین آلیه سبب حلاکتشون شدن با این آلیه ارتباط برقرار کردن شرک شد همین شرک سبب حلاکتشون شد پس وما زادوهم این خدایان و فریاد زدن این خدایان نیفزود در آنان غیر تطبیب بغیر از حلاکت نابودی خدای عزواجل انجا در ادامه می که این عذاب که برای این اقوامی که در گزشت خاندی تنها نیست هر قومی که نافرمان خدا باشد تمرد و سرکشی داشته باشد تکلیف او همینست و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القراخ گرفت پروردگارت، معاخزه پروردگارت، هرگاه قرا و اهل قرآ را بگیرد، حینگونه خواهد بود. در حالی که وحی ظالمه، وقتی که اهل قرآ باشند، ظلم بر خودشون بکنند. اِنَّ اَخْذَهُ عَلِيمٌ شدید، بدون شک معاخزه پروردگار دردناک و شدید است. خدا نجات بده، خیلی شدید و سخت درد آور خواهد بود، حال الله تعالی بار بار اشاره به این واقعات میکنه که بندگان به این واقعات فکر بکنند، بیان دیشند، این واقعات درسند، ابرتند، ان فی ذلک الآية لمن خاف عذاب الآخرة در این واقعات آیه هست و نشانی هست برای کسی که از عذاب آخرت میترسد. اون عذاب آخرت چیه؟ ذالک یوم مجموع لهم الناس. اون عذاب آخرت و اون آخرت روزی هست که مجموع لهم الناس برای اون روز همه مردم جمع میشند و ذالک یوم مشهود و اون روزی هست که همه مردم جا حاضر میشنند مشهود یعنی یشهده الناس یشهده الناس من آدم الى آخر البشر از آدم گرفته تا آخرین بشر اون روز جمع میشه اون کی هست الله میفرماید وما نؤخره الا لأجل معدود ما اون روز رو مؤخر نمیکنیم مگر بر مدت معدود یعنی یک مدتی که پیش خدا حساب شده هست خدا تعالیٰ اون مدت را حساب کرده شمارش کرده و خدا میداند ما نمی تا اون روز ما مؤخرش میکنیم. اما وقتی که بیاید خیلی سخته اللہ تعالی تا حالا عذاب دنیا را گفت برای این اقوام گذشته که این انبیاء آمده از عذاب آخرت می الله اللہ می فرماید یوم یأتی تخوی فخروی یوم روزی که می آید قیامت می آید آخرت می آید لا تکلم نفس الا بی اذن سخن نمی گوید نفسی مگر بی اجازه الله هیچ کسی جرأت و یارائے سخن گفتن ندارد فمنهم شقی و سعید اقسام مردم، مردم دو گروه هستند بعضی از این مردم شقی هستند بدبختند، بدبخت میشند و سعید بعضی از همین مردم سعیدند بعضی اهل سعادتند، خوشبختند، سعادت مندند اما اشقیا کی هستن هستند کی هستن بدبختها کی هستند نیکبختها ها کی هستن فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي اما انهایی که بدبخت شدن انهایی که شقاوت و بدبختی انها را در, در برگرفت گرفت النار النَّار انها در آتش هستند لهم فیها زفیر و شهیق برای انها در آن جهنم زفیر و شهیق است زفیر و شهیق را اگر معنی مرادی بکنیم یعنی آه و فغان درد و ناله ولی زفیر و شهیق صداهای کریه را میگویند صداهای بد و زشت را میگوین زفیر و شهیق هر دو صدای علاغ را میگن بلا نسبت شما شنیدید صدای علاغ را وقتی که صدا میره اول صداش جوری دیگه هست میره بالا میره, میره میره بالا آخر برعکسه و آخر کم میشه کم میشه یک حب زیاد میشه زفیر اول و نحیق الحمار همون فریاد و صدای حمار اولش از شهیق آخره آخرش خالدین فيها همیشه در اون آتش میمانند در جهنم میمانند ما دامت السماوات والارض تام که آسمان و زمین باشه ببین تام که اونجا که آسمانی نیست این زمین اونجا نیست یوم تبدل و غیر الارض والسماوات آسمان ها زمین یعنی بالا پایین همه چیز عوض میشن چیزهای دیگه خدا بهتر میدونه چی قاد بود لذا بالا و پایین همه چیز عوض میشه یوم تبدل و غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار پس چطور اینجا میگه تا وقتی که آسمان و زمین است؟ این کنایه از تعبید است این اصطلاح ما اهل دنیاست ما میگیم تا روزی که این زمین و آسمان است چنین که چنین می کنم. یعنی تا ابد تا همیشه. پس مادامت دامات سماوات به معنی چیه؟ به معنی ابد. لذا همیشه میمانند تا تا زمین و آسمان است یعنی تا ابد میمانند. إلا ما شاء ربك مگر آنچه که رب خواسته ببینید معنیش اینه که جهنمی ها همیشه میمانند، مگر آن اندازه تا, تا وقتی که پروردگار بخواد یعنی چه مشیت خدا چیه استثناء چیه در رابطه با این توجیهات زیادی گفتند یکی دو تا توجیه را عرض می کنم. یکی اینکه هنوز ابتدا به جهنم نرفته قبل از اینکه به جهنم بره همین زمان همین مدت استثناس. الا ماشاء ربک. اون مگر اونی که رب بخواد یعنی از اموا ابتدا چند وقتی هنوز به جهنم نرفته به خاطر حساب و کتاب به خاطر پاسخگویی. بعضی میگه الا شاء ربک همین زمان انتقال است. ما قبلا از شما که تو جهنم منتقل میشه از آتش میره به حمیم از حمیم میره به آتش حمیم ماشا و فرجه هست حمیم وسط است یا از جهنم میره به زمحریر از زمحریر میاد به جهنم این وسط ولی اینا زیاد به دل نمیشینند بعضی از علماء و بالخصوص کسانی که اهل لغت هستند توجیحاتی آوردن که مقدار اون توجیحات قانه کنند تر است میگن که اللہ به معنی سوا هست به غیر هست یعنی چه یعنی اینها همیشه تو جهنم میمانند غیر از اون چیزهای دیگری که رب میخواد یعنی علاوه از ماندنشون دیگه چیزهای هم خدا برای اونها میخواد فقط تو جهنم نمیمانند فقط نمیسوزند فقط آتش نیست ما سوای این عذاب دیگر دیگه دیگر تنوع در عذاب چیزای دیگه هم هست پس الا ما شاء ربک استثنا نشد بیرون نشد بلکه استثنا شد اون چیزهای دیگه مثل این هست که گفتند در زبان عربی مثلا کسی بگه که لک علی الفان اللل الفلتی کانت شما از من دو هزار می خواهی اللل الف غیر از اون ہزاری کے اول می یعنی چند تا می شند ستا دیگه شما از ما لک علی الفان إلا اللل الفلتی کانت علی خب ببین مثل این مثال دیگر دو نفر تو زندان هستند یک نفرشون یک نفرشون هر دو تا به صورت عبد هستند اما یکی در زندان هست حبس می کشد بدون شکنجه و یکی دیگه حبس می کشد با شکنجه ببین هر دو همیشه هستند او هم مؤبد این هم مؤبد اما او عبد هست بغیر از اون عبد چیزهای دیگه هم داره پس اینجا معنای آیه همین میشه که مادامت سماوات تا که آسمان و زمین هست یعنی همیشه الا ماشا عرب غیر از اون چیزی که رب میخواد یعنی غیر از این مؤبد مندنشون شکنجه های دیگه هم هست عذاب های دیگه هم هست نه اینکه این را نفع بکند این هست ولی غیر از این چیزهای دیگه هم هستید اینجا لطیفه ای برای رفع خستگیتون بگم که مساله را هم میفهمید میگن در زمان قدیم والله و علم چی اندازه حقیقت داره در همین مسجد عزیزی مسجد جامع قدیم اینجا زمان قدیم قدیم بلکہ خرات طلاب بودن به صورت حجره ای اون زمان قبل از مولانا عبدالعزیز رحمت الله علی یک عالم جابوت به نام قاضی شاه محمد رحم الله طلاب میگن تو حجره بودن اگر دقت کردید اونجا همه همسایه‌هاست از همون زمان سیکا بوده هنوزم سیک اونجا هستن همسای مسجد سیکا هستن اون گودواره سیکا همونجا هست خونه‌هاشون مغازه‌هاشون همه اونجا زندگی میکنه سیکا یک روز طلاب با هم مشوره کردن طلاب بالاخره گرسنه بودن چیزی نداشتن گفتن که ای ایک، یکی از این سیکار میبریم از, ای از اینا پول میگیریم پیش قاضی میبریم یکی گفت من ادعا میکنم من از تو تو تومن میخوام ست تا تک تومنی تو تومن میخوام شما دو نفر دیگه بیایید گواهی بدهید بعد وقتی یکی ادییا می کده دو تا گا هم داره بالاخره سط تومن به ما می ما میشیم بالاخره صاحب به تومن میشیم قاضی هم فیصله میکنه؟ گفتن خوبه ادیا کردند که ما از شما صد تومن می خواهیم گفت از کجا گفت چند روز پیش از من قرض گرفتی یا من از در فلان معامله ازت میخوام اون سیک انکار کرد گفت. خاطر خدا کهی تو اصلا من تو من نمی شناسی؟ گفت نه پیش قضیم میبرن بالاخره سیک ها متوجه شدند که اینها این توط ای هست میخواه از ما پول بگیرند چیکار کردند با هم مشوره کردند چون سیک همیشه همهشون هم شکل هستند هم شکل هستند گفتن که اونجا پیش قاضی که رفتیم من میگم که اون من بودم کسی دیگه یک سی که دوم میگفت من بودم شما اشتباهی نگرفتی خود به خود مشخص میشه که دروغ میگه لذا اونجا که رفتند اون طلبه اون ادعا کرد گفت من از این 600 تومن میخوام اون قاضی گفت که شاهد داری گفت بله این دو نفر شاهد من هستند اون سیک دیگه وقتی دو تا شاید بود نتونی چیزی بگیست اون سیکی دیگه زرنگی کرد گفت اشتباهی ما هم شکل استیم من بودم اون روز که تو ست دادی این طلبه از اون زرنگتر بود گفت نه اون ست تومان غیر از اینه اون که به تو دادم غیر از این ست تومنه به تو هم دادم بعدا شد ست تا این بده ست تا این بده اون خودش اقرار کرد برای این دو تا گواه بود الان معنا همینه این الان یک البته لطیفه معناش اینه که همیشه میمانند غیر از اون که نه اینکه چند روزی بیرون میشن غیر از اون چیزی که خدای تعالی برایشون در نظر گرفته لذا الله میفرماید که خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک غیر از اون که رب خد ان ربک فعال لما يريد بدون شک رب تو انجام میده اون چیزی را که بخواهد و اما الذين سعدوا ففي الجنه اما اونهایی که اهل سعادت باشند سعادت مند باشند اونها در بهشت هستند خالدین فيها همیشه در بهشت مادامت السماوات والارض تا اینکه اسمان و زمین باشد الا ما شاء ربك یعنی غیر از اون چیزی که در بهشت به اونها میرسه چنین مثای دیگری غیر از ماندن تو بهشت چنین مثا و عطاای دیگری الله به اونها میده عطا ان غیر مجزوز این عطایی هست بخششی هست که غیر مجزوز یعنی غیر مقتوع از اونها قط نمیشه لذا الله میفرماید فلا تکوفی میریتی مم ما یعبدوها اینجا زجر از بر عمل کرد کفار شما در شک نباش از اون چیزی که عبادت میکنه اینها، از اون چیزی که عبادت میکنه یعنی چه؟ یعنی از بطلان اون شک نباش مما یعبدو هاولا از بطلان اون در بطلان اون شک داشته نباش ما یعبدون الا کما یعبدو آباؤهم من قبل اینها عبادت نمیکنن. مگر همانگونه که عبادت میکردند پدرانشون قبل از این اینها بلاخره انا چی را عبادت میکردن باطل این هم باطل و انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوس و همانا ما بسورت کامل بیدیم سهم اونها را از عذاب نصیبهم ای من العذاب غیر منقوس یعنی کم نمیشه به بسورت کامل ما سهمشون از عذاب را به اونها اتا میکنیم و لقد آتینا موسى الكتاب فاختلف انتسلیه هست برای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چونکه وقتی قرآن نازل شد یک گروهی از صحابه ایمان آوردن اما جمع دیگری ایمان نه آوردند اختلاف کردند گفتند نه این کتاب ساخته و پرداخته خودت هست دست نوشته خودت هست خداوند عزّ و جل به حبیب وشته میده که یک درباره کتاب کتابی موسام اختلاف شد اونجا هم گروهی پذیرفتند گروهی نپذیرفتند لذا شما نگران نباش خب سوال وارد میشه که اینها که کفر میکنند انکار میکنند مگر نباید خدا اینها را عذاب بده عذابش که هست اون هم خدا میفرماید که مدت و زمان فیصله شده قبلا پیش خدای تعالی نوشته شده اگر قبلا نوشته نشده بود الان صورت نقد خدا از بینشون میبرد ولی بر اساس حکمت و مصلحت قبلا همه چیز فیصله شده است و لقد آتینا موسی الكتاب فاختلف فیه ہم انا ماداتم بموسى کتاب را پس اختلاف شد در آن کتاب اختلاف شد یعنی چه یعنی امن بهی قوم و کفر به قوم, قوم كما اختلاف في القران وهي تسلیه لرسول الله صلی الله علیه و اختلاف شد از طرف قوم نه کتاب خودش مشکلی داشت یه گروه ایمان آورد یه گروه ایمان نی آورد خب چرا پس عذاب نی آمد نمی یاد اگر کلمه پیشی نگرفته بود یعنی قبلا پیش از این خدا چی کرده فیصلش را کرده کلمه را صادر کرده یعنی گفته وقتی عذاب که است اگر او پیشی نگرفته بود صادر نشده بود لقضیه بینهم املم فیصله می بینشان و اینهم لفی شک منهم مریب همانا آنها در شک هستند از قرآن سرگردان مریب یعنی در ترددند در سرگردانی هستند و این کلم لما ليوفینهم ربک اعمالهم این تخویف اخروی هست البته و انک کلا از کنم که اسم ان هست لما حرف شرط است شرط مقدره لیوفینهم جزاء هست ببینید اون شرط را که مقدر بکنید معنا کامل میشه اگر اون را مقدر نکنید معنا میشه همان هر یکی از اینها رب ربک اعمالهم به صورت کامل هرگاه صورت کامل ربش اعمالش میده جمله ناقصه اصلش اینه و این کل لَمَّ يَبْعَسُهُمْ رَبُّكَ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ أَعْمَالُهُمْ لَمَّ يَبْعَسُهُمْ یعنی این شرط هر وقتی که خدا اون چی بکنه از قبرها بلند کنه لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ اون وقت رب تو بتو صورت کامل جزای اعمالشون رب بشون میده لی وفیان هم ربکا اعمالهم. اینه و بما یعملون خبیر. اینلا چون اون رب نسبت به اعمال اونا خوب خبر دارد. پس خبر که دارد جزای اعمال کیفری اعمال اونها را میده. و اینجا بازم تسلی برای رسول الله است. فستقیم کما امرت. صبر کن. همانگونه که تو امر شدی. دستور از طرف پروردگار برای آمده صبر کن و من به معك و هر کسی که توبه کرده از شرک با تو هست در کنار تو هست اونها هم صبر کنند تو تو امر و اونها هم امر شدند که صبر کنند و لا تطغوا سرکشی نکنید یعنی شما زیاده نکنید تحمل کنید صبر کنید خدا همه چیز را میبیند خدا همه چیز را تحت کنترل داره اینکه اونها ظلم میکنند ستم میکنند زیاده روی میکنند خدا میبیند به بما تعملون بصیر همانا به اون که شما عمل میکنید الله چی هست بینا هست عمال شما خوب عمل میکنید بد عمل میکنید لذا شما صبر کنید پس امر اول فستقیم بود امر دوم دو و لا تتغوها سووم و لا ترکنو الى الذین ظلمو تمایل به کفار و مشرکین نشان ندهید ببین کفار و مشرکین مذهب ثابتی که ندارند اونا دلشون میخواست که پیغمبر با اونها تفاهم بکند به یک جنبندی برسند مثلا پیغمبر مقدار کتابی آید همهش بد و بیرا نگوید به خدایان یعنی اونها آخر به یک چیزی جنبندی کنند توافق بکنند الله تعالی می ای پیامبر من و ای کسانی که شما پیروان پیامبر هستید کوچکترین تمایلی نشان ندهید در عمر دین عزیزان پیغمبر مختار نیست الان بعضی از حاکمان انتظار دارند از علما که در بعضی از مسائل که نس آمده بیاند و چیکار کار کنند طبق شرائط اونها یک فتوای بدند برای این عالمان هم همین خطاب قرآن هست که شما به سوی ظالمان از خود تمایل نشان ندهید یعنی به خاطر خواسته اونها به خاطر اون که اونها می شما هیچ وقت در دین تغییر ایجاد نکنید بدعت و خرافات ایجاد نکنید مثلا امروز دنیای یک کفر به خصوص دنیای غرب اون عالمی را دوست دارد و او از او عالمی استقبال می کند که درباره جهاد هیچ حرف نزند و حتی جهاد را توجیه بکند گویا در اسلام اصلا جهادی نیست که مسلمانان این ارز کنم که احساس جهادی در درون آنها بمیرد و خاموش بشه از بین برود خیلی مسائل دیگه هستن بعضی از حکومت ها که ترویج میدهن خرافات را دوست دارم با علماء به یک جنبندی برسم بعضی از خرافاتشون را به تحیید و امضای علماء برسانند که بنویس این چیز اشکالی ندارد اینها این خطاب مال اینهاست، ای کسانی که وارثان پیامبر هستید، شما کوچکترین تمایلی اجازه ندارید درباره دین تمایلی نشان بدید و غیر توحید را تایید کنید، غیر دین را بیای تایید بکنید، امضا کنید، نه ولی اترکانو، ایاله‌این ظلمو شما تمایل نشان ندهید کج نکنید خودتون را میل نکنید به اون سمت بسوی کسانی که ظلم کردند شرک میکنند کنند فتمسکمون نار پس آتش به شما می رسد خیلی سخته یعنی کوچکترین تغییر در در دین خدا بخاطر آنها باعث جهنم میشه و مالکم من دون الله من اولیا نفی شفاعت است نیست برای شما بغیر از الله هیچ چنانحامی آنی که شما را از عذاب خدا نجات بده ثم لا تنصرون سپس شما یاری نمیشید. یعنی اگر خدا برای شما عذاب بیاورد هیچ کسی دیگه نیست که شما را یاری کند کی شما را نجات می بس پس بهتر نیست به همون خدا بچسبید خودتون را محکن به ریسمان خدا بگیرید به قرآن خدا و از کوتاه نیائید از دستورات خدا و قرآن و اقیم الصلاه این امر مصلح است امر مصلح انسان را کمک میکنه اگر فشار بر تو هست نماز بخون نماز تقویاتت میکنه نماز ایمانت را و خودت را انرژی میده چون نماز معراج مؤمن است نماز ملاقات با خدا است وقتی که با خدا میری مستقیما حرف میزنی و سجده میکنی نزدیک ترین حالت تو به خداست انرژی میگیری قدرت میگیری جان میگیری اون وقت در مقابل ظالم استادگی میکنی استقامت میکنی لذا همیشه استعین و بصبر و صلاة بس نماز امر مسلح است اللہ میفرماید و اقیم صلاة طرفی النهار یعنی در همه اوقات نماز بخان دو طرف روز نماز بخان یعنی تمام روز صبح نماز بخان عصر نماز بخان بعد از ظهر نماز بخان و من اللیل یک تکی شب نماز بخان یعنی اگر کل شب نمیتونی یک تکی نماز بخان یعنی شب و روز نماز بخان با خدا رابطه داشته باش با خدا باشو پادشاهی کن نماز خواندن با خدا بودن است اما بازی از علما میگن که اینجا اشاره به نمازهای پنجگانه هم هست اقیم طرف طرفی النهار دو طرف روز یک طرف صبح هست نماز فجر و یک طرف دیگر ظهر و عصر که اینها بعد از قبل از غروب هستند دوتا تا و زلفا من الليل تکيه شب شامل عملی و اشام میشه بله ما قبلا گفتیم شیخ بزرگواری ما میگه ابتدا نماز پنج وقت فرض نبود طرفه نهار یعنی صبح و عصر و ظلفا من الليل تکیه شب نماز تعجوت اون زمان این بود ان الحسنات ذهبن السیئات همان حسنات سیئات را بین میبره کفاره میکنه بعضی وقتا انسان لغزش میکنه انسان اشتباهی میکنه خب این گناهش لغزشش برای او پرونده میشه همین که نماز میخونه نماز خیلی گناهان را وضو کفار میشه خیلی گناهان را همین آمدن شما به مسجد قدم میزنید ازیت میشید کفار میشه خیلی گناهان دیگر را خود نماز کفار میشه هر نیکی شما بکنید هر نیکی شما بکنید نیکی شما کفاره ببخشی. هر بدی انسان بکند اون بعد از اون نیکی میکند این نیکی کفاره اون بدی هاش میشه به همین خاطر انسان همه نوع نیکی ها بکنه نیکی مالی نیکی جانی نیکی زبانی هم ذکر و ورد خدا هم تلاوت هم نماز هم صدقه. اینا هر نوع گناهانی که انسان انجام داده همه را چی میکنه؟ پاک میکنه انسان روزمره خیلی اشتباه میکنه لذا میخواد همه اشتباهاتش پاک بشه همین اندازه نیکی بکنه همین اندازه کار خیر بکنه به بیچاره بی و بینواب برسه به بی یتیم برسه به نماز برسه از کنم به حاجتمند برسه همه کارها را بکنه ذالک رکرا ذاکرین، این پندی هست برای پند جامعی هست این الحسنات یوه ابن السيات واقعا پند جامعی است میخوای کی پرونده پاک و صاف بشه همیشه نیکی بکن تا نیکی تمام السيات تراب بخوره از بین ببره زار ذکرہ ذکر لذذکرین این جامع ترین پند هست برای ذاکرین برای کسانی که پند حاصل میکنند وصبر علاوه از نما صبر کن فاینالله لا یضیع اجر المحسنين همانا انا الله زاهن می اجر مخلصین را یا اجر نیکو کاران را هر چ... هر کاری کردی دستگیرت میشه در روزای سخت نمازت به دردت میخوره صدقاتت به دردت میخوره نیکیهات و اخلاصت به می میخوره پس صبر کن فورا منتظر معجزه نباش که یک شب همه چیز بیاد سر کن در روزای سخت بدرد میخوریم. فلولا کان من القرون من قبل اولو قلوب بقیه یانهون عن الفساد فی الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. الله تعالی تخویف اخروی بیان می میفرماید. اما در این تخویف اخروی یک الّتي برای عذاب هم ذکر شده. از این تخویف معلوم میشه که علت عذاب این است که وقتی مردمان فساد میکردند، گناه می کردند اونها را باز نمی داشتند انسانهای عقلمند فهمیده صاحبان درک و فهم جلوشون را نمی گرفتند چون که جلوشون را نمی فساد بیشتر می عذاب می آمد. لذا الله تعالی اینجا نکوهش میفرماید. زجر و اطاب می فرماید اقلمندان را لذا ما این برای ما درس است ما اگر می خواهیم که فساد همه اطراف ما را نگیرد عذاب خدا ما را احاطه نکند هر منکری می بینیم باش مبارزه بکنیم نگذاریم اهل منکر منکر بکنند فلاولا کان من القرون چرا نبود از قرون گذشتهی یعنی عم ممسابقه من قبلی اونهایی که قبل از شما بودن؟ اولو بقیه چرا دارندگان فهم و عقل نبود که ینحونا عن الفساد باز بدارن از فساد در زمین الا قلیل مگر تعداد اندکی بودن ممن انجینا من هم که ما نجات دادی معلومی اگر کسانی باشند که ینحونا عن الفساد بکنند این سبب نجات میشه اگر بقیه نجات پیدا نکنند خود انہا نجات پیدا میکنند پس باید راه را بگیریم و یاد بگیریم که باید چه کار بکنیم تبع الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا اُطْرِفُو فِي وَكَانُوا مُجْرِمِينَ دنبال کردن کسانی که ظلم کردند دنبال چی؟ مَا اُطْرِفُو فِي آن خوشگزرانی که درامی شد یعنی دنبال کردن خوشگزرانی را تعیش را عرض کردم خوشگذرانی های مفرد انسان را هلاک میکند ایشو اشرت همیش بخور بخور همیش لذات همیش شهوات همیش تفریحات اینا طرف میار اینها طرف هستند یعنی خوشگذرانی هستند اونها چیکار کردند و تبع الذين ظلموا اونایی که ظالم بودن دنبال کردند ما اترفو فی اون در آن خوشگزرانی می شد این خوشگزرانی ها را دنبال کردن و و مجرمین و جرائم پیشه بودن جرم می کردن. تبلیغ نمی کردن. و الا خدا تعالی می فرماید چرا آخی من ملتی را گروهی را که اهل صلاح و اصلاح باشن چرا عذاب بدم عذاب اونی را که اون اهل چی باشد اهل فساد باشد وما كان ربك ليهلك القرآ بظلم رب تو حلاک نمی کند قریه را از روی الظلم در حالی که و اهلها مسلحون اهل هون قریه اهل اصلاح باشن. خدا هیچ وقت حلاک نمی و ما كان ربك رب تو نیست نمی کند ليهلك القرآ تاکی قریه را حلاک کند بسبب ظلم. یا به سبب ظلم آنها و شرک آنها در حالی که و اهل هو مسلحون یا به سبب ظلم که خدا ظلم بکنه ای عز و اهل قد یم مسلح باش نه خدا این کار را نمیکند ولو شاء ربک جعل الناس امه واحده پس همیشه مردم گروهی در گمراهی بوده در شرک و کفر بوده و اگر خدا میخواست الله می فرماید همه مردم را هدایت میکرد ولو شاء الله ربك اگر ربت میخواست لجعل الناس امه واحده همه مردم را امتی واحده قرار میداد امتی واحده قرار میداد ولی خدا امتی واحده قرار نداد چرا چون خدا میخواد امتحان بکند خدا میخواست چیکار بکند امتحانشون بکنه امتحان لازمش اینه که خداوند همه را بالاجبار مؤمن نکند همه را بالاجبار مسلمان نکند بلکه به همه اختیار بدهد یک قدرتی در درون من و شما و صلاحیتی خدا داده به نام اختیار به نام کسب اون را خدا داده و بعد دو راه جلوی ما گذاشته وحد اینا هن نجدین شما خان دید ما انسان را به در راه راهنمایی کردیم یکی راه صلاح است یکی راه زلال است یکی راه فلاح است یکی راه نجات است. یکی راه هدایت یکی راه گمراهی بعد اختیار داد گفت ای بنده بفرما این تو و این میدان هر قدم را می‌خواهی انجام بده فمن شاء فلیؤمن و من شعفل فر. پس این اختیار را خدا بهت داده الان خدا میخواد تو ایمانی داشته باشی که با عقل سلیم خودت با اختیار خودت با راهنمایی وحی اون راه را بگیری این که خدا اون اختیار را از تو سلب بکند و بگه نباید در مسیر ایمان باشی این شد جبر مجبوری به این خاطر خدا نخواسته خدا چون اگر خدا میخواست باید مجبوریمون من میکرد به ما اختیار نمیداد میگفت همه شما همین را را برید و دیگه اون سلاحیت اختیار را از ما میگفت مثل ملائکه چی میبودیم مجبور بودیم الان ملائکه چه بخاند چه نخاند ذکر خدا میکنند این زمینه آسمان الله تعالی فرستید که شما وظیفه خودتون را انجام میدید با خوشی یا ناخوشی تو ان او کرها گفت قالتا اتینا طاعین با خوشی چه خورشید بخواد چه نخواد باید این مسئولیت را روزانه این طلوع غروب را بکند ماه بخواد یا نه زمین بخواد یا نخواد اینا مجبورند مکلف هم نیستند این ها مجبور انسان را خدا این طور نکرده که انسان چه بخواد چه نخواد باید بر مسیر دوید بره اون وقت دنیا چطور میشه برای انسان داره امتحان. دنیا میشه دار اجبار ببینید زندانی را مثلا وقتی میخواد تو اون سالم ببرند دلت بخواد یا نخواد باید بری نری ریک کتک میخوری خب اون دلش نمیخواد ولی میره اگر خدا چین ایمانی را بر بندگانش بخواد میتونه اون اختیار را از بندگان سلب میکنه اما خدا اختیار را سلب نکرده خدا به انسان اختیار داده تا ایمانی بیارد با انتخاب خودش نه با انتخاب خدا لذا انتیه این هست امتحان این هست آزمایش لذا الله می فرماید ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. اگر الله بخواهد قرار میده مردم را امتی واحده اما ولا یزالون مختلفین همواره مردم در دین با هم اختلاف دارند الا من رحم ربك لیکن کسی که رب بر او رحم کند او را الله تعالی بر مسیر ایمان قرار میده ولذلک خلقهم به همین خاطر خدا اونها را آفریده که ولا یزالون مختلفین هموار اختلاف و دو دستگی داشته باشند دو گروه باشند الان هر یکی قدرت فکر کردن و قدرت اختیار کردن داشته باشه و علت دیگر اینه که خدا فیصله کرده که باید جهنم را از جن و انس پر کنه و تمت کلمت ربکا فیصله رب تو تمام شده مبنی بر اینکی لأم لأن جهنم حتما حتما پرمی کنم جهنم را من الجنة والناس اجمعین از جن و از انسان همگی لذا چون خدا فیصله کرده بعدن انسان را پیدا کرده و بهش اختیار داده خدا می دونه وقتی که اختیار باشه بعضیها خود بخور راه جهنم را اتقاب میکنن پس با اختیار خودشون راه جهنم را اختیار می لذا این نیست که خدا از همون ابتدا برای جهنم اینها را مجبور کرده که به این سمت نه خدای تعالی برای جهنم بازی را پیدا کرده اما اون بعض از میان انسان ها مثلا 100 میلیارد انسان هست از این 100 میلیارد 50 میلیارد بره به اختیار داده این 50 میلیارد به اختیار خودش می روند و کل النقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک الله تعالی در باره این داستان های رسول و واقعات رسول که در این سوره ما خواندیم در باره اینها بیان می‌فرماید که حکمت اینها چیه حکمت را خداوند می‌فرماید یکی از حکمت‌ها تسبیت قلبی رسول الله است پیغمبر تقویت میشه با این داستان چون پیغمبر می‌بیند که بقیه انبیا هم مثل من امت اونها را جواب نداد امت با اونها مخالفت کرد و کل لنقص عليك هر یکی که ما تعریف میکنیم بر تو از انبا رسول از اخبار رسول ما نثبت به فؤادک اونایی هستن که ما به وسیله اون تثبیت میکنیم قلب تو را تو تقویت میکنیم قرس میکنین دل تو را فی هذه الحق و همین داستان ها و این واقیت ها کجا هستن در قرآن هستن و في هذه الحق در این قرآن حق پیش تو آمده و موعزت و این موعزی است پندی هست و ذکر للمؤمنین پندی است برای مؤمنین لذا خدای تعالی هر چیز را در این قرآن بیان فرموده و پند هم ذکر کرده اما کسانی که ایمان نمی آورند به انها هم بگو وقل للذین لا یؤمنون اعملوا على مکانتکم ان عاملون بی که ایمان نمی آورند به انها بگو اعملوا على مکانتکم بی همون سرجایتون عمل کنید همون عمل کفری را عمل شرکی را ادامه بدید ما هم بجای خودمون من عمل می کنیم یعنی بر مقتزای ایمان وانتظرو و شما منتظر باشید برای ما حوادث را اتفاقات را انا منتظرون ما برای شما منتظریم ای ما یونزرو علیکم چیزی که بر شما نازل بشه عذاب ما منتظر اون عذاب هستیم شما برای ما انتظار بکشیم ما برای شما انتظار میکشیم. اما عذاب کی میاد الله بهتر می داند در اول سوره شما خاندید دو تا مدعا بود یکی اینکه الله تعبدوا الا الله دوم علم غیب خاصه پروردگار است از این داستان ها وقتی که شما نگاه بکنید این داستان ها هم هر دو مدعا را میتونید اثبات کنید هم عبادت فقط برای خدا هم علم غیب چند طرح بندید خدمت شما عرض کردم مثلا ثابت شد ابراهیم علم غیب نداره فرشتگان ندارند لوت نداره انبیاء ندارند اینا که ندارند دیگه کی داره؟ لذا في النهاية الله يخبرنا: ولله غيب السماوات والأرض، فقط فقط برأي الله غيب السماءها والأرض وإليه يرجع الأمر، فقط بسويه برجردان دميه، الأمر كله جميع أمور، فعبدوه بس خالصان أورا إبادتكم وتوكل عليه فقط برؤو توكلكم وما ربك بغافل عما تعملون و رب تو غافل نیست از اون که شما عمل میکنید غیب دان است خبر دارد ولی اگر فعلا اقدام نمی کند غافل نیست به وقتش به الله تعالی اقدام میکند صدق الله العظیم